ایلیه المصیر ما یجادل فی آیات اللہ ایلی اللذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد صدق الله مولانا ربینا اللہ ما صلی علی سیدنا و شفیقنا و حبیبنا و مولانا محمد و علیه و اصحابه مبارک و سلیم سوره سوره مبارکیه مؤمن هست و نام دیگرش سوره غافر هم هست وجه تسمیه اکثر سوره های قرآن مجید به دلیل تسمیه کل به اسم الجز یعنی کل سوره نامگذاری شده به خاطر ذکر ای که درون آمده چون ذکر مؤمن آل فرعون آمده بخاطر اون مؤمن اسم سوره هست سوره مؤمن یا غافر الزم بخاطر این بعضی گفتند که سوره را نامگذاری کردند با اون لفظ قابل توجهی که در ابتدا می آید این سوره از سوره های مکی هست اکثر علماء علماء اتفاق نظر دارم بر اینکه این سوره سوره های مکی هست بسیاری از علماء سعی کردن ترتیب سوره ها را بیان بکنند اول کدوم سوره نازل شد دوون کدوم سوره سبون کدوم سوره،, سوره تقریبا 90 و اندی سوره در مکه مکرم نازل شد این شستومی سوره هست که نازل شد آن حضرت صلی الله علیه و سلم و این اولین هست از حوامیم سبعة. حفته حوامیم داریم. از بخدمت شما این حامی مؤمن اولین حامیم هست. و خدمت شما از کنم که حوامیم شما الله بخانید موضوعاتی که در حوامیم بیان میشه خلاصه تمام قرآن مجید هست حضرت عبداللہ ابن عباس میفرمد ازشون نقل شده لکل شیء لباب و لباب القرآن الحوامیم هر چیزی یک مغزی داره یک لبی داره یک خلاصی داره و مغز و خلاصه کل قرآن مجید هست حوامیم هفتگانه هست لذا این سوره های حوامیم خلاصه تمام قرآن مجید هستند و هر هفته مکی هستند در مکه مکرمه نازل شدند و برای سوره ها هم آمده اما این نکتر خدمت شما ارز کنم بعضی ها از مفسرین از ابتدا که شروع میکنم فضائلی بسیار زیادی نسبت به سوره ها بیان میکنن اکثر این روایت ها روایت ها هستند الا ما بعضی ها روایت صحیح هم هستند یک روایت این هست که در روز قیامت هفت حامیم مجسم میشوند بر هفت دروازه جهنم قرار میگیرد هر کسی که هر یکی از این حوامیم را خوانده اگر عمل کردش بد باشد و از اون در جهنم بخاند واردش بکنند میگه خدای این منو خونده هر حامی می بر یک دری ایستاده میگه خدای این منو خونده من تلاوت کرده شفاعت میکنه تا از اون در وارد نشه بالاخره همه درها برایش بسته میشه یعنی هوامیم سبعه برای شفاعت می کند در باب زیف هست اما در باب فضائل ذکرش کردند و حامیم اسم الله الاعظم از ابن عباس هم هست خود حامیم گرسی از متشابهات هست ولی عزرت عبدالله ابن عباس تبغیی ایک روایتی هست که این نام خدا هست اسم الله الاعظم هست در ابتدای سوره ها معمولا ربط بیان میشه مناسبت بین سوره ها بیان میشه که این سوره با سوره گذاشته چه مناسبتی دارد لذا اون ربط را ابتدا بیان میکنیم قبل از این سوره گذاشته سوره زمر که اگر حیاتی باشد و الله توفیق بده انشاءالله می خانیم در آخر را می خانیم رابط و مناسبت سوره مبارکه حامین با سوره زمر را ارز میکنم یه ربط ربط معنوی هست که عموما مفسرین ذکر میکنند و یه ربط دیگه ربط اسمی است که شیخ بزرگوار ما بعضی جه میگه از نظر اسمی هم این سوره با هم دیگه ربط دارند لذا شیخ حسین علی رحمه الله هر دو ربط را بیان میفرماید یک ربط اسمی دارد یعنی اون ربط اسمی با توجه به اسمهای سورها ربط اسمی اینه که در سوره زمر دو گروه ذکر دو شدن دو زمره ذکر شدن زمر به منه گروه فریق فی الجنت و فریق فی السعیر یک گروه بهشت میره یک گروه جهنم شما در اخر سوره زمر میخوانید وسیق الذین کفروا الی جهنم زمر وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنه زمر گروه گروه میشند کفار به سوی جهنم گروه گروه میشن مؤمنین به سوی بهشت پس در سوره زمر دو فریق ذکر شد دو گروه ذکر شد گروهی بسوی جهنم به بسوی بهشت حال در سوره مؤمن به زبان مؤمن آل فرعون، اون موضوع و مسئله ذکر میشه که باعث رفتن به بهشت میشه یعنی توحید هر کسی اون را تسلیم بکند تسلیم بشه اون از گروه بهشتی هست و هر کسی اون را قبول نکند اون گروه چی هست؟ جهنمی هست پس به زبان مؤمن آل فرعون مسئله ذکر میشه که اون دو زمر دو گروه مشخص می شود. این ربط اسمی هست اما ربط اصلی ربط معنوی هست ربط معنوی اینه که شما در سوره زمر انشاء الله می میخانید اونجا هست خداوند میفرمید فعبد الله مخلص الله الدین بحث عبادت است ای بندگان خدا را عبادت کنید مخلص الله الدین یعنی عبادت را خالص برای خدا انجام بدید مخلص الله الدین ای مخلص الله العباده. بعدا دین معنیش را ذکر می کنید. حال در سوره مبارکه مؤمن بخش اعظم عبادت ذکر میشه. بخش اعظم عبادت و رکن اعظم عبادت دعا است رکن اعظم عبادت چیه دعا لذا در سوره مؤمن ذکر میشه فدعوا الله مخلصین له الدين ای فدعوا الله مخلصین له الدعاء اونجا بحث عبادت بود اینجا رکن اعظم عبادت پس گویا موضوع هر دو سوره یکی هست و هر دو با یک تعبیر ذکر شدن این ربط سوره با سوره بود اما خلاصه این سوره مبارکه را هم ابتدا ارز بکنم ذهن نشین بشه این از اول تا آخر گویا یک موضوع هست موضوع محوری، و مدعای سوره که الان از بحث مدعا کرد مدعای سوره موضوع مرکزی سوره توحید فی الدعاء هست یعنی فقط از یک خدا بخواهید از کسی دیگر نخواهید فقط خدا رفع بزنی کسی دیگر رفع نزنی فدع الله مخلصین الله الدین این موضوع سه بار ذکر شده در این سوره در بخش اول که از حامیم شروع میشه تا الحمدلله رب العالمین وسط سوره این بخش اول است از وسط سوره قل نهیت نوهی اعبد اعبداللزینه تا آخر سوره این بخش دوم است در بخش اول چیزیک شده؟ ببینید در بخش اول یک تمهید یعنی مقدمه ذکر شده مشتمل بر چهار عنوان است درباره قرآن چهار عنوان میاد، همونجا عرض بیکنم و برای اثبات موضوع یک دلیل وحی زک شده یک دلیل نقلی زک شده دو دلیل عقلی زک شده یک دلیل وحی یک دلیل نقلی دو دلیل عقلی و بعد از هر دلیل عقلی سمره و نتیجه اون دلیل عقلی همچی شده بیان شده و همچنین در این سوره تخویف دنیاوی و تسلی برای رسول الله صلی الله علیه وسلم این مباحث همیشه در بخش اول است بخش دوم دوباره تکرار همین موضوعات است تکرار همین مباحث است خب سوره را آغاز می کنیم با واژه شريف حاميم حاميم از حروف مقطعات است باستي رواية از ابن عباس شده اسم الله الاعزم حاميم اسم الله الاعزم اما انها حروف مقطعات هست. معناه ان حروف مقطعات را الله باحترمي دانت این ها از اون هستن که وما یعلمو تاویله ایلا اللہ تاویل ومعنی انها را نمیدانا بغیر از اللہ ورسخون العلم علمائی که در علم رسوخ دارند انها چی یقولون آمننا به انها اجمال میگم ما بینها ایمان آوردیم کل من عند ربنا همین ها از جانب رب ما یعنی ایمان آوردن وقتی که حامیم میخوانیم پس ما میگوییم که ما مرادش را الله بهتر میداند ما ایمان داریم هرچی مراد پروردگار است و بعضی این سؤال را مطرح کردن که چرا خداوند در اول سوره ها این حروف مقطعات را آورده بعضی گفته اینا نام سوره ها هست اسم این سوره مثلا حامیم است اسم اون سوره الیفلامیم است اسم اون سوره الیفلام راست اسم اون سوره قاف است بعضی گفتن نه اینها اسرار هستند، رموز هستند بین الله و رسولش اما این مطلبی تفسیر بیضاوی نوشته که او مطلب بیشتر به دل می خورد و این هست که اینها حروفی هستند مقطعات به همین خاطر میگن که جدا جدا خوانده میشه قطع قطع تک تک, تک مثلا نمیگن حم صریح هم نمیخوان حم نمیگوین یا علم نمیگیم چی میگیم الف لام میم در حالی که اگر بخانیم میشه علم یا حم شن اینها قطع قطع تک تکا جدا جدا خاند میشه ح میم الف لام میم علامه بی میگه این حروف را در واقع برای طرف مقابل می کسانی که قرآن اونها را به مبارزه طلبید قرآن اونها را گفت که اگر شما این کتاب را قبول ندارید فا تو به صورت مثله. مثل این بیارید. و بعد فرمود که این کلماتش همین کلماته الف، لا، میم از این کلماتی که شما جملاتتون را با همین کلمات میسازید. مگه مردم که حرف میزنن به زبان عربی حروفشون غیر از این حروف است؟ نه همین حروف. یعنی این, این قرآن ترکیب یافته تشکیل شده از حروفی که شما هم جمله بندی های خودتون را از همین حروف می کنید. حروفش فرق نمی کنه موادش فرق نمی کنه کاف، ها، یا، عین، ساد مثلی نه؟ چرا شما نمی تونیم مثلیم بیارید فَإِلَّمْ تَفَعَلُوا ولن تَفَعَلُوا اگر نتوانستید و هرگز هم نخواهید توانست پس فتقون نار گویا این حروف تحدی هستن تحدی یعنی به مبارزه تلبیدن اونها را به مبارزه میتلبد که می شما اگر راست میگوید شما حق هستی این کتاب خدا نیست خب شما مثل این بیارید نمیتونی بیارید پس تسلیم بشید. پس این نوعی به مبارزه طلبی انها بار بار خدایات عز و در اول هر سوره این را تی می کند؟ ذکر می کند و اعلم خب تنزیل الكتاب من الله العزيز العليم یکی هست واجه تنزیل یکی هست انزال انزال یعنی یک بار نازل شدن تنزيل یعنی تدریجا کم کم نازل شدن تورات انزال شد یک بار نازل شد ان انزلنا التوراته فيها هدا ونور اما قرآن مجید در شب قدر انزال شد ان انزلناه في ليلة القدر ان انزلناه في ليلة مباركه نازل شد از لوح محفوظ به دنیا طبقی توجیح کی مفسرین می فرماید اما از اونجا قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در ظرف بیست و سی سال کم کم تنزیل و کتاب معنیش اینه یعنی تدریجا تدریجا نزول این کتاب قلب پاک تو از جانب اللہ است اون اللہی که العزیز العلیم ارز کردم اینجا یک مقدمه‌ای هست مشتمل بر چهار عنوان عنوان اول اینه که این حکمنامه این قرآن این آیننامه از سوی پادشایی هست بس بزرگ که غالب هم هست و بی علم هم نیست علیم هست معنیش اینه که ترغیب میده که ای کسی که مخاطب این قرآن سه بپذیر تسلیم شو چونکہ این حکم نام اسوی چنان احکم الحاکمینی هست که هم عزیز و غالب هست و هم دارای علم و کمال هست تنزیل الکتاب تدریجا نزول کتاب از جانب اللہ این بیان منزل است، نازل کننده الله. اللہ اس صفات منزل است الله عزیز العلیم اون اللهی که غالب هست الله علیم اون اللهی که هر چیز را داناست هر چیز را میداند و اون اللهی که غافر ذنب و قابل التوب صفات دیگر بخشاینده گناه هست و قابل التوب پذیرنده توبه از قبول کننده توبه بندگانش هست این داشته باشید که اینجا خداوند عزواجل چرا غافر ذنب و قابل توب واب آورد بین این دوتا بین بقیه واو نیست شدید العقاب ضد طول بین این دوتا واب آورد بعضی گفتند این واغ برای جمع هست چون واغ هم برای فصل میاد هم برای جمع میاد یعنی این هر دو صفتی یک صفتیه به خاطر جمع واغ آورده اما این زیاد قوی نیست واغ آورده علامه بیضاوی میفرماید که برای تغایر دو وصف این دو وصف از هم دیگه فرق می کنند از روبر ما یوتا و همو اتحاد هم ما چون بازیها تواهم میکنند که اینا هر دو یکی هستند. اگر هر دو یک صفت باشه، اون وقت اشکالش میدونی چیه؟ اشکالش این میشه که خداوند گناه را میبخشه، اما و قابل و توب گناه را میبخشه در صورتی که تو توب کنی. در حالی که اینطور نیست. غافر الزم یک صفت دیگه هست غافر الزم برای کسانی که توبه نکنند هم میبخشه و قابل توب مال کسانی هست که توبه میکنن. معنیش این نیست که شرط بخشیدن پروردگار حتما توبه است. نه خیلی ها رو بدون توبه میبخشه متوجه شدید برای بخشیدن گرچه همه ما توبه بکنیم اما برای بخشیدن توبه شرط نیست چنان ذاتی هست که بدون توبه هم میبخشه البته بعضی گناهان هستن تا توبه نکن انسان نمیبخشه مثلا شرک اِنَّ الله لَا يَغْفِرَانْ يُشْرَكَ بِ کفر ها توبه کرد چرا اما بقیه گناهان توبه لازمه اما بدون توبه هم میبخشه غافر الزمب و قابل این پس این واف برای مغایرت هست این غیر اون هست و قابل توب و پذیرنده توبه هست قبول کننده توبه بندگان هست صفت سوم شدید العقاب سخت عذاب میده اگر بخواد مواخزه بکنه بنده ای را بگیرد سخت عذاب میده صفت چهارم زدطول یعنی دارای وسعت هست وسعت در چی؟ بعضی گفتن زدطول یعنی زی سعت فی الامور کلها در همه امور دارای وسعت هست بعضی گفتن نا زدطول به زی سعت والفضل فضلش خیلی وسیعه است یا زل غنه و زل قدره غنی هست قدیر هست بس ببینید وقتی که ما به این معنا می کنیم زل هم علمش وسی، هم فضلش داد و دهشش وسی. بس این صفت صفتی چی شد؟ صفت رحمت شد اینجا خدای عزواجل دونو صفت ذکر فرمودند. چهار صفت هستند نه؟ از این چهار صفت ببینید چند تا صفت صفته رحمت است و چند تا صفت صفته غضب است. یا به تعبیر دیگر تعبیر علما چند تا صفات صفات جمال است. جمال یعنی زیبایی. و چند تا صفت صفات جلال و جبروت است. جلال و اون صفاتیه که تنها بوی خشم و عذاب میاد. شما بیشمارید. غافر الذنب رحمت یا عذاب، غذاب، رحمت یا غذاب، رحمت، قابل التوه، رحمت، شدید العقاب، غذاب، زیت طول، رحمت. اینجا چهار صفت بیان شده از این چهار صفت سه صفتش صفت رحمت است و یک صفت صفت غضب دو مسئله گیریم امیاد یک ولما می نویسند اینها را که نسبت رحمت و غضب الله همینه که اینجا است یعنی رحمتش سه برابر غذبش است انسان رو امیدوار میکنه نه رحمت پروردگار یعنی از چهار تا یک چهارم غضب است و سه چهارم دیگه چیه؟ رحمت اگر چهار بخشش بکنیم با به همین خاطر تو حدیث است ان رحمتی وسعت غضبی و مطلب دیگر ببینید اول همصفت رحمت آخر همصفت رحمت در وسط چی بود؟ صفت غضب منظور اینه که صفت رحمت غضب را چی کرده؟ احاطه کرده انسان را امیدوار میکنه یا نمیکند وقتی که تدبر میکنی تو این صفات که مفسرین الله رحمتشون بکنند، این تدبرات را و این نکات را استنباط میکند انسان به این نتیجه میرسد که واقعا پروردگار رحمتش بسیار و سياس مهربان است به شرط اینکه از اون جاده ای که اون برای هدایت تعیین کرده به خصوص در ایمان و عقاید از اون انسان منحرف نشود لذا الله می غافر الذنب بخشاینده گناه است و قابل التوبه پذیرنده توبه است شدید العقاب سخت عذاب دهنده است ضد طول دارای فضل و وسعت و کمال هست لا اله الا هو هیچ معبودی نیست به جز او هیچ معبودی که لایق عبادت باشد این مبد است یعنی دوید الیه المصیر این معاد است بعد از بقیه صفت ها دو تا نتیجه میگیریم یک نتیجه نتیجه مبدع میشه نتیجه به مبدع میرساند که لایق عبادت غیر از او کسی نیست بقیه مگه این صفات را دارند کسی هست که توبه ها را قبول کند گناه ها را ببخشند نخیر بقیه خودشون توبه میکنند برای خودشون بس لا اله الا هو انتو هيد. اليه المصير ان توهید الیه المصیر ان هم معادس و هم حسرست الیه لا اله غيره. بازگشت فقط و فقط بسوي بسوئی اوحست خب ما یجادلو في آیات الله الا الذين کفروا ابتدا ربط این آیه را با گزشته ذکر میکنم ببینید ما در گذشته خواندیم این کتاب نازل شده سوی ذاتی که دارای این صفات والا اگر صفات را ما نگاه بکنیم تقریبا حشت صفت میشوند اگر همه را صفت اصاب بکنیم یکی اول من الله بیان منازل بود یکی العزیز دو العلیم سی غافر الزمد چار قابل طوب پند شدید لقاب شیش زد طول هفت لا اله الا هو هشت اله المصیر چنان پروردگاری هست که هم به جز او معبودی نیست و هم بازگشت فقط و فقط سوی او هست خب وقتی که ذاتی که داره این صفات عالیه هست او ذات این کتاب را نازل فرموده پس می که کسی در این بحثی داشته نباشد. هیچ کسی نباید قرآن را انکار بکند کسی نباید درباره قرآن جدل بکند بحث بکند اما خداوند میفرماید نه با وجود این هستند کسانی ما یجادلو فی آیات الله این ربط شد بتوجه شدید؟ می طلبت که کسی جدال نکنت اللہ می فرماید جدال نمی کنت در آیات الهی در این حکمنامه اِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا این عنوان دوم است ارز کردم در این تمہید چار تا عنوان است این عنوان دوم است یعنی این حکمنامه چنان ظاهر و آشکار هست که فقط معاند جدال می کنت. فقط معاند جدال میکن، اهل اناد جدال می کند درجات زلالت چند تا بودند چارت اولی اناد هست یا هم شک و ریب بعدا وقتی که گمراه بشه جدال بالباطل هم می کند بس الله می فرماید ما یجادلو فی آیات الله. ببینی بحث قرآن قبل آمد تنزیل الكتاب مقام میطلبت که بشه ما یجادلو فیه ما یجادلو فیه در این کتابی که قبلا ذکر شد کسی جدل نمی کند مگر فلان ولی مد فیه بلکه فرمود ما یجادلو فی آیات الله شما اگر نهف خانید، اونجا میخانید این استلاف را چی میگن؟ وضع ظاهر موضع المزمر یعنی به جای زمیر چی آوردند؟ اسم ظاهر آوردند. به خاطر چی؟ برای اظهار شرفي این حکم نامه. که این حکمنامه نامه نگفت نا فیه. این قد شرف دارد که اسم ظاهر بکارد. آیات الله هست. این آیات نسبت به الله دارند لذا الله می فرماید ما یجادلوا فی آیات الله در آیات الهی در این حکم نام جدال نمی کند الا الذين کفرو مگر کسانی که کفر کردند در سوره مبارکه کهف می و ویجادلو فی آیات الله الذین کفرو بالباطل لیدحضو به الحق در آیات الهی کی جدال می کند؟ کسانی که کفار هستن؟ چرا جدال می چرا بحث می کنند؟ لیدحضو به الحق تحقرا حق را بلغزانند حق را دف کنند، دور کنند و همچنین در سوره غافر در همین سوره می آیت و جادلو بالباطل لیدحذو به الحق اینجا هم حست ما یجادلو فی آیات اللہ در این آیات الهی جدال نمی کند الا الذين کفروا مگر کسانی که کف کردند ای سطر الحق این آدم خب کفار کفار اهل جدال هستند اهل ایمان جدال نمی کنند فلا يغررك تقلبهم فی البلاد شما را گشت و گذار اونها در شهرها فریب ندهد ببین شبهه ای ایجاد میشه سوال ایجاد میشه کفار اگر دشمنان خدا هستند چرا کفار وزشون از ما بهتره همین امروز شما ببینید در هر زمان اینطور بوده همین امروز حق ویتو با کیه با کفار است. اقتصاد دنیا در دست کیه کفار هست بزرگترین قدرت از نظر تسلیحات و از نظر قدرت نظامی و از نظر پیشرفت و غیره کدوم مسلمانان هستن یا کفار؟ کفار بهترین بلاد به اصطلاح بظاهر آباد و بلاد پرسمر رکی دارند کفر دارند یعنی همه امکانات دنیا رفاهی مالی، سرمایه‌ها ها، سروت ها،, ها، تجارت ها، همه به دست کفر است مسلمانان در اقلیت هستند، در, در هم هستند، در همون زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم، صحابه و مؤمنین یک مجموعه بسیار ضعیف، فقیر. اما کفار، ابو جعله، ابو لحابه، عتبه، شیبه، میره شام، میره نمیدونم، یمن میره، از اینجا کالا بیار، از اونجا جنس بیار، عارف اول میزنه مغروره. الله عز و می فرماید این تقلبشان شما را فریب ندهد تقلب ترجمه کردم گشت و گذار یعنی از این شهر به اون شهر رفتن از اون شهر یک روزی می بینیم سفر میکنه امروز آقا کجاست دوبه فردا پاریس پس فردا لندن تمام دنیا زیر پایش هست اصل تقلب این را میگن گن ماری که توریگستان هست وقتی که ریک داغ میشه ہے این طرف اون طرف میغلطت اصل تقلب اینه از این گرفته شده یعنی از این جا به اون جا به اون جا, جا, جا, جا, جا, جا خب این در آیات دیگری هم آمده در سوره مبارکه آل عمران هست فلا یغرنک تقلب اللوین كفروا فی البلاد شمارا هرگز فریب ندهد این از این شهر به اون شهر رفتن و گشتن و سفر کردن کسانی که کف کردن در شهرت چرا؟ مطاع قلیل چون کالای اندکی در دستشون هست ثم مقواهم جهنم و بئس یعنی در دنیا اگر کسی وزش توب باشه وزش خوب باشه این دلیل موفقیتش نیست دلیل رستگاریش نیست پس ای شما را فریب ندهد گول نزند و باز امام رزی که امام لغت است ایشو فرمد مصدر, براي قلته مصدر براي براي قلته تقلب برای قلت و حقارت میاد مصدر تقلب برای چی میاد تفاعل برای قلت یعنی تقلب گشت اندک و حقیر چرا درسته از نظر ما چون ما الان این دید دنیاوی را داریم دید اخروی را هنوز خدا به ما نداده هنوز منتقل نشدیم اونجا ببینیم از, از نظر ما زیاد هست اما خدای اززوجل که این عالم و اون عالم را این دنیا و اون دنیا را تحت نظر دارد برای خدا بسیار حقیر و قلیل حسین بگشت گذارشو بسیار اندک و بیارزشه ده سال بیست سال پنجه سال میگذره دیگه میفته میمیره همه چیز را از دست میده یک شبه زیان میکنه زرر میکنه لذا این که کفار امکانات دارند قدرت دارند رفاه دارند این دلیل موفقیت اونها نیست دلیل نجات اون... چون دنیا فقط این دنیا نیست این دنیا موقتیه، این دنیا زود میگذارد هر یکی از عمرمون بعضی ها سی سال بعضی ها سال بعضی ها سال بعضی بیشتر بعضی کمتر گذشته چطور زود گذشته همینطور باقی هم زود میگذرد. پس این واقعا زود گذار هست و این واقعا قلیل و حقیر است. پس خداوند اینجا دفع شبهه می که اگر کفار دشمنان من هستند شمای وقتی تو ذهنتون این شبهه نیاد که اونا پس چرا دارند این شما را فریب نده این شما را گول نزند این در دنیا بلاخره خداوند قلیل و حقیر بهشون داده چند روزی خوش می فلا یغرور که تقلب هم فل بلاد در شهرها اما کذبت قبل هم قوم نوح بعدا خداوند بیان می اون بعد تخویف دنیاویست که این طور نیست تو این دنیا واقعا کفار تا آخر هیچ مشکلی داشته نباشن نه تو همین دنیا هم اذاب هست خصوص کسانی که جدال بالباطل میکنن با اهل حق مبارزه میکنن با دین خدا مبارزه میکنن انها را خداوند در همین دنیا به اشد دی مجازات گرفتار میکنن مقوم نوح و من بعدهم وهم هممت كل امت برسولهم لیأخذوه و جادلو بالباطل وَجادلوا بالباطل ليُدحِضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب نار صدق الله مولاه اللهم صل على محمد وعلى بعد از اینکه در آیه گذشته خواندیم نسبت به آیات الهی کفار هستند که کفر می کنند ما یجادلو فی آیات الله إلا الذین کفهو کفار جدال می کفار بحث می کنند کفار انکار می و اگر کفار وضعشون خوب باشد احوالشون خوب باشد ما بعدا با این باعث فریب باشد فریب ما بشه گول زدن ما بشه چون که چند سواهی الله تعالی خودش فرموده اینها در دنیا خواهند داشت اما بسیاری از همین کفار در همین دنیا هم مؤاخذه شد چطور هست که از یک طرف میفرماید که کفار در دنیا وضعشون خوب هست از یک طرف میفرماید که کفار مؤاخذه میشن وقتی که قرآن را با نظر عمیقی ما تدبر بکنیم به این نتیجه می رسیم که اصلش این دنیا دار جزا نیست دار نیست قرار نیست که حتما در همین دنیا عذاب بر کفار بیاید منتظر هم نباشیم حتما هر چی کافر هست در همین دنیا به کیفر اعمالشون برسن نخیر. خیر اگر قرار باشد که در همین دنیا فقط عذاب باشد اون وقت هیچ کافری باقی باید باقی نماند و اون وقت دنیا دیگه دار امتحان نمیشه دار امتحان در صورتی هست که هر کسی آزاد بشه هر راهی را انتخاب میکنه هر مسیری را برمی‌گوزیند بتونه برگزینه اگر قرار باشه تا اینکه کسی مسیر اشتباه رفت بخوره تو سرش خب هر کسی میترسه هیچ کسی بر مسیر غلط نمیره اون وقت ایمان هم ایمان اجباری میشه از ترس همه ایمان میارند. خداوند تعالی دنیا را دارالجزاء قرار نداده دار امتحان قرار داده اما گاهی که کفار در کفر و تمرد خودشون از حد می گذرند اون وقت خدای تعالی بعضی ها را خیلی کافر تو این دنیا بوده در تاریخ گذشته گذشتند همه به عذاب گرفتار نشدند بعضی از اقوام را خدای تعالی گشمالی می عذاب اونها عبرتی باشد برای دیگران اگر کسی میخواد بفهمد در همین دنیا هم دلایلی باشد و هم مطلقاً با کفر از این آیه بالخصوص که میخانیم مطلقاً با کفر خدا تعالی عذاب نمیده در این آیه اسباب سگانه عذاب بیان شده اسباب سگانه عذاب یک تکذیب حق اولا حق را انکار کردند تکذیب کردند انبیا را تکذیب کردند کفر کردند دو توهین رسول انبیا را توهین کردند با انبیا درگیر شدند اذیتشون کردند شکنجهشون دادند گاهی از شهر بیرونشون کردند هم خورشون کردند سه جدال بالباطل جدال بالباطل یعنی سعی کردند که دعوت انبیار را دفت کنند دعوت انبیار را بی اثر کنند به وسیله عباطیلی که داشتند به وسیله افسانه، داستان، دروها سعی کردن که دعوت انبیا بی اثر بشه وقتی که کفار اینقدر تمرد بکنند که از حد بگذارند نه تنها به کفرش بسنده می کند. نبی خدا را پیامبر خدا را مقربان خداوند از و اذیت را ازیت و آزار رساندند این یکی از دلائل عذاب این میتونه باشه به قول علامه رومی هیچ قومی را خدا رسوا نکرد تا دل صاحب دلی نیامد به درد وقتی که دل صاحب دلان به درد آمد قلب انبیا الهی به درد آمد اونها را اذیت کردند و بعد با اونها جدال کردن هرچی اونها حق میگفتن اینها در مقابل اونها شبهات و اشکالات و تمسخور و یک سری عباطیلی برای مردم بیان کردن افسانه و داستانهای دروغ بیان کردن تا مردم از حرف اونها متاثر نشوند مردم ایمان نیاورن این را میگن جدال بالباطل این ستاک بود بعدا عذاب آمد چنانچه الله می فرماید کذبت قبلهم قوم نوح تکذیب کرد قبل از اینها قبل از ان قریش مکه مشرکین مکه قوم نوح تکذیب کرد و من بعدهم معلوم میشه اولین قومی که به عذاب گرفتار شده اینها هستند قوم نوح هستند و احزاب دیگر بعد از قوم نوح احزاب مثل قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، قوم لوط که در قرآن مجید ذکر میاد. اینها تکزیب کردند، تنها نکردند نکردن وهمت کل امت برسولهم اون علت اول و سبب اول عذاب تکزیب بود سبب دوم توهین رسول و همت کل امتین بر رسولهم قصد کرد هدف قرار داد هر گروهی رسول خودشون را که رسول را چکار بکنند لیه خذوه تا که رسول را بگیرند اسیر بکنند شکنجه بدن قتل بکنند یعنی وقتی دستگیرش بکنند هر کاری با رسول هاستان بکنند وجادلو بالباطل این سبب سوم هست جدال بالباطل اجادل الانبیاء بشر با شر با کذب و با دروغ با انبیاء جدال کردن حدفشون از جدال بالباطل چی بود؟ لیدحضو به الحق تاکه بلغزانند بیاندازند بی وسیله اون حق را مذهب حق مراد است بینویسی مذهب حق ببین دحض میگویند اون زمینی را که لغزنده باشد گاهی بارم میاد لغزندگی ایجاد میشه گاهی برف میاد دحضن مزله دحض میشه یعنی لغزنده میشه و انسان میفته اما هدف اینجا چیه؟ یعنی حق را و مذهب حق را انداختن بی اثر کردن امروز هم خیلی ها هستند که با حق و با مذهب حق مبارزه می کنند اینا, اینا ما می گیم جدال بالباطل مثلا خیلی افراد هستند گروه ها هستند شبکه ها هستند که شبروز کارشون اینه که آیات قرآن مجید را می و آیات را مورد استحضا و کفر و تمسخور قرار می دند و میخواند به نوعی بگن که این آیات اشتباه گفتند اشتباه رفتند اشتباه رانمایی کردند اینطور طور نیست یا بسیاری مثلا با توحید مشکل دارند آیات ایمان آیات توهید را هی تعویل میکنند تعویلاتی که میخواند در لابلای این تعویلات خرافات خودشون را اثبات کنند شرک خودشون را اثبات بکنند بیدینی را میخواند که اثبات بکنند این جدال بالباطل است یعنی به وسیله ایک سری توجیحات باطل ایک سری باطل با حق و با مذهب حق و با ایمان و اهل ایمان مبارزه کردن پس این شیوه شیوه جدیدی نیست این شیوه از همون قدیم بوده اما در هر زمانی متفاوت پس این سبب سووم از آباس خاصاً چکار کنند لیود حضو به الحق بعد از توحین رسول سعی کردن جدال بالباطل کنند تا به وسیله این مذهب حق را هندازند بلغزانند از بین ببرند بی اثر بکنند فا اخفتهم فکیف کان عقاب فروردگار میفرماید من آنان را معاخذ کردم فا کیفه کان عقاب عقاب من عذاب من این استفام را میگن استفام تحویل استفامی که حول ایجاد می کند وحشت ایجاد می کند چگونه سخت است عذاب من یعنی چطور سخت بود چقدر سخت گذشت به چه حالت زاری گرفتار شدند وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النار سبحان دیم که از اثرات جدال بالباطل چی هست محرومیت از ایمان مهر جباریت کسی که از طریق باطل می خواهد که با حق و با اهل حق مبارزه بکند این دیگه خودش نمیخواد ایمان بیاره خدا برای همیشه اون را از ایمان محروم میکنه از ایمان که محروم بشه بعدا مستحق آتش میشه مستحق جهنم میشه الله میفرمد و کذالک حق قد رب ربک این گناه ثابت شده کلمه رب امام نافع این را ترجمه میکنند کلمات ربکه این منظور وعده پروردگار و بعضی میگن کنند کذالکه به همین دلیل چون جدال بالباطل می کنند به همین دلیل وعده پروردگار ثابت شده على الذین کفر و برکفار اون کلمت ربی که چیه کلمت ربی که کزانی که ترکی بلدند اون مبدل من ہو انهم اصحاب النار این بدل هست بیان کلمت ربک هست یعنی وعده پروردگار این هست که انهم اصحاب النار اینها اهل جهنم هست اهل آتش هست در آتش خدا می سوزند یعنی ایمان هدایت نصیبشون نمیشه با کفر میمیرن با کفر که بمیرن تکلیفشون روشن انهم اصحاب النار اما در مقابل این منکرین خدای اززوجل همیشه در قرآن مجید هر دو گروه را ذکر میکنه اگر ذکر عذاب و یا جزا و پاداش باشه هم جهنم را میکنه هم بهشت را اگر ذکر اوصاف باشه هم اوصاف کفار هم اوصاف مومنین خب این حال کفار بود که از هدایت محروم میشند از ایمان محروم میشند و به جهنم داخل میشند اما حال مومنین خداوند میفرماید مومنین کسانی که این عنوان سومه هست کسانی که این حکم نامه را میپذیرند این آیین نامه را میپذیرند این قانون ما را میپذیرند چنان محبوب میشوند که حتی فرشتگان برایشون دعا می کنند حتی فرشتگان برایشون دعای مغفرت می کنند الذين يحملون العرش آنهایی که حمل حمل می کنند عرش الهی را اونهای که حملتو العرش هستن کیا هستن فرشتگان تعدادشون چقدر هست خدا بهتر می در قرآن کریم همین قدرداری وقتی که قیامت فرامی رسد و یحمل عرش ربک فوقهم یوم اذن پروردگار عرش پروردگار را حمل می در اون روز هشت الان نفر هستند که خیلی تنومند و قوی چون بعضی روایت ها داریم البته این روایت ها ضعیف هستند که تحت السرا زیر زمین اینها پایشون هست و فوق آسمان ها اونجا سرشون هست اونجا که به عرش منتهی میشه ولی این روایت ها ضعیف هست الله بهتر میدوند کیفیت را اما در قرآن آمده که عددشون هشت هست این اعداد هم امتحانه و اگر کسی بخواهد این مسائل را با عقل خودش بسنجد و ترازی بکند او شکست میخورد او نمیپذیرد اینجا به غیر از این که وقتی که وحی الهی هست و تسلیم بشیم و کیفیت را به خدا و بکنیم دیگر راهی برای ما نیست اینجا که گفته و يحمل عرش ربی فوقهم بسیاری از مفسران میگن الان چار نفر استن. اون وقت دوبل میشن چار هشت نفر میشوند. اما بعضی معتقدن نه الان هشته اون وقت هشته. اما خداوند عزوجل اونجا در برای اون روز صحبت فرموده. على أي حال حاملین عرش هشت نفر هشت صف هشت جماعت به اسطلاح امروزی هشت گردان و لشکر والله و عالم لا یعلم عددهن الا الله عددهن الا الله. ما هم همون طوری که قرآن مبهم گذاشته یک ای که همیشه تکرار میشه تو درس ما ابهمو ما ابهمه الله چیزی که خداوند به صورت مبهم ذکر کرده خدا بازش نکرده شما هم به همین صورت گرچه مفسرین باز کردند ولی دلایلشون دلایلی بیشتر زنی هستند حشت وقتی که قرآن گفته هشت ما میگیم هشت حشت کیفیتش را الله بهتر میده هشت یعنی چی این حملت العفش وَمَنْ حَوْلَهُ وَكَسَانِكِ اَتْرَافِ عَرْشِ هَسْتَنْد يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِ انها تسبیح می گوین حمرا با حمد رب تسبیح و تحمید دو چیز هستند اما با حمدی که تکمیل می شوند. سبحان الله و بحمده تسبیح صفت سلبی هست و تحمید صفت ایجابی هست یعنی چه؟ یعنی تسبیح صفتی هست که از خداوند نفی می چرا چی را نفی هر عیب را هر آلائش را هر شریک را فرزند را زن را ولد را همسر را تسبیح به این معنی هست هر چیزی که لایلیق یلیقو از او چی هست؟ پاک هست،, هست، منزه هست تحمید یعنی هر صفتی که یلیق و بشانهی خالق هست، مالک هست، قادر هست، عالم هست این صفات را برای او چی اثبات می به این خاطر تنها اگر بخوایی توحید خدای از و را اثبات بکنی با تسبیح تنها نه اون تسبیح گوی اللہ اله هست آیا کلمه تکمیل شد؟ توحید تکمیل شد نه تکمیل میشه که بگی الا الله پس سبحان الله یعنی لا اله خداون پاکس از شریک خداون پاکس از اینکه که اله دیگری باشد از اینکه زن و فرزن داشته باشد از اینکه که عیب و ایراد و نقص داشته باشد تسبی معناشینه و به حمدیه وقتی میگی معناشینه که ایلا الله یعنی صفات خوب مهامد خوب ها اینها برای الله هست. پس اون صفت جلال هست به تعبیر دیگه و حمد صفت جمال هست. ای بار بار برای تفیم مثال بیان می کنند بنده هم قبلا ارز کردم وقتی که می یک جایی را نقاشی بکنیم زیبا بکنیم اول چی کار می کنیم اول خوب صافش می کنیم تمیزش می کنیم سنباده چیزی اونجا می مالیم می تا که خوب آماده بشه برای چی؟ برای اینکه نقاشی رنگ بگیره این همون تسبیح هست بعدن تحمید اون رنگ و اون زیبایی و اون منظره و اون نقاشی کنجا میکشید پس فرشتگان ابتدان چکار ربهم. تسبیح میگویند همراه با حمد پرورتگان و یؤمنون بهی و, عز و, جل و به خداوند عزوجل ایمان دارند ببینید و یؤمنون بهی اینجا اشکالی مفسرین ذکر کردن لابد تو ذهن شما محمده کسی که تسبیح و تحمید میگوید او ایمان داره دیگه هر کسی که به خدا ایمان داشته باشد خدا را ذکر می کند خدا را یاد می کند وقتی که خدا فرمود یسبحون بحمد ربهم هر مخاطبی میفهمد فهمد مؤمن مومن هستند پس آیا و یؤمنون بهی ذکر ایمان تحصیل حاصل نیست آیا این چیزی که از قبل انسان اون را دریافت همون را دوباره تکرار نکرده پس این یؤمنون بیهی را چی را خداوند ذکر کرد در حالی که یؤمنون بهی از یسبحون فهمیده شد اونا مؤمنن که تصویر و ذکر میکنند اینو چند جواب دادند بعضی گفتم به این که فضل ایمان مؤمنین را بکند ایمان فرشتگان را هم ذکر کرد یعنی اونا هم مثل شما مؤمن هستند بعضی جواب دیگه ذکر کردند اما یک جوابی تفسیر کشاف داده الله جارالله زمخشری گرسی صاحب تفسیر کشاف عالم ماهری هست زبردستی هست اما معتزلی هم هست و معتزلی اختلافات با اهل سنت داشتن در بعضی مسائل انحراف داشتن اما علام زمخشری در تفسیر ید داشت امام رازی رحمه الله از نکته‌ای که ایشون انجا ذکر کرده چنان متاثر است و چنان تعریف میکنه میگه اگر زمخشری هیچ دیگه در پروندهش داشته نباشه همین یک نکته عجیبی که بیان کرده همین او را کافیست برای نجاتش لذا ایشون چه نکته بیان میکند؟ ایشون میگه من مقدمتا خدمت شما عرض کنم وقتی که ما خواندیم الذین یحملون العرش فرشتگان اطراف عرش هستند خب در ذهن من و شما و هر کسی که می, می آید همینی که خب فرشته اونجا در عالم بالا هستند اونجا کنار عرش هستند همه چیز را می بینند و پروردگار را مشاهده می کنند چون خداوند الرحمن و علی العرش است و, و لذا ایمان اونها با ایمان ما فرق دارد ایمان ما ایمان بالغیب است ایمان اونها ایمان چیه مشاهده است ایمان عینی هست، ایمان چیزی را که می بیند هست. در واقع برای دفع این شبه خدای از فرمود و یؤمنون منون یعنی اینکه اونها دم ماموریتشون کارشون وظیفهشون اونجا هست. این نیست که اونجا که باشه اونها بالاخره همه چیز را مینن. نه اونها هم ایمان دارند، ایمان بالغیب دارند. یعنی با که استقرارشون در عرش در اطراف عرش هست اونها هم خدای از و را نمی بینند اینکه گفته شده ار رحمن و علی العرش استوار این طور نیست اونطوری که بعضی می گویند که اونجا بلاخره خدای از و مثل پادشاه روی عرش نشسته اهل سنت و سلف ما معتقدند که این آیه از متشابهات است. و این کیفیتش را الله تعالى میداند. دلیلی که بعضی توجیح می میکنند، بالاخره از این لازم میاد علاوها برای خداوند عزّ وجل که جسم داشته باشه و خیلی از افراد که به اونها گروهی هستن به نام مجسمه، اونها این اعتقاد را دارند. ما معتقدیم که الله عزّ وجل بر عرش مستوی هست، اما کیفیتش را خود الله می میداند. سلف ما میگویند که ما تفویض میکنیم و می سپاریم اون حقیقت و معنای مرادی را به الله عزوجل این است ازمون قبیل و ما یعلم تاویلہ الا الله و الراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا آنگونه که مراد رب ما اسم بهش ایمان داریم ولی انتور نیست که انجا بلاخره نشسته باشند دو فرشتگان مشاهده میکنند یک پادشاهی بر تخت سلطنت هست خب اطراف وزرا ذراف خود خدام همین میبینم پادشاه را هر روز ملاقات میکنند ما که اونها را میبینیم میگیم خوشبی آل سعادت شما هر روز بر آقا رئیس جمهور شما همراه هستید اونطور نیست که فرشتگان بلاخره شب روز مشاهده بکنن نه و یؤمنون به یعنی اونها ایمان دارن مثل ایمان شما ایمان بالغیب دارن وصیفه شن مسئولیت شن اونجا پس این برای بیان نوع ایمان فرشتگان بعد از تسبیح و تقدیس ایمان را ذکر کردن و, للذين آمنوا و استغفار می فرشتگان برای مؤمنین این فضل بزرگی هست برای مؤمنین که فرشته برای دعای مغفرت می کند مؤمنی که واقعا مؤمن باشد واقعا خدا پرست و یک تا پرست باشد الله ناجی هست شون وقتی که خداوند حکایت می کند دعای فرشتگان را ما به این دعا باور داریم یقین داریم و خداوند که حکایت می کند را این دعا پذیرفته هم شده که حکایت میشه یعنی وقتی که اونا می ربنا فغفر قطعا بخشیده شدند لذا الله تعالی می فرماید اونها دعا می کنند مغفرت می طلبند لیلذین لام اختصاص است برای مشرکین نه آمن و برای کسانی که ایمان آوردن چگونه دعا می کنند ببینید دعای فرشتگان را این دعا قابل تقلید است دعاهای خودمون را این گونه قرار بدیم این دعا بکنیم ابتداء خاسته و مطالبه را بدون مقدمه مطرح نکنید. اول ربتون را تمجید کنید، تعظیم کنید، تعریف کنید، یاد کنید ربنا وسعت کل شیع رحمت و علما. بار علاه هر چیز را در بر گرفتی از نظر رحمت و علم. یعنی ای وسعت رحمت و علم شيء، که کل شی رحمت تو و علم تو هر چیز را در بر گرفته بسیار وسیو و فراخ هست اگر می خواهی دعایت مقبول بشه مثل فرشتگان اول تعریف رب تراب کن سوره مبارک فاتحه هم تعلیم و هست یعنی یکی از نامش چیه؟ تعلیم المساله یعنی اونجا به ما تعلیم داده خداوند چطور سوال کنیم اول تعریف کن الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بعد از اینکه تعریف کردی رابطه خودت را با اون بیان کن که جایگاه تو چیه ایه کانعبدو و ایاک نستعین جایگاه ما اینه که فقط و فقط تو را عبادت میکنیم و فقط و فقط از تو کمک می طلبیم از کسی دیگه نمی طلبیم یا که معنی حسره یعنی از کسی دیگه نمی خواهیم. بعدن دعا می کنی اهدن از این الان بطالبه بند مطرح شد پس اینجا هم فرشتگان همون کار را کردن و مفسر نقطه عجیبی دیگری بیان فرموده بود اینجا برای بنده تازگی داشت خدمت شما عرض بکنم اون اینه که معلوم میشه بهترین دعا و دعایی که مقبول میشه بعد از انجام عمل است بعد از انجام عمل خوب عمل صالح مثلا بعد از صدقه شما میدهید بعدا دعا کن حج انجام میدی بعدا دعا کن نماز میخونی بعدا دعا کن یعنی اول دعا کن بعد نماز بخون نه اول نماز بخون بعد کار خوبی را انجام بده بعد از اون دعا قبول میشه پس بعد از هر کار خیری اگر انسان دعا بکند امید هست که دعا قبول بشه اینجا هم اول مدح و ذکر و دیاد و تسبیح و تقدیس پروردگار اول هست اول خدا را تعریف میکنی عملی هست عمل فرشتگان همینه فرشتگان شب روز کارشون چیه؟ تسبیح و تقدیس است خدا را تعریف کردن است پس ببین اول عمل را انجام دادند بعد از اینکه عمل را انجام دادند الان دعا کردند پس بهترین عمل و بهترین دعا اینه که بعد از اما لنهيكي كيشوه انجام مدهيد ان دعاره باشيد لذا ربنا وسعت كل شيء رحمة و بار اله در برغرفت هر چيز را از نظر رحمة وعلم يعني رحمة توسي علم توسي فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك چارت دعا ميكون انت بلاي يك یك مغفرت گناهان دو مخفرت از عذاب اکبر حفاظت از عذاب اکبر سه حفاظت از عذاب اصغر چار دخول بهشت فغفر للذین تابو و تبعو سبیلک ببخش کسانی را که تابو توبه کردن ای تابو من الشرک بنویسید از چی توبه کردن؟ از شرک و تبعو سبیلک وقت پیروی کردن راه تو راه توحیدی تو راه پروردگار راه توحید است یک تا پرستی هست خب این دعای اول هست مغفرت دعای دوم وقهم عذاب الجحیم این حفاظت از عذاب اکبر عذاب اکبر جهنم است از عذاب جهنم نجاتشون بده همون وطبعو که مقتضای امون و وقتی که پیرو تو بوده باید از جهنم نجات دیا دعای سوم ربنا این اعاده لبعد العهد است یک بار ربنا گفته شد بار بار ربنا گفته میشه اعاده لبعد العهد اما نکته دیگر اینه که بهترین دعا اون دعایی هست که با ربنا شروع میشه با ربنا شروع میشه به دلیل اینکه اولا این تعلیم خود پروردگار است اکثر دعاها دعاهای قرآنی را نگاه کن دعاهایی که خدا آموزش داده در پایان سوره مبارکه بقره ربنا لا تواخذنا انسينا او اخطا ربنا ولا تحمل علينا اسرا الى اخره با ربنا هستند دعاهای علیهم والسلام ابراهيم رب جعلني مقيم الصلاة رب مغلوب فانتسر رب هبلي من الصالحين رب لا فردا انسان خودش را رب مد نظر داشته باشد ربنا پس بهترین دعا اونه که در ابتدایش کلمه رب باشد از کردم به چند دلیل یک اینکه خود خدای عزواجل ذکر فرموده دو این اقرار به ربوبیت هست اقرار به توحید هست یعنی ای ذاتی که وقتی که ما بخواییم به زبان ساده خودمون، ای ذاتی که از ابتدا تا انتها مرا تربیت کردی تدریجن تدریجن به رشت و به کمال رسندی از هر نظر ای ذاتی که تمام احسان و لطف و کرم تو بر من هست اقرار میکنی وقتی که اقرار میکنی رب خوش میشه راضی میشه این ربنا یا رب خودش یک کلمه هی هست که رحمت پروردگار را به جوشش در میاره یک فرزندی از پدرش میخواد یه چیزی بخواد یکی اینه که اسم پدر را میبرد اینکه فلانی اینکه خب کمال بیادبی هست یکی میگه پدر خب این بهتره یکی کلماتی ذکر میکنه کسی که بالاخره هر در هر زبانی ادبیات متفاوت هست کسی میگه ای قبل گاه من ای محسن من ای پدر مهربان من اینه که میگی اون پدر خود به خود شوخی میکنم گاهی خود به خود جیب شل میشه خود به خود هرچی که مطالبه میکنه بد میده چون تأثیر داره کلمات لذا پروردگار را وقتی که با این کلمات زیبا صدا میکنی رحمت پروردگار به جوش میاد پس در دعا همه این نکات باید مدنظر باشد دوباره میگه ربنا و ادخلهم ای رب ما ان آنها را ان داخل بگردان جنات عدن الیتی وعدتهم اون جنات جاودانی که تو با اونها وعده کردی اون جناتی که خود وعده فرمودی در اون جنات داخلشون بگردان و من صلح من ابائهم و آنها که صلاحیت دارند از پدرانشان و ازواجهم همسرانشان و ذریاتهم فرزندان و اولادشان کسانی که صلاحیت دارند ببین صلاحیت الصلاح المصحح لدخول الجنه و صلاحی که باعث دخول جنت باشه صلاح درست ایمان است توحید است پس اینجا دعا برای اون آبا و اجدادی هست برای اون اولاد و احفادی هست برای اون همسرانی هست که اونها خودشون ایمان دارند اما درجهشون به درجه اینها نمیرسه. نه اینکه اونهایی ای که ارز کنم پدرانشون هر چی باشن فرزندانشون هر چی باشن پدر و فرزند مثل عزر و کنان اگر مشرک باشند او صلاحیت نداره به این خاطر این قید صلاحیت آمده و من صالحا من یعنی اونهایی که صلاحیت دارند ولی و ان کان دون صلاح المتبوعین درجاتشون به اندازه این درجات متبوع نمیرسه مثلا یک انسانی هست مجاهد فی سبیل الله هست دعیه الله هست عابد هست صالح هست از مقربین هست خب مشخص این مقرب خدا یک جایگاه والایی در بهش دارد بقیه قوم و خیش و تبارش یعنی پدر و آبا و اجدادش فرزند و نبا و نبیرش اینام به بهش رفتن ایمان داشتن ولی اینا در جایگاه بسیار پایینی هستن حال دعای فرشته اینه که اینها را هم ببر ورباون همراه بگردان. چنانچه حدیثی ما داریم در در رابطه با تفسیر این آیه البته در سوره رعد اونجا مفسرین ذکر کردن والذین صبر و اتقا و وجه ربهم و اقام الصلاة و الزکات تا انجا میایت جنات عدن یدخلونها ومن صلح من آبائهم و ازواجهم و هم همین آیه هست اونجا مفسرین ذکر کردند که در روز قیامت یک انسانی که مقرب بارگاه پروردگار بوده خداوند او را به بهشت میبرد به بهشت کمی رفت همه ها و همه جوایز بهش داده میشه بهترین ساختمان بهترین حورین بهترین باغ و بهترین میوه و همه امکانات فول اما چه راستش نگاه میکنه هیچ یکی را از اطرافیانش نمیبیند پدر کجاست برادر کجاست فرزند کجاست وقتی که میپرسد فرشته‌گامی که آنها همه تو بهشتند ولی اونها در جایگاه دیگری هستند مثلا تو در جایگاه دهم ده هستی در طبقه دهم ده اونا سی و این دعا میکنم میگه خدا من هر که انجام دادم من فقط برای خودم انجام ندادم برای تمام اطرافیانم و این انتظار را دارم. که اونها با من باشد خداوند تعالی دستور میده بغ... بدون اینکه این را پایین بیارید اونها را چند مرتبه و چند درجه بیارید بالا پس اونها صلاحیت ورود به بهشت را داشتند اما جایگاهشون این نبود مرتبهشون این نبود به برکت این انسان مرتبه اینها از پایین میره به بالا با اونها همراه میشد معنی این دعا هم همینه و من صلح من آبائهم و و ذریاتهم اونهایی که صلاحیت دارن از پدرانشون حمسرانشون اولادشون اونها را هم داخل بگردن انک انتل العزیز الحکیم همانا تو ذاتی هستی العزیز یعنی قادر قادر بر چی قادر بر مغفرت اینجا بس بحث بحثی چیه مغفرت هست الحکیم حکیم هستی هر کارت با حکمت هر کسی را مناسب او در جایگاهش قرار می دهی در بهشت هر جایگاهی که استقاق داشته باشه در اون جایگاه قرار میده خب اینجا سه تا دعا شدند یکی دعای مغفرت بود یکی دعا از عذاب اکبر یعنی از جهنم و سوم دعا به ورود بهشت اما دعای چهارم وقهم السیئات خدا یا را از سیئات یعنی از عذاب اصغر حفاظت کن از اون سیئات هم حفاظتشون می‌کردم سیئات چیه اهل تفسیر مختلف به صورت مختلف تفسیر کردند بسیاری گفتند سیئات عذاب هایی که غیر از عذاب جهنم هستند مثلا در عالم برزخ در قبر انسان عذاب می بیند اما این عذاب نسبت به عذاب جهنم چی بسیاری ها در همون میدان محشر غرقاً در عرق اونجا عذاب می بینند اللہ ما اشرف علی تانوی رحمت الله علی که یکی از مفسرین ماهر ما هستند ایشون در تفسیر بیان القرآن نوشته وقه مسیعات یعنی از پریشانی های میدان قیامت پس ایشون چی مراد گرفتند پریشانی های حش را مراد گرفتن پس اونمی نوع عذاب است. همه بلا تکلیف همه پریشان همه سرگردان بعضی ها تا شتالنگ در عرق بعضی ها تا زانو بعضی ها تا کمر بعضی ها تا حلق تا گردن پیش پیامبران برای شفاعت میره حدیث شفاعت شنیدید لذا پس مراد سیاد بقیه عذاب ها بقیه گرفتاری ها که ما تعبیر کردیم به عذاب اسغرد خدايا هم از عذاب اکبر حفاظتشون کن و هم از عذاب اصغر و قهم سیئات و من تقى السيئات, ومن تق السيئات فقد رحمته هر کسی که تو حفاظت کنی از در اون روز همان بر او رحم کردی و راه مورد رحمت و لطف خودت قرار دادی و ذلك هو الفوز العظیم این هست فقط این هو حسر است. فقط این هست الفوز العظیم رستگاری بزرگ کامیابی و موفقیت بزرگ اینه ذالکه مشارله ذالکه چی هست مغفرت و حفاظت از عذاب اصغر و عذاب اکبر هرچی که در دعای فرشتگان بود اون چیزی که در دعای ذالکه المذکور این که ذکر شد که انسان بخشیده بشه از عذاب اصغر و از عذاب اکبر نجات بیابد این موفقیت بزرگ هست این کامیابیه بزرگ است واقعا کامیاب اون کسی هست که مورد مغفرت و لطف پروردگار قرار بگیرد اللهم اجعلنا منهم ان الذين كفروا کفرو لمقت الله اکبر من مقتكم این عنوان چهارم است. ارز کردیم در این مقدمه چهار عنوان هستند تا عنوان ذکر شد عنوان چهارم اینه که وقتی که این حکم هر کسی این حکم نامه را تسلیم نکرد این آین نامه را تسلیم نکرد قرآن را قبول نکرد برآن خشم و غذب الهی هست و در جهنم وقتی که میسوزد و این انسان بر خود عصبانی هست، اونجا بهش گفته میشه ای انسان امروز چقدر بر خودت عصبانی هستی؟ اون روزی که در دنیا کفر میکردی، انکار میکردی، کلام ما را نپذیرفتی، نسبت به توحید ما پشت دادی، اون روز خشم خداوند از زوجل و عصبانیت خداوند بر تو، از این عصبانیتی که خودت بر خودت امروز داری بیشتر بود لذا این حسرت و این ندامت برای چه کسانی هست برای کسانی که این حکم نامرا نمی بازیران آنها به چی یاد می شوند به کفار یاد می شوند. الله می‌فرماید: ان الَذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَقْتُ الله. همانا کسانی که کوفت کردن اونها مورد ندا واقع می شوند صدا زده می شوند دستوی پروردگار به وسیله ملائک لمقت الله لام لام تعکید هست حقا که خشم الهی و غزب الهی و نارضایتی پروردگار اکبر من مقت کم این لمقت الله مبتدا هست اکبر من مقت خبرش هست بزرگتر است از خشم شما بر خودتون ممقتیکم انفوسکم از خشم شما بر خودشما در روایت ها می که مقت و عصبانیت خودشون بر خودشون به اندازه هست که دستهای خودشون را دست به زیر دندان هست و دستهای خودشون را با دندان و دهان گاز میگیرند و دست خودشون را زخمی و قط می کند لذا وقتی که این حالت دیده میشه، اونجا گفته میشه بهشون که خشم الهی ولی در دنیا ولی خداوند شما را عذاب نداد خداوند شما را مهلت داد اکبرم مقتکم انفسکم بزرگتر بود از خشم شما بر خودتون ازتدعون الال ایمان این سبب مقت است سبب خشم الهی هست زمانی که فراخانده می شدید به سوی ایمان فتکفرون، فرون بعد از فراخاندن بعد از دعوت شما چی می کردید کفر می کردید انکار کردید لذا خشم الهی بر شما بیشتر هست ولی اونجا مجرمین چیکار میکنند اول اقرار میکنند بعد از اقرار هدفشون از اقرار چیه؟ تسهیل است، خروج هست و نجات هست ولی فایده نداره کاش در دنیا اقرار میکردید کاش در دنیا به اشتباه خودتون پی بردید. اونا چه اقرار میکنن؟ قالو ربنا امت تنثنتین و احیی تنثنتین میگویم بار الهه مارا دوبار مرگ دادی موت دادی و احیی تنثنتین مارا دوبار زنده کردی دوبار موت و دوبار زنده کردن ببین دوبار موت مثلاقش چیه گچه مصادقی مختلفی ذکر کردن ولی اون چیزی که اهل تحقیق و بیشتر مفسران ذکر کردن جمهور ذکر کردند دو موت موت اول زمانی که انسان به وجود نیامده آدم اون تعبیر به موت شده همین که ما نبودیم بعضی میگوین نه اون زمانی که انسان در شکم مادر بود در حد مزغه بود تک گوشت بود هنوز روح داده نشده بود خب جسدی هست بلا روح این موت است. موت یعنی همین جسدی که باشه و روح توش نباشه قبل از این که حیات داده بشه اون حالت حالت موت اول هست و حیات اول همینه که انسان حیات پیدا کرد در رحیم مادر در شکم مادر و بعدا با همون حیات وارد دنیا شد پس حیات اول حیات دنیا است و دو موت دوم موتی که ما در دنیا برای هر یک از مامیت پس این دوتا موت شد و یک حیات و حیات و حیات دوم حیاتی هست که روز قیامت خدای عز و جل انسان ها را دوباره زنده می کند دوباره انسان ها را از قبر بلند می کند با نفخه دوم اسرافیل اون حیات دوفم هست چنانچه مفسرین نوشتند قال ابن تفسیر قرطبی اینه ذکر کرده قال ابن وابن عباس وقتاده والضحاك كانوا امواتا في اصلاب آبائهم ابتدائا كمرده بودند در اسلاب همون نطفه مرده دیگه روح ندارت ثم احياهم قدامون النهار زنده کرد در شکم مادر و هم حيات دنیا ثم اماتهم الموت التي لا منها في الدنيا موت دوم همین موتی که چاره نیست که باید بمیرد تو دنیا ثم احیاهم للبعث والقیامه دوباره بعد از اینکه بعث فرمود بلند کرد از قبرها و برا قیامت این حیات دوم هست فحاتان حیاتان و موتتان پس این دوتا حیات شد دوتا موت شد و می فرماید این نظیر اون آیه میشه. در سورية بقرهس وهو قوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا أي في أصلاب آبائكم فأحياكم في الدنيا ثم يميتكم بعد الدنيا ثم يحييكم في الآخرة قلت بي لذا اینها دو تا موت دو تا حيات اقرار میکن و حیات مجرمین اقرار میکنن ربنا امت تناسنتین و احیی تناسنتین بر ایلاها ما رد موت دادی و دوبر حیات دادی فعترفنا به ذنوبنا ما اعتراف میکنیم به گناهانمون فهل الی خروج من سبیل این مقدمه هست فهل الی خروج من سبیل مطالبه هست فکر میکنه کسی که اقرار بکنه دیگه بخشیده میشه فهل الی خروج من سبیل این استفام را میگن استفام طلبی استفامه گاهی سوال را طوری مترح میکنی که از طرف یه چیزی میخواهی مثلا مثلا کسی را میگه یک لیوان آب به من میدی مانش چیه یعنی بده دی. این استفام استفام طلبی هست فحل اله خروج من سبیل رای هست برای بیرون رفتن از اینجا در آیات دیگه هست که مطالبه میکنن بار ما را برگردان به دنیا منظور از راه بیرون رفت چیه رفتم به دنیاست فرجعنا نعمل صالحا فرجعنا نعمل صالحا ما را برگردام اما خداوند چی جواب میده ذالکم بی انه اذا دعی الله وحده کفرتم خداوند جواب را ذکر نکرده علت جواب را ذکر این علت جواب را وقتی که ما و تو می خود به خود جواب را می فهمیم چیه جواب مقدر ای لا سبیل من خروج لا سبیل الی خروج یا لا من سبیل للخروج هیچ راهی برای خروج شما وجود نداره چرا اونجای که مهلت داشتی اونجایی که فرصت داشتی اونجایی که پروردگار هرگاه یاد می شما کفر می کردید ببینید کفر ما در مسئله اله در مقدمه خواندیم که مشرکین با پروردگار کفر نکردند خود خدا را قبول داشتند خدا را به عنوان بزرگترین خدا قبول داشتند برای همون خدا حج هم میکردند برای خدا خیرات هم میدادند و جعلو لله مما ذرء من الحرث والانعام نصيبا هم بخشی از گندم ها را میدادند جو میدادند گوشت فندان شترها پس خدا را قبول داشتن به کف خدا کفر نکردند به چی کفر میکردند به توحید خدا کفر میکردند اختلاف روی وجود خدا نبود وجود خدا را اقرار داشتند اختلاف روی یگانگی خدا بود فقط فقط خدا برای عبادت اونا میگفتن نه هم خدا و هم غیر خدا لذا الله عزوجل هم اینجا همین علت را بیان فرموده نه اینکه شما به خدا کفر میکردید ذالکم یعنی اینکه راهی برای خروج نیست علت اون است ذلکم این علت جواب است به انو اذا دعی الله وحده کفرتم به سبب این است که هرگاه الله خوانده میشد به تنهایی اذا دعی الله وحده پس اختلاف روی وحده بود روی توحید بود کفرتم شما انکار میکردید شما انکار می کردید ببین تفسیر قرطبی و تفسیر مدارک اینجا کلماتی نوشتن و فی الکلام مطروکون بخشی از کلام اینجا مطروک شده ولی فهمیده میشه. شه تقدیره فا اجیبو بیال لا سبیل الى الرد اونا وقتی که میگن فحل الى خروج من سبیل در آیه دیگه است الى مرد بازگشت جواب داده میشه لا سبیل الى الرد بازگشتی نیست وذلك لانكم اذا دعى الله وحده الى اخر قرطبي گفت. بله. و تفسیر مدارک میگه وذلک بسبب کفرکم بتوحید الله و ایمانکم بالاشراک به. نسبت به توحید خدا کفر میکردید، نسبت به شرک به خدا ایمان داشتید. میگفت خدا رو هم کن، دیگران رحم هم کن. از خدا هم بخوا، دیگران هم بخوا. پس ازا دعی الله وحده به تنهای خدا فریاد زده می شد شما کفر کردید و این یو شرک بهی اگر با او شریک ساخته می شد قرار داده می شد هم خدا را بخوانيد هم فلان را بخوانيد تو امنو شما ایمان می آوردید شما قبول می کردید پس مشکل شما کفر هست فالحکم الله العلی الكبير اینجا حکم برای کی هست اینجا فیصله ابدی منظور از فیصله ابدی چی فیصله جهنم دیگه که برای شما مشرکین این فیصله شده این حکم لله لام لام اختصاص است یعنی اونایی که شما عبادت کردید اونایی که شما پرستش می کردید اونا اینجا هیچ حکمی ندارند اونا اینجا هیچ جایگاهی ندارند اونا هیچ محلی از اعراب ندارند فالحکم لله العلی الکبیر حکم برای الله است اون الله که العلی بسیار برتر است بلندتر از از هر کس بزرگ است هم برتری دارد هم بزرگی دارد حکم مال اون الله هست مال اون معبودانی که شما برایشون نظر و نیاز میدادید برایشون نیست هو الذی یریکم آیاته و ينزل لکم من السماء رزقا الله عز وجل چندار آیات گوزشت ما خاندیم هم موضوع توحید بود و هم تهدید بود حال مجدد همون موضوع تکرار میشه اینجا پروردگار ترغیب میده بسوی توحید اما همراه با دلائل اینجا دلائل اشاره به دلائل شده گوی ترغیب هست بسوی پذیرفتن حکم نامه این آیین ما را این حکم پروردگار را تسلیم بشید قبول کنید الله عزتی اس به شما نشان میده آیات خودش را معلوم میشه که ذکر توحید بدون آیات و دلائل نیست دلائل خدا نشان میده به شما دلائل عنوان می برای شما یوری آیاتی آیاته آیات الهی کم نیستند انسان اگر کوچکترین تدبر و تعقلی داشته باشد هر طرف را بنگرد هر طرف را تماشا بکند آیات می‌بیند آسمان را نگاه بکن زمین را نگاه بکن چپ و راستت یا کوه است یا دشت است یا دریا است همش آیات یا حیوانات هستند یا فر انسان ها هستند یا پرندگان هستن. یا چرندگان، همه اینها آیات الهی هستند لذا هو الذي يوريكم آياتي هي آياتي كه داللي برتويد اينار آيا غير خدا كسي نقشي داشته كسي کوچکترین تاثيري داشته کشوه اونها رو میخانيد و ينزل لكم من السماء الرزقه و نازل فرموده برای شما از آسمان رزق نازل فرموده از آسمان آيا مستقیم برای ما رزق ميريزد؟ مستقیم نان و گوشت نه رزق منظور سبب رزق است مراد. مراد ذکر مسبب است ولی مراد سبب است و ما یتذکر الا من یونیم واقعا آیات الهی آیات معزه هستند آیات پند هستند آیات تذکر هستند اما از این آیات چه کسی تذکر می گیرد اون کسی که در دلش عناد است در دلش تعصب است در دلش زد است هرگز و ما یا تذکره الا من یونیب پند حاصل نمی کند مگر کسی که انابت داشته باشد کسی که حق طلب باشد بسیار تفسیر کردن الا من یتوبه من الشرک خب نتیجه انابت توبه از شرک است اما اصل انابت هم عرض کردم اینه که انسان تعصب را از خود خارج بکند واقعا دنبال حق باشد دنبال حقیقت باشد آیات الهی را بین گرد دنائل پروردگار را نگاه بکند تا زمانی که انسان بر تعصب باشد این انسان هیچ وقت هدایت نمیشه بس وما یتذکروا الا من یونیب فَإِنَّ الْمُعَانِدْ لَا يَتَذَكَّرْ وَلَا يَتَّعِذْ تفسیر مدارک می فرمائید کسی که اهل عناد باشد نتذکر می گیرد ونموعز حاصل می کند این آیت تعیید می با آیات دیگری تفسیر آیه بالآیه بعضی جهہ اشاره میکنم الله تعالی تعالیٰ می فرمائید که الله یجتبي إليه من يشاء و الیه من ينيب خداوند بر برای ایمان برای بندگی خالصانه کسانی را که خدا برمی میگزیند خدا بخواهد کی را خدا میخواهد ارز کردم صبحم ارز کردم این نیست که بلاخره هم ایمان جبری باشه هم کف جبری باشه خداوند یکی را انتخاب میکنه یکی را رد میکنه نه خداوند به قلوب نگاه میکنه و یهدی ادامه همین آیه هست گویا تفسیری این آیه است و یهدی الهی منیونیب هدایت میشه راهنمایی میشه کسی که در درونش انابت باشه یعنی گویا خداوند قلوب را نگاه میکند هر قلبی که پر از تعصب است پر از بغض پر از اداوت هست اون را خدا نمی پذیرد قلبی که در اون انابت هست واقعا جستجوی حق را دارد اون را الله می پذیرد و همچنین من خشی الرحمن بالغیب من خشی الرحمن وجاء بقلب منیب من خشی الرحمن از خدا می ترسد وجاء بقلب منیب قلب منیب داشته باشه. یا تبع سبیل من اناب کسی که انابت دارد پس الله عزوجل میفرماید از این آیات ما کیوریکم آیاته آیات دال بر توحید هستند آیات بر وحدانیت پروردگار هستند از این آیات چه کسی استفاده کند چه کسی موعظ حاصل کند چه کسی راه هدایت را میگیرد کسی که منیب باشد نه متعصب متعصب ولو اینکه خرواری از علم داشته باشد همه کتاب های دنیا را عبور کرده باشد هم حافظ تورات و انجیل و قرآن و زبور و غیرهم باشد اما در درونش چون تأثب هست او هیچ وقتی هدایت نمیشه نمونهاش را داریم علماء یهود که علماء بزرگ بودن حافظان تورات بودن تک تک علائم را میدونستند علائم نبی خاتم و آخرین پیامبر خدا را میدونستند اما وقتی که رسول الله آمد اون تعصب قومی نگذاشت اما جهلای عرب که قبلا جهلای عرب بودند بعدن یاران رسول الله شدند این جهلای عرب پذیرفتند بدون علم پذیرفتند چون دلشون پاک بود در دل انابت بود واقعا دنبال حق بودند پس اصلش اینه که قلب انسان در قلب انسان انابات باشد هر کسی که در درونش تعصب خوش و خالی باشد هیچ وقت قابل هدایت نیست قرآن این را میگه اگر میخواهیم هدایت بشیم واقعا تعصب را کنار اینه که تعصب را کنار بذاریم کتاب خدا را بدون هیچ نوع شرحی و بدون هیچ نوع تفسیری که بعضیها تفسیری کج بیکنن ببینیم از اول تاخیر خداوند درباره توحید، درباره یک تاپرستی، درباره بیداری از شرک، درباره اینکه در هر حاجت و در هر مشکل فقط و فقط خدا را بخوانید صحبت می‌فرمایند. فدع الله مخلصین له الدين ببینید بعد از اینکه خداوند فرمود دلائل هست از این دلائل چه کسانی استفاده می کنند اهل انابت بعد از اون متسلن اون مدعا را ذکر فرمود عرض کردم مدعای سور همینه فای فسیحه فا هست یعنی اذا کان الامر کذارک وقتی که امر چنین هست وقتی که مسئله چنین هست پس ای بندگان من فضع الله بخانید الله را فریاد بزنید الله را اما نخاندنی که عموماً بعضی از شما میخانید بلکه مخلصین اله الدین خالص دعا را برای خدا اختصاص بدید نه غیر خدا مخلصین اله الدین خدمت شما ارز بکنم که دین در قرآن کریم به چندی معنا میاید دین به معنای اسلام می همین طریقه و روشی که همه ما الحمدلله داریم الطریقه المسلوکه طریقه که پیامبر خاتم و رحمت للعالمین برای امت آخر به ارمغان آورد دین اسلام ان الدین عند الله الاسلام و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من اليوم اکملتو لكم دینا و عليكم علیکم نعمتی و رضیتو الاسلام دین, دین به معنی دین اسلام یک معناش اینه معنی دوم دین به معنای جزا روز قیامت روز جزا مالک یوم دین چند جا به این معنا هم در قران کریم بکار برده شده دین به معنای جزا میاد سوم دین به معنای عبادت هم میآید دین به معنای عبادت هم میآید در سوره زمر که صبح یاد کردم هست فعبد الله مخلص الله الدین همه مفسرین تفسیر کردن ای فع الله مخلص الله العباده خدا را عبادت کن چگونه عبادت کن خالص عبادت برای خدا باشد و معنای چهارم دین به معنای دعا جناچیداری نه ایست فدع الله مخلصین له الدین ای فدع الله مخلصین له الدعاء اینجا دین تو دعا است گرچه دعا هم بخشی از عبادت است اگر به اون از اون لحاظ نگاه بکنیم سه تا میشه عبادت و دعا یکی است چون الدعاء هو العباده رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود الدعاء مخ العباده در روایط دیگه هست مغز و اساس و اصل ابادت دعا است فقط خدا را فریاد زدن فقط خدا را از خدا خاستن نمازم از اول تا آخر دعا هست شما مگر در حرکت دعا نمیکنید اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالن. اول نماز هم دعا آخر نماز هم دعا وقتی که تحیات را تمام میکنی بعض هم دعا میکنید وسط نماز در حالت سجده هم بهترین جایی که دعا قبول میشه حالت سجده است رسول الله صلی الله علیه وسلم در سجده هم دعا کردند پس نماز که عبادت است و مظهر تمام عبادت ها هست در نماز هم دعا هست عبادت تو دعا یک چیز هست پس وقتی که دعا عبادتی هست گونه که عبادت برای غیر خدا حرام هست و شرکه دعا از غیر خدا همچنین خواستن از غیر خدا همچنین انسان فقط باید از خدا بخواد چرا چون الله فرموده فدعوا الله مخلصين له الدين شما از خدا بخواهید دعا کنید و فریاد بزنید الله را در حالی که خالص قرار بدهید برای او دعا را یعنی از کسی دیگه نخواهید آیات زیادی هست ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك غیر از الله و نهی که ما نفمیدان به شما ضرر میدهند از اونا نخواهید ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم ان های که شما بغیر از خدا از آنها میخواهید بندگانی مثل شما هستند خوب توجه بفرمایید انجا نفر مود ان الذين تدعون من دون الله هم خشب مسنده هم احجار لا روح فيها سنگان درختن نه چون که اونها بندگان را عبادت میکردند ان تدعون من دون الله عباد امثالكم اونها هم بندگان مثل شما هستند ولی بعضی از اونها خاصان خدا بودن خیلی خدا رو عبادت کردن خدا ازشون راضی گشت خدا به اونها خلعت داد ولی اونها خدا نیستند چرا اونها رو میخونید شما چرا خدا رو نمیخونید همون خدایی که اونها خواندند همون خدایی که عیسی مسیح اون خدا را فریاد زد و شب روز دعا میکرد اون خدایی که ابراهیم همون خدا را فریاد میزد اون خدایی که نوح علی السلام خدایی که محمد صلی الله علیه از او خدا خاص چرا شما از اون خدا نمیخواید از خود این پیامبران میخواهید پس فد الله مخلصین له الدين خدا را فریاد بزنید خدا را صدا بزنید خدا را در حالی که خالص برای او قرار بدهید دعا را فریادتون را ولو کریه الکافرون گرچه نپسندند کافران کافران چرا نمی پسندند؟ ای اخلاصکم کافران چرا را نمیپسندیدن؟ اخلاص را اخلاص یعنی فقط خدا را صدا زدن اخلاص به این معنی از چی نارهد می از این که بگی فقط خدا و, ازا و اذا ذکر الَّذین و اذا ذکر اللہ وحده اشمعزد قلوب الَّذین لا يؤمنون بالعقرد تنها خدا منقبض بیشی دلشون گرفته بیشی دلشون اونای که ایمان بیعقرد ندارن. اما و اذا ذکر الَّذین من دونه غیر خدا دیگران رو وقتی که ذکر میکنی، یاد میکنی کنی هم یستبشرون خوشحال میشن، پس این اخلاص را اونا نمی پسندند این فقط خدا را صدا بزنی اونا نمی پسندند دوست ندارند ولو کری ها گرچه کافران نپسندند اخلاص شما را ولی شما فقط خدا را صدا بزنید غیر از خدا از کسی دیگه شما نخواهید اون اللهی که رفیع الدرجات اون اللهی که درجات بسیار بلند و بالایی دارد ظلعرش دارای عرش است اولا رفیع الدرجات دو معنا میتونه داشته باشه چندین معنا ولی اینجا دو عرض میکنم. یکی این که رفیع به معنی مرتفع هست و درجات به معنی صفات هست رفیع و درجات ای مرتفع و صفات خداوند صفاتش بسیار بلند و بالا هست و یکی ای دیگه اینکه رفی سیغه صفت است به معنی بلند کننده و درجات مراد درجات مومنین هستند درجات بندگان قاس یعنی خداوند ذاتی هست که درجات شما را در بهشت بلند می کند. یکی از دیگری بالاتر ظلعرش دارای عرش است. عرش گست, گست یکی از مخلوقات الهی هست که یکی از مظاهر قدرت پروردگار هست انگونه که در وصف عرش میاد در روایت ها انسان این بزرگی و عظمت زمین و آسمان و همه و همه را فراموش میکند اینها در مقابل عرش ای هم نیستند و مفسری میفرمایم بیشتر وقتی که عرش گرچ عرش از نظر معنای لغوی به معنای تخت میآید. یه پادشاه یک تختی دارد که روش میشیند عرشی دارد بس علماء می فرماد کنایه از ملک و از پادشاهی و از قدرت بروردگار است دارای عرش از دارای ملک است دارای قدرت است یلقی الروح من امره على من یشاؤ من عباده القامی فرماید الله عز و روح را از روح وحی هست وحی مثل روح سبب حیات میشه ببینید یک جسم مرده مرده وقتی که روح تشبیهت چی میشه زنده میشه وحی را داده به روح همونطور که روح سبب حیات مادی میشود سبب حیات جسمانی میشود روح وحی سبب حیات معنوی میشه حیات روحانی میشه یعنی کسی که ایمان ندارد او مرده است. خداوند کم جا کفار را به مردگان تشبیح داده خیلی جا او من کان اون کسی که مرده بود ما چکار کردیم او حیات دادیم چی کسی مرده کسی که ایمان نداره حیات دادیم یعنی بهش چی دادیم ایمان دادیم پس ایمان از طریق چی میاد؟ از طریق وحی میادید ایمان از طریق وحی کسی میخواد ایمانش را درست کند با این وحی الهی درست کند نه با این کتاب و کتابی که ما مولاها نوشتیم ایمان ترا درست بکن با کلام الهی با وحی الهی پس الله عزوجل میفرماید یلقی الروح روح را القام میفرماید من امره یعنی من فضله فضل خودش بر هر کسی که بخواهد از بندگانش منظور رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اگر مراد رسول الله باشد مراد از روح قرآن است اگر مراد همه انبیا باشند اون وقت شامل رسول الله میشه شامل انبیا دیگه اون وقت مراد از روح قرآن تنها نیست مطلقا وحیه است قرآن هم وحی هست بس همان گونه که روح ارز کردم سبب حیات مادی میشه وحی سبب حیات روحانی میشه یلقی روح من امرهی من یشا بفضل خودش بر هر کسی که از بندگانش بخواهد القا فرماد لیون دیر التلاق این فریزه اون رسول است یا رسول است پیامبر خودش را وحی میفرسته بر او او را با برای بندگان میفرسته تا اون پیامبر چیکار بکنه فریزه تو رسول تا کہ بیم بدهد از روز ملاقات لیون در یومت طلاق روزی که با هم دیگه ملاقات میکنیم ما انسانها از صدر تا آخر هم با هم دیگه ملاقات میکنیم روزی که ما با پرواز هم ملاقات میکنیم اولین و آخرین با هم ملاقات میکنن. اون یوم تلاق از سیغی تفاعل هست تلاقی را از دو طرف میتلبت همدیگر را دیدن اون چه روزی هست یوم التلاق مبدل منه هست یوم هم بارزون روزی که اون انسان ها همه بارزون یعنی ظاهر میشن بعضی گفتن بارزون ای خارجون من القبور همه از قبرهایشون خارج میشن بعضی میگن نه بارزون همه ظاهر میشن در اون میدان حشر بروز پیدا میکنن همه ظاهر میشوند لا يخفى على الله منهم شيء مخفی نمیماند بر الله از اونها چیزی هیچ کسی مخفی نیست هر انداز جمعیت هست صدها و هزاران میلیارد باشد الان که ما موجودیم هشت میلیاردیم در هر قرنی همین اندازه بوده و خواهد بود خدا بهتر میدونه جمعیت به چه قدر برسه تا آخر دنیا همه اونها در محضر الله حاضر میشند اینجا اگر کسی غایب از صد نفر استاد نمیدونه که غایبه اونجا الله عزوجل می فرماید برالله هیچ چیزی مخفی نیست کسی نیست که اونجا بماند لمن الملک اليوم الله، اونجا گفته میشه پادشاهی امروز مالکیه ملک و سلطنت امروز قدرت امروز در دست کی هست در دنیا انسان ها ادعا داشتند اما روزی میرسد که وقتی که خداون این سآل را می کند هیچ کس جرعت پاسخ دادن حتی ندارن میدونن جوابش چیه همه میدونن جواب چیه لمن الملک کلیوم اینجا در قرآن میخانیم که این سؤال در روز قیامت میشه اما در روایتها داریم که این سؤال ما بین النفختین میشه علماء میفرمایند هر تو جاییچ نوتزاد دی با هم دیگه ندارد اونجا هم الله تعالی سوال میکنه اینجا هم الله تعالی سوال میکنه ما بین اون نفختین یعنی وقتی که نفخه اولاد دمیده میشه زده میشه همه انسان ها میمیرند هیچ کسی زنده نمیماند بعدن خدا فرشتگان را هم از بین میبرد کسی دیگه باقی نمیماند بغیر از ذات پروردگار کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام انجا پروردگار سوال میکنه لمن الملك اليوم هیچ کسی جواب بده. خود پروردگار جواب میده لله الواحد القهار از حدیث اون سوال و جواب ثابت از آیه این دومی ثابت وقتی که همه در میدان حاشر جمع می شوند از قبور خارج می شوند الله سوال می کند لمن الملك اليوم جوابش را پروردگار می ده لله الواحد القهار برای الله ان الله کی یگانه است و ان الله کی مسلط است بر همه قادر هست و مسلط است اليوم تجزا کل نفس بما کسبت این قایده هست این ظابطه هست این قانون هست اون فضل پروردگار به جای خود اما خداوند بسیاری جاها به فضلش هم اشاره می فرماید همین صبح شما خاندید غافر الزمب و قابل این اشاره به فضل به غافر الزم بدون توبه هم می بخشت. ولی اینجا قایده را ظابطه را به هم می فرماید اليوم تجزه کل نفسیم به ما کسبت امروز جزا داده میشه به کیفر اعمال میرسد هر نفسی آنچه که کسب کرده اون که حاصل کرده لا ظلم اليوم ظلم امروز نیست این لا لای نفی جنس است اصلا زلم جنس ظلم از بین میره ظلم کلا ناپدید میشه لا ظلم اليوم مطرح میشه این همه خلاقی این همه بندگان اینا چطور حساب و کتاب میشند اینا چطور محاسبه میشن؟ فقط بعضی دولت ها میخواند یک آمارگیری بکنند که چند نفر نفوس داریم در یک کشوری کوچک چقدر طول میکشه چقدر چند ماه طول میکشه این انسان های اولین و آخرین اونجا خدا بخواد اینا حساب بکنه معلوم نیست که چند میلیون سال طول بکشه الله نه، ان الله سریع الحساب الله زود حساب میکرد در روایت دیگه در روایت میاد در تفسیر آیه که در ظرف نیم روز خداوند حساب و کتاب را تمام میکند حساب زود به پایان میرسد و تکلیف هر یکی مشخص میشه وَأَمْذِرُهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظِيمٌ مَالِ الظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعَ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقبلون بشيء إن الله هو السميع البصير صلى الله عليه اللهم صل على محمد در آیات گزشتی در ارتباط با موضوع ترغیم بسوی پذیرفتن حکم نامه و آئین نامه خاندیم که پروردگار عز و جل برای اینکه بندگان به ایمان و توحید و غزیرش قرآن مجید برسند اولا هو الذی یریکم آیاته آیات مختلف آیات و آیات متعددی را به انسان نشان میدهد و ینزل لکم من السماء رزقا و انسان رزق و روزی این رزق و روزی که از آسمان می آید این هم خودش یکی از آیات هست ضمن این که حاجت انسان برآورده میشه و سوم یلقي الروح من امره على من یشاء به هر یکی از بندگانش که بخواهد مثل حضرت محمد صلی الله عليه و وسلم لسوء انها وحي را القامي فرماید قرآن را نازل می فرماید يك تفسير روح قرآن بود بعد از انك ان حضرت صلى الله عليه وسلم را برسالت مبعوث فرمود وقرآن را نازل فرمود هل از ان آية وانذرهم يوم العازفة فريزي نبوی ذكر مشه خداوند که ایشون را به عنوان رسول فرستادند و قرآن را بر قلب ایشون القا فرمودند و وحی فرمودند وظیفه ایشون چیه؟ ایشون باید چی کار بکند؟ خداوند عزو میفرمد همان گونه که همه پیامبران از روز بس و از روز معاد مردم را ترسانیدن بین دادن شما هم حاکذا و اندرهم یوم الازفه اینها را بترسانید از روز آزفه آزفت تفسیرش چیه یا معناش چیه معنی آزفه از نظر لغوی چیزی که نزدیک باشد کی چیزی که قریب باشد در آیه دیگه آمده نزدیک شد نزدیک شونده پس مراد چی هست اون روزی که نزدیک هست بیشتر مفسران تفسیر کردن به روز قیامت بعضی گفتن نامی از نامهای قیامت هم آزفه هست چرا بهش آزفه میگویند و اینما عبر عن القیامت بالآزفه لعجل ازوفها ای قربها چون که قیامت نزدیک دور نیست اقترب للناس حسابهم اقتربت الساعة قیامت نزدیک حساب مردم نزدیک برای ما دور هست خدای عزوجل که همی عالم را تحت نظر دارند الله تعالی میدونند که نزدیک هست پس به این خاطر قیامت را میگویند ازفه بس و انذرهم یوم الازفه معنیش هست و انذرهم یوم القیامه شما اینها را شما از روز قیامت که آمدن اون قیامت نزدیک هست بترسونی اما بعضی دیگه میگن که آزفه به معنی موت هست گرسی آزفه به معنی نزدیک تفسیرش به موت چون مرگ هر انسان نزدیک دور نیست خدا می دوند که اون اجلا که میرسد لذا ای پیامبر اینها را از روز مرگ بترسان چونکه چون که مرگ وقتی که بیاید همه فرصت ها از انسان گرفته می شید. فرصت توبه فرصت عمل کردن فرصت رجوع الله همه گرفته میشه پس بترسان اینها را از اون روز اون روزی که نزدیک است و خداوند از زوجل درباره کیفیت اون روز می فرماید اذا القلوب لد الحناجر وقتی که دلها در حنجره قرار میگیرد، این اصطلاحی هست از عجز عن الكلام وقتی که حالت سخت باشه ما تو محاوره خودمون تو زبان خودمون میگه وقتی که خیلی سخت باشه میگه نفسم به بینی بند آمد من اینه که خیلی بر من سخت شد این هم کنایه از شدت هست کنایه از سختی هست کنایه از حول هست که اذن قلوب و لد الحناجر وقتی که قلبها دلها در حنجره قرار می گیرد یعنی قلب از جای خودش منتقل می شه اینجا میاد در گلو بند می شه یعنی انسان نمیتونه هیچ چی بگه انسان نمیتونه هیچ کاری بکنه گلوش خشک می شه کاظمین کاظمین یعنی انسان پر از غم هست غمی خودش را فرو میبرد اینجا کازم به معنی فرو بردن غم هست بعضی گفتن کازم از ساکت حال امتلائه غم من و غیزن کازم یعنی کسی که ساکت هست و پر بغض، پر غمه پر اندوه هست نمیدونه چه کار بکنه اگر الله میفرماد از اون روز بین بده اگر من حمیم ولا شفیعی اگر در دنیا غیر خدا را پرستش میکردی ای کسی که به شریک گرفتی اون روز هیچ دوستی نداری هیچ سفارش کننده‌ای نداری چون مشرکان یکی از انگیزه های عبادت غیر الله شون اینه شما قبلا خاندی در مقدمه و مسئله اله یکی از انگیزه های عبادت غیر الله اینه که هر وقت به سختی گرفتار بشیم اینها ها شفاعت ما می کنند سفارش ما می کنند الله می فرماید مال الظالمین برای ظالمان نیست من حمیم، من هیچ نوع دوست سمیمی دوست سمیمی منظور همون کسی که یاریت بکنه چون دوست سمیمی در دنیا دست انسان را میگیره در زخی ها کسی که دستت را بگیره کسی که معین و ناصرت باشه ولا شفیع و نه سفارش که اطاعت ازش اطاعت بشه کسی که سفارش او پذیرفته بشه و حرف او گوش کرده بشه در اون روز ندارند ظالمین هیچ چینی پردیران بعضی از افراد مثل معتزله تو اللہ میدونم معتزله گروهی هست که معتقدن کسانی که مرتکب گناه کبیره میشوند اینها از دایره ایمان خارجند و اینها به جهنم میروند و برای عبد در جهنم میمانند اونها از این آیه یک برداشت غلط دارن میگویند مال ظالمین یعنی کسانی که ظلم کردن برای اونها هیچ دوستی نیست و هیچ سفارش ای نیست معلوم میشه میگویند ظلم یکی از گناهان بزرگ است میگویند که معلوم میشه که مرتکب کبائر مرتکب ظلم برای همیشه تو جهنم میماند اقیده اونها اینه که کسی که مرتکب گناه کبیر شده اون از دایره دین خارجه اون برای همیشه تو جهنم خارج نمیشه حتی هیچ کسی نمیتونه سفارشش را بکند. چون به سبب ارتکاب کبائل ارتکاب گناه کبیره او کافر شده او از دین خارج شده اما اهل سنت معتقد است که کسی مرتکب گناه کبیره میشه گناه بزرگی انجام میده این گناه گناه هست و گناه او را به جهنم هم می برد اما گناهکار تا ابد تو جهنم نمی ماند گناهکار به سبب گناه از دایره ایمان خارج نمیشه. مسلمان اگر گناه بکند علی اعزو بالله زنا بکند مسلمان می ماند کافر نمیشه با زنا کردن اونها میگن نه از دایره ایمان کلن خارج میشه. خب اونا از اینجا استدلال میگیرند ببینید ظلم یکی از گناهان کبیره هست و خداوند فرموده برای ظالم هیچ نصفارش کننده وجود ندارد ما در پاسخ اینو عرض میکنیم که اینجا ظلم به معنی شرک است اینجا ظلم به معنی این ظلم کردنی که بعضی از ما بر بعضی میکنیم این نیست سیاق آیه سباق آیه ما قبل آیه ما بعد آیه کلا درباره چیه درباره شرک است درباره توحید است پس مراد از این ظلم اون ظلمی که شما برداشت کردید نیست مراد از این ظلم شرک قرآن خودش میفرماید ان الشرک ظلمون عظیم پس مراد شرک بله مشرک قابل بخشش نیست به این خاطر ما تفسیر میکنی مال ظالمین من حمیم برای مشرکان نیست هیچ نو دوست سمیمی ولا شفیع و هیچ سفارش کننده‌ای که اطاعت از اطاعت بشه يعلم خائنة وما تخفي الصدور در ذهن کسی شاید این سوال ایجاد بشه که انسان این همه گناه انجام داده این همه اشتباه کرده این همه گناهان چطور ثبت و ضبط میشن از کجا میدونند که این فرد این همه گناه کرده کسی 50 سال 70 سال 80 سال عمر میکنه این 80 سال خب کم انسان اشتباه نمیکنه چطور همه این ها رو میدونه خداوند میفرماید این گناهانی که انسان علنی میکند به جای خود اون گناهانی که مخفیانه میکند با گوشه چشم اگر گناهی انجام میده در قلبش اگر گناهی که در قلب گناه قلب پوشیده هست مثلا در دل کسی شرک است در دل کسی نفاق است در دل کسی بغض هست اینو منو شما نمیدونیم خدا که میدوند که در این قلب چیه لذا فکر نکنید که گناهان از خداون مقبی میماند می یعلم خائنة الاعیون میداند خیانت چشمها را اصلش هست ال اعیون الخائنه چشمهایی که خیانت کننده هستند ال اعیون موصوف از خائنه صفت است، اما اینجا اضافت صفت به سوی موصوب شده خداوند میداند داند چشمهای خیانت کنندر و ما تخفی صدور و آنچه کسینها مخفی می کند اون چیزی که در دلها مخفی و پوشیده هست همه را الله می داند و الله یقضیب الحق خداوند فیصله به حق می کند فیصله پروردگار به حق هست و هیچ ظلمی بر کسی نمیشه. اما ای مشرکان کسانی که شما فریاد میزنید یا کسانی که مشرکان انها را فریاد میزنند، اونها هیچ نو حکمی، هیچ نو قضاوتی، هیچ نو فیصلی نمیتونم بکنم. والذین يدعون من دونه لا يقضون بشيء انهایی که فریاد میزن غیر از خداوند را لا يقضون بشيء كوشك تارين چيزي لونها في زلنا ميكونا يعني كوشك تارين اختياري در دستشون نيست لا في الأمور الحقيقة أحقيرة ولا العظام ندر كارهاي كوشك در دست وندر كارهاي بزر حمي وحمي بدست الله إن الله هو السميع البصير. إن إلا تسيري ان ينسي تعليليا اینه که همانا الله عز و جل فقط او هست این فقط را از کجا آوردیم عزیزان طلبه میدونه این هوا که ذکر شده لفظ جلاله الله قبل از ذکر شد هوا دوباره به معنی الله این زمیر وقتی که اضافه شده معنی حصر میده ان الله هو السميع البصير همانا پروردگار فقط او هست السمیع لکل شئی البصیر و بکل شئی هر چیز را شنوا هر چیز را بینا ما در بحث حاضر و ناظر در مقدمه بحث کردیم گفتیم غیر از خداوند هیچ کسی صداهای ما را نمیشنود هیچ کسی احوال ما را نمی بیند این عقیده حاضر و ناظر که هر جا حضور دارد بر اعمال ما ناظر حس افعال ما را می بیند صداها و صدای ارس کنم اقوال ما را می شنود این اختصاص به الله دارد غیر از الله هیچ کسی این صفت را ندارد اینجا ببین حس را خداوند فیصله بحق می کند چون خدا هر سخان شماره می شنود هر عمل کرد شماره می بیند اولم یسیرو فی الارض فیمدرو كيف كان عاقبت الذين كانوا من قبلهم بعد از اینکه خدای عز وجل فرمودن ان این تخویف الدنیا اخری هم بود خداوند فرمود که از روز قیامت انها ربیم بده قیامت خودش یک عذابی دارد قیامتی که اونجا برای انسان هیچ دوستی نیست هیچ سفارش کنندهی نیست اما عذاب تنها عذاب قیامت نیست بلکه در دنیا هم گاهی عذاب نیاید خداوند عزواجل در این آیه اشاره میفرماید به عذاب دنیا این آیه تخویف دنیاوی است خداوند می که اگر شما کمی سیر بکنید در زمین بگردید سیاحت بکنید و ببینید احوال پیشینیان را اقوامی که قبل از شما بودند به خصوص اون اقوامی که به دلیل نافرمانی پروردگار اونها هلاك شدند مثلا بروید مصر آثار فرعون و فرعونیان را ببینید بروید یمن آثار قوم سبا را ببینید آثار قوم عاد را ببینید قوم ثمود را ببینید اردن بروید یا همون شام آثار قوم بنی اسرائیل را که خدای از و جل به چه عذاب اونها را گرفتار کرد بنی اسرائیل که روز شنبه اونها با شکار می کردند و ممنوع شدند بلاد مختلف هر جا می بینیم که اثری از عذاب هست اینها نمونه های عذاب هستن خدا ما را بیم میده که شما هم بهتر از اونها نیستید اگر شما مسیر کجی اونها را ببرید انجام شما عاقبت شما همون خواهد بود اولم یسیرو فی الارض آیا سیر نمی در زمین خدا فیمظرو غرز سیر پس ببینند کیف کان عاقبت الذین کانو من قبلهم چگونه شد عاقبت و انجام بنویسید به سبب کفر و شرک چون منظور اینه که کفر و شرک کردن انجامشن چه شد؟ آقبت اللذین کانو من قبلهم عاقبت انهایی که بودن قبل از اینها. منظور اینه انهایی که غیر خدا را پرستیدند ولی وقتی که عذاب آمد معبودان باطل اونها را نجات ندادند نتونستن برایشون کاری بکنند خب این آیه وقتی که برای قریش گفته می شد قریشی هم می گفتند که اونها اگر گرفتار شدند اگر بر سرشون عذاب آمد به خاطر زعف خودشون بود یا جمعیتشون کم بود یا مال و منال نداشتند یا اسلحه و قدرت نداشتند ولی ما را که میتونی تکن بده ما هم پول داریم هم جمعیتمون زیاد هست جمعمون جمع هست هم قدرت داریم هر یکی افتخار میکرد به قدرت اشعار جاهلیت را ببینید از آبا و اجدادشون از خون ریزی های اونها از مظالم اونها همش تعریف میکردند افتخارشون آدم کشی بود خداوند عزواجل در ادامه این آیه میفرمه نه اونهایی که در گذشته بودند هم از نظر قدرت از اینها قوی تر بودند هم از نظر مال از اینها سرمایه دارتر بودند هم از نظر جمعیت از اینها بیشتر بودند اینجا بحث جمعیت نیست در همین سرمیت کانو اکثر من هم جمعیتشون چی بود؟ بیشتر از اینها بود و اینجا بحث قدرت و مال هست کانو هم اشد من هم قوه آنها بودند شدیدتر از اینها از نظر قدرت قوت اونها بیشتر بود شدیدتر بود در سور مبارک احقاف داریم ای مردم ام مکه ما اونها را اینقدر تمکین و قدرت دادیم که این مکننا به شما اون قدرت ندادیم شما اون قدرت اونها را ندارید. بس اونها از شما قوی تر بودند، کانو هم اشد من هم قوة آنها شدیدتر بودن بیشتر بودن از اینها از این و آثارن فی الأرض و همچنین بیشتر بودن از نظر آثار در زمین آثار در زمین چیه؟ آثار ما روی زمین همین مال ماست وقتی که وضع ما خوب باشه ساختمان های ما زیاده باغات ما زیاده کشاورزی ما زیاده گزفندان ما زیاد استن و هر چی که امکاناتی باشد بیشتر روی زمین آثار هر انسانی مشخص میشه بس مراد از آثار آثار ماليه هست قلعه هست باغ هست رمها هست كانوا هم اشد منهم قوة و في الارض از نظار آثار در زمين هم از این هم شديد تر بودن اما فأخذهم الله بذنوبهم تفسير روح والمعنى در تفسير, تفسير اثارا في الارض نوشته مثل القلاع المحكمة والمدائن الحصينة قلعه های محکمی داشتند شهرهای بسیار سخت و محکمی داشتند اما فأخذهم الله به ذنوبهم خداون اونها را معاخذه کرد علت هم نوشته شده به ذنوبهم بسبب گناهانش انسان که معاخذه میشه خودش چون گناه میکنه خدا را ناراضی میکنه ما کان لهم من الله من واق بعضهم نفي شفاعة قهدية وهمتني نفي مختارية يعني خدايانهم ها هيچ اختياري نداشتا وهيچ كاري نتو نستمبرونها بكوران وما كان لهم نبود برايانها من الله أي من عذاب الله از عذاب خداوان من واق هيچ حفاظت كنان دي وقايقي بمعنى بيوانا حفاظتا سيانتا سيانتا کسی کناره از اونها محافظت بکند نگذارد که اونها عذاب ببینند نبود برایشون اینها دلشون دلشومیتی خوش بود به خدایانشون در سوره مبارکه احقاف خداوند میفرما: فما اغنف عنهم الهاتهم التي يدعون من دون الله من شيء اون خدایانشون این در سوره ارس کنم هود هست بعد از ذکر عذاب خدا هم فما اغنت عنهم آلهتهم آلهت اونها هیچ چیزی از اونها دفت نکردن الَّذِينِ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله مِنْ شَيْخِ اونها که غیر از خدا اونها رو میپرسیدن فریاد می زدن هیچ مشکلی از اونها دفت نکردن وما زادوهم غیر تطبیب و عبادت اون آلها غیر از تباهی و هلکت چیز دیگر در اونها نیافزود و در سوره مبارکه احکاق خداوند می‌فرمت فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلها چرا یاری نکردند آنها را اون خدایانی که اونها را غیر از خداوند سبب قربت گرفت بودند سبب تقرب گرفت بودند شرا اونها نتونستن یاری بکنن اون اینه که شما دلتون خوشه که اینها شما را یاری میکنن وقتی که عذاب خدا بیاد اینها هیچ کاری برای شما نمیتونن بکنن اوقا من الله من واقع. خب خداوند اینجا فرمود که فا اخذهم الله بذنوبهم خداوند این اقوام را به سبب گناهانشون مؤاخذه کرد اون گناهان چی بودن تفصیل ذنوب بزرگترین گناه کفر و شرکه باقی گناهان هم تأثیر دارد در عذاب انسان در نهو برای انسان اما در رأسش کفر شرک انکار دعوت انبیاء خداوند گناه را اینجا تفصیلا بیان فرمیده ذالک بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبینات این به سبب این بود که رسولشان پیششان با بیینات آمد آمدند با دلائل با معجزات ولی اینا چیکار کردند بیینات هم به معنی دلائل و برائین میاد هم به معنی معجزات میاد در قرآن فکفروا پس آنان کفر کردند فاخذهم فا الله خداوند اونها را مؤاخذه کرد وقتی که گفت کردم معاقضه شدن اینه قوی شدید العقاب همانا پروردگار قوی هست در معاقضه معاقضه بندگان سو قوی هست شدید العقاب عذابش بسیار شدید و سخت است. لذا بندگانی که او را نافرمانی بکنن وقتی که بیاد بگرفتن در عذاب سخت میکنن ولقد أَرْسَلْنَا موسى بآياتنا وَسُلْطَانِ مبين ما در گزشته بصورة اجمال خاندیم كَيْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ حال بصورة تفصيل مِن خاندیم اين هم تخويت الدنياوی وهم دليل نقلي هست از موسى عليه الصلاة والسلام یکی از اون نمونه ها را که خداوند به صورت اجمال و خلاصه اونجا بیان فرمود حال اینجا به صورت تفصیل <تصفح> بیان می فرماید ولقد ارسلنا موسی با آیاتنا همان ما فرستاد موسا را همراه با آیاتمان منظور از آیات چیه بنویسید حجج توحیدیه دلائلی که دال بر یگانگی خدا بودن موسی علیه السلام همه اون دلایل را آورد موسی و السلام پیش فرعون ادعا کرد که من از طرف رب العالمین آمدم اونا راهش گفت گفت و ما رب العالمین قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين رب المشرق والمغرب رب اسمان ها و زمین از رب مج... دلائل بودن. نگاكم نگاكم من این می دلایل بودند یعنی به آسمان نگاه کن به زمین نگاه کن اینکه تو که نساختی نه فروردگار ساختي. رب مشرق و مغرب هست هر روز خوشید تلو می کند. هر روز غروب میکنه این به دست تو که نیست تو نمیتونی خلاص این دلائل توحیدیه را وقتی که موسا بیان فرمود و همچنین و سلطان مبین سلطان مبین تفسیرش هست موجزات ظاهر موجزات آشکار با موجزات ظاهر آمد وقتی که موسا را ما فرستادیم کجا فرستادند؟ الی فرعون و هامان و قارون فقالو زاحرون کذاب بسوی فرعون و هامان و قارون گرچه موسی و هارون فقط بسوی فرعون و هامان و قارون فرستاده نشدن بسوی تمام مردم فرستاده شدن مردم بنی اسرائیل که امت اجابت بودند و مردم مصر قبطی ها که امت دعوت بودند اما خداوند سرکرده هایشون را ذکر کرد بیشتر مردم الناس و الى دین ملوکی بر دین پادشاهانشون هستند وقتی که پادشاه کفر میکنه مردم هم کفر میکنن فرانی ها کفر کردند و بیشتر این کفر منصوب میشه به فران و ایلا اگر خود فرانی ایمان میآورد مردم هم ایمان آوردن به این خاطر ذکر رؤوسشون هست ما فرستادی من هر بسوی فرعون گرچه فرعون لقب تمام ملوک و پادشاهان مصر است اما منظور از این فرعون فرد خاصی اون فرعونی که در زمان موسی علیه سلاته و سلام بود ال فرعون و قارون سوی فرعون و هامان هامان وزیر فرعون بود وقارون وزير فرعون از انجام علومي شكه جاي تو قرآن هز يا هامانو امن اللي صرحا اي هامان براي من یك بناي محكمي وبلندي درست کن به هامان دستور دار وقارون قارون قرچه آداتش مثل آدات فرعون بود كفرش مثل كفر فرعون بود اما از بني اسرائيل بود قارون پدر موسی علی الصلاۃ بود پدر قارون و پدر موسی با هم برادر بودند این قارون کان من قوم موسی این سرکرده ها همه به موسی چی گفتن فقالوا ساحر کذاب وقتی که معجزات را دیدند گفتند ساحر ساحر به اعتبار معجزات جادوگر است وقتی که دلائل را شنیدن و دعوت توحید را شنیدن کذاب در ادعای توحید یعنی دروغ میگوید یک خدا نیست چندین خدا است معنیشی لیه در این میگفتن کذاب هست فلما جاؤهم بالحق من عندنا اما موسیٰ علیه السلام از این تهمت های اونها از يا وگوی هاي اونها متاثر نشد موسی علیه حق تحویل میداد يعني پیام حق را به اونها مذهب حق را و مسیر حق را به اونها توزیع فلما جاءهم بالحق من عندنا وقت که موسی همراه با حق پیش آنها آمد از ما قال اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه بكوشيد فرزندان کسانی که با موسی فرزندان کسانی که با موسی همراهی میکنند به موسی ایمان آوردن یعنی بنی اسرائیل که به موسی ایمان آوردن فرزندانشون را بکشید و استحیو هم و دخترانشون را زنده نگه دارید این زنده نگه داشتن دختر و کشتن مردها این خودش یک ذلت است هر دو, دو تا عذاب هستند این دیگه لطف نیست که دختران را نگهداری خب از به خدمت شما اونچه که ما خاندیم در گذشته فران فرزندان بنی اسرائیل را در زمان و ولادت موسا کشت اینجا آمده که وقتی که موسا علیه صلات و السلام به سوی خداوند و به سوی ایمان و توحید و دعوت داد گفت بکشید آیا کدوم زمان اون زمان کشت یا این زمان اهل تفسیر با توجه به آیاتی که در رابطه با اون زمان هستند که در سوره قصص میان و در رابطه با این آیه میفرمایند که فرعون در دو مرحله این کار را کرد یکی در زمان ولادت موسی علیه و السلام اون زمان وقتی که کاهن ها یا معبر ها بهش گفتند که از بنی اسرائیل مولودی متولد میشه و سبب هلاکتت میشه دستور داد که این مولود باید زنده نماند اون زمان دستور داد داستانش در سوری قصص میاد و بار دوم این زمانی که فرعون دید که بنی اسرائیل به موسی ایمان آوردن کم کم از من فاصله میگیرند احساس خطر کرد لذا میخواست بنی اسرائیل را به این صورت بکشد فرزندانشون را از بین ببرد میخواست که نسلش را از بین ببرد اما از کنم خدمت شما که در این صورت دوم فرآن موفق نشد. نتونست اون کار سری اول چرا؟ خیلی از فرزندان را زلمن کشت و. هر کاری کرد که موسی علیه الصلاۃ والسلام زنده نماند موسی را الله تعالی در خانه خود فرعون زندانی نگه داشت و داد. اما این بار الله می و ما کیذل کافرین الا فی ضلال کید و مکر کافرین نیست مگر در الا فی ضلال بی فایده یعنی ناموافقه توتعی فرعون ناموفق شد معنیش اینه مکر فرعون جای نرسید ناموفق شد نتودست چرا بدلیل این که خداوند عزواجل هر روز یک بلایی می آورد سرشون که اینها با اون بلا گرفتار می شدن مشغول می شدن فرصت نمی کردن که حکمی که صادر شده اون حکم را چی بکنن اجرا بکنن در همین گیروداری که موسی علیه سلام با فرعون بحث میکرد و صحبت میکرد خدای عزواجل عذابهای مختلف و گوناگونی بر فرعونیان نازل کرد هر چند روزی با یک عذاب گرفتار بودن شما انشاءالله میخانید در سوره مبارکه عراف که فارسلنا علیهم التوفان والجراد والقملا والضفادع والدم آيات بينات خدا بإن سورة نهار إفتار كد ناموفق شدن بإن خاطر من فرماد وما كيد الكافرين إلا في ضلال من تنم إن رأى إدخال إلهي قرار بدين يعني خود بخود سؤال ميشه كفرعون وقتی قفت كفرزندان بني إسرائيل ربو كشيل آية إن تدبير فرعون این طاته فرعون نتیجه داد خدا جواب میده نه و ما کهذالکافرین ایلا فی ضلال حال چگونه جواب ندار تفسیر قرطبی نوشت و مطلبی که خدمت شما کردم فشغلهم الله عن ذالک بما انزل عليهم من انواع العذاب خدا هم مشغولشون کرد با انواع عذاب کذفافع والقمل والدم والطوفان با این عذاب ها گرفتارشون کرد الان خارجو من مصر را. تا اینکه از مصر خارج شدن یعنی آخرین مرحله چی شد همون شد که موسی آخر دستور یا موسی بره اینا موسی را تغییب کردن تا اینکه غرق شدند پس فا الله و هزا معنی قوله تعالی و ما قیدو الكافرین الا في ضلال پس معنی قول پروردگار که میفرماید توتئي فرعون بجاي نرسيد اينه وقال فرعون وذروني ان تدبيري اول بود توتئي اول بود توتئي دوم تهديد شي تهديدي كان وذروني مر بوك زاري تأقتل موسى موسى ربكو شك ولیت عرب بهو بذار اون پروردگارش را صدا بزند ربش را صدا, صدا بزند ببینید آیا فرعون حقیقتا میخواست موسا را بکشد بعضی میگویند که این بحث تو جلسه خصوصی اونها مطرح شد اونجا فرعون گفت که شما به من مشوره بدید نظر بدید من میخوام موسا رو بکشم اما مشاوران نگذاشتند خدا وقتی که چیزی را بخاط خداوند اسبابش را هم درست میکنه مشاوران نگذاشتند مشاوران گفتند افرام بد بدنام میشی اون وقت همه میگوین یک آدم بیدفاعی را کشت برای شما برای سلطنت شما برای این نام شهرت شما خوب نیست به این خاطر نکشت و الا حقیقتا میخواست بکشت و بعضی میگن نه فرعون اصلاً جرأت کشتن را نداشت اینا بلوف بود شوهر میداد می ترسید چونکه این معجزات را وقتی که میدید می, می احساس خطر میکرد در دل فرعون این این مسئله قرار گرفته بود که موسی پیامبر خداست. قرآن یقین داشت که موسی پیامبر خداست. قرآن ف به فرموده که قر میدونست می دونست که این پیامبر خداست. کسی که معجزه را ببیند و بعد جادوگران را بیاورد و جادوگران همه شکست بخورند دیگه چی مانده؟ از نظر استدلال استدلال کامل شده بود. اما فقط شعار میداد تا موسی و اطرافیان موسی بنی اسرائیل بترسند و الا خود فرعون احساس خطر میکرد میدونست که اگر من اقدام بکنم خودم از بین میرم میروم می قتاده رحیمه الله یکی از مفسرین است میفرماید که چنان میترسید که یبول کما یبول العمار مثل اولار ادراش میگفت از بس میترسد بس جرأت کشتن نداشت این همین طور شعار هست این بلوف زدن است لذا ميقف دروني اقتل موسى منو بزاريت كي موسى را بكوش اموالي يدعو ربه و ربش را صدا بزنه انو بصورة مسخره ميقفت شرا ميخاي بكوشي دلائلش را ذكر ميكونت اني اخافو ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد چون من ميترسم دين شمارا تبدیل نكونت دين شمارا عوز نكونت دین قبلی چی بود؟ عبادت بطها و عبادت فرعون چون مردم در اون زمان هم فرعون را عبادت میکرده هم بطها را خود فرعون هم بطی داشت تو قرآن ذکر آمده پس من میترسم که دین شما را این تغییر نده او ان یزهی فی الارد الفساد یا در زمین فساد ایجاد نکند خب توجه بفرمایید منظور از فساد چیه همیشه فرعون و فرعون ها از دو چیز میترسند وقتی که دعوتگران حق ها به عرصه بگذارند مردم را دعوت بدهند از دو چیز میترسند یکی از انقلاب دینی و مذهبی میترسند و یکی از انقلاب سیاسی میترسند یکی می ترسند که مردم همه متدین و دیندار بشن. وقتی که متدین و دیندار بشند اون وقت دیگه جای فرعان نیست اونجا که حکومت بکنه جای یک دیکتاتور نیست که حکومت بکنه اون وقت چیکار می کند؟ یک انقلاب سیاسی به وجود میاد حتما باید حکومتش از بین بره لذا فرعان اینجا اشاره می کند اینی ان یبدل دینکم به انقلاب دینی، به انقلاب مذهبی او ان یزهره فی الارد الفساد این اشاره هست به انقلاب سیاسی که تغییری در حکومت نیاد و افرادی دور برش جمع بشن، شلوغ بکنند، حرکت بکنند ما را از بین نبرند من از این می آینده را من خطرناک می بینم وقتی که موسیٰ علیه و السلام این توتعه فرعون را و این نقش فرعون را شنید ببینید انبیا چکار می کنند مسلک انبیا را ببینید انبیا در و شدائد در سختی ها به پناه چه در میان و وقال موسی اینی عثث بربی و ربكم توکل موسیبی موسی گفت این مسلک الانبیاء فی مساله الدعاء من پناه بردم به رب من و رب شما ربمن من و رب همه شما مردم هست من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب از هر اون انسان متکبر که خودش را بزرگ میپندارد اون متکبری که لا یؤمن و بیوم الحساب ایمان ندارد روز حساب روز حساب را باور ندارد اگه کسی ایمان داشته باشد حرکاتش را حساب شده میکند ولی کسی که ایمان داشته نباشد اون از دستش هر جنایتی برمیاهی و قال رجل مؤمنون من آل فرعون از اینجا داستان اون مرد مؤمن شروع میشه اون مرد مؤمنی که از خیشاوندان فرعون هست اون مرد مؤمن میاد از موسا سلام و السلام دفاع میکند اینایت داشته باشد که این مرد مومن اولا کی بود نام های مختلفی برایش ذکر کردند بعضی گفتند کان اسمه حبیب حبیب النجار. بعضی میگه همینه بعضی میگه اونی که تو سوره یاسین ذکرش آمده و بعضی میگند که اسمش بود قپتیات قپتیات اسمش بود به سرعموی فرعون بود تفسير مزهري قفته قال مقاتل والسدي كان قبتيات ابن عم فرعون وهو الذي حكى الله عنه في سورة القصص وجاء الرجل من أقصى المدينة يسعى يسعى عموية فرعون بوت بموسى أزدير وقت دور دوست بود ون زماني كي موسا اون بنی اسرائیل را کشت و بعداً فیصله شد که موسی را دستگیر بکنند بعد از این که متوجه شدند که موسی هست او دوید و, و به موسی آمد خبر داد که من برای شما احساس خطر میکنم از اینجا برو قال یا موسا این الملعه یعتمرون بکل یک طلوب فخرج اینی لکه من الناصحین تو سور قصص لذا این مفسرین گفتن مقاتل صدی و غیره که این قبطیات به سرموی فرعون هست اونجا هم خیرخواهی موسا بود به موسا مشوره داد از اینجا برو اینجا هم داره از موسا علیه السلام و سلام دفاع میکند این همه وقت ایمان داشت دوست سمیمی موسا بود تابعای ایمان خودش را ظاهر نکرده بود این صدیق موسی علی و سلام و دین موسی است. و بعضی گفتن که اسمش حبيب هست، بعضی گفتن این از نظر قوم اسرائیلی بود، اما این ضعیف است، چون اینجا آمده رجل مؤمن من آل فرعون سرافت است، از آل فرعون بود، اما چند صفت برایش اینجا ذکر شده؟ یک مؤمن، رجل مؤمن. دو من آل فرعون سه یکتم ایمانا تا به حال ایمان خودش را کتمان میکرد تا به حال ایمان خودش را کتمان میکرد ببینید اینا همین دفاعی که این مرد مؤمن از مسال صلات و السلام کردن ابو بکر صدیق رضی الله تعالی از رسول الله داشت همان گونه که این اولین کسی بود که به موسی ایمان آورد ابو بکر صدیق اولین کسی بود که به رسول الله ایمان آورد اما یک تفاوتی هست بین این و بین ابو بکر صدیق که این تفاوت را بنده برای شما نقل میکنم از بعضی گفته این سخن سیدنا علی رضی الله تعالی نوحست این قول قوله سیدنا علی هست ان جعفر ابن محمد امام جعفر فرزند امام محمد باقر روایت میکنه که حضرت علی رضی الله تعالی نو فرمود انه قال کان ابو بکر خيرا من مؤمن آل فرعون ابو بکر از او افضل تر چرا چون سه صفت اینجا ذکر کرده این صفات در ابوبکر هم هست فقط این فرق شد که لیانه‌و کان یکتوم ایمانه. و قال ابو جهارا جهاراً اتقتلون رن. این ایمانش را تا این روز مخفی میکرد. ابو بکر از روز اول ایمان خودش را ظاهر کرد. اون زمان یکفر آن بود. در این زمان فرآنها بود. ابو جهل یکفر آن بود. و امایه یک فرعون بود ولید ابن مغیره یک فرعون بود عتبه شیبه ای اینا هر یکی مؤمنین را به اشد مجازات جزا دادند، هر یکی برده ها را پیش خودشون در شکنجه دادن با هم دیگه مسابقه داشتن این همه فرعون بود تو این امت گرچه ذکر شده که فرعون این امت ابو جهل است ولی بقیه هم دست کمی نداشتند ولی ابوبکر رضی الله تعالی از روز اول ایمان خودش را ظاهر کرد و بعد این مرد که این سخنرانی را کرد بعدا رفت تشریف برد خدا حفاظت ایت اما حضرت ابوبکر در کنار خانه کعبه اون روزهای اول وقتی که همین جمله را بود اتقتلون رجلا ان یقول ربیا الله مردم چنان او را زدند چنان حمله ور شدند که حضرت ابوبکر صدیق بیهوش شد و از حال رفت تمام بدنش پر شد ذ الله می فرماید این مرد ما گفت اتقتلون رجلا ان يقول ربيا الله آیا شما شيد مردی را که جرمش و گناهش اینه که میگوید رب من الله است و قد جاءكم بالبينات من ربکم در حالی که دلیل داره عرض کنم که بدون دلیل سخن نمیگوید بدون مدرک سخن نمیگوید وقد قد جاکم بالبینات من ربکم از جانب رب شما همراه با بینات و معجزات و دلائل آمده و بعد هنوز ایمان خودش را ظاهر نکرده کم کم اشاره میکند و این یکو کاذبا فعليه کذبو اینجا بالفرض بنویسید چون اون نبود که موسا کاذب است بالفرض اگر کاذب باشد دروغ بگوید فعلیه علیه کذبو کذبش دروغش بر علیه خودش خواهد بود یعنی وبال دروغ بر خودش هست خودش متضرر میشه به شما که ضرری نمیرسد شما چرا عاشفته هستید شما چرا ناراحتید؟ اما این فکر هم کردید که اگر صادق باشد انجام شما چی میشه اگر راستگو باشد اون وقت آقابت شما چی میشه و ان يك صادق بواسط يصفكم بعض الذي يعدكم بشماميرت بعض اون چيزي كه شما را يعني اون چيزي كه شما را وعده فوايده چي بود شما را بميدهد خدا ميات قد إلينا أن العذاب على من كذب و توله بسوی ما پیانبران وحی شده که عذاب مال چه کسی هست على من کذبه و توله کسی که تکذیب میکند پشت میدهد لذا این مرد مومن میگه که آیا از این نمی ترسید این احتمال نمیدید که اگر این صادق باشد اگر راستگو باشد به شما اون عذاب میرسد یصفكم بعض الله یعیدکم ان الله لا يهدي من هو مصرف كذاب این ادخال <سؤال> الهی است. دیگه گفته شیخ بزرگوارم حضرت حسین علی این جز حکایت نیست. این ادخال الهی است این جمله از طرف خداوند است. خود به خود سوال میشه این شبه میشه که این مرد به مومن چه سخن رانی زیبایی ارا دادا چه مطلب جالبی بیان فرمودند آیا از این مطلبش فرعون و فرعونی ها متأثیر نشدن ایمان نیاوردن تجدید نظر نکردن خداوند پاسخ میده ان الله لا یهدی اما خداوند هدایت نمیفرماید یعنی توفیق هدایت نمیده من هو مصرف کذاب هر اون انسانی که مصرف باشد متجاوز باشد تفسیر جلالن مصرف را تفسیر کرده به مشرک متجاوز باشد یعنی تجاوزش در شرک باشد خداون چینین مشرکی را توفیق هدایت نمیده کذاب چنین دروغگویی را لذا مناش اینه که نخیر از این سخنان بلیغ و زیبا متاثر نشد فرعون اما ادامه ادامه سخنرانی ست سخنرانی این مرد معامل کرد. این سخنرانی اولش هست یا قوم لکم الملک اليوم ظاهرین فی الارد ای قوم من برای شما پادشاهی امروز هست لکم الملک اليوم ملک امروز پادشاهی امروز هست ظاهرین ظاهر اینجا به معنی غالب هست منظور حاکم هست یعنی شما امروز غالب و حاکم هستی در زمین ظاهرین فی الارد ارض، ارد الفلام اهدی هست مراد از ارض، ارض مصر است. یعنی شما امروز غالب هستید در این سرزمین مصر پادشاهی دارید حکومتی دارید برای فردای فکری کردید فمین سر و نامیم بأس الله اینجا انا ما را یاری می کند از عذاب خدا اگر پیش ما بیاد یعنی یه وقتی اگر عذاب آمد گرفتار عذاب شدیم کی میتونی یاریمون بکنه لذا فکر فردار هم بکنید تا اینجا سخنرانی اولی این مرد مومن هست اما فرعون عکس العمل نشان میده جوابی دیگه ندارد فرعون فقط یک جمله میگه قال فرعون ما اوریکم الا ما ارا ای قوم من به شما مشوره نمیدم مگر اون چی که من میبینم یعنی رأی خودم را دارم میگم به رأی من عمل کنید بذارید این پسرموی من اون چی که من میگم شما گوش کنید چون تابحال فرعون نمیدوند نمیدونه اون ایمان آورده فکر میکند که بالاخره این احتمالاتی میده احتمال اینکه شاید موسا درست باشد لذا فرعون میگه ما اوریکم من به شما رعی نمیدم مشوره نمیدم الا ما ارام مگر همون رعی اول خودم را و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد و من شما را راه نمائی مگر به راه مسلحت خوب رشاد از رشد است راه درست راهی که مسلحت شما توش است راهی که خوبه برای شما من اون را برای شما مشوره میدم شما از من حرف شنوی داشته باشید اما این مرد مؤمن موعظه دومش دو را بعد از این صحبت فرعون شروع می کند این موعظه دوم نسبت به معزه اول على السبيله ترقی است وقال الذي امن يا قوم اني اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب گفت اون کسی که ایمان آورد ای قوم من همانا من می بر شما مثل روز احزاب دیگر احزاب دیگر یعنی اقوام دیگر اون روز سختی که بر اقوام دیگر آمد من می ترسم بر شما چنین روزی نیاد اون روز چه روزی بود و مراد از اقوام کدوم اقوام هستند نام اقوام را ذکر میکنند. مثل ده قوم نوح و عاد و ثمود یعنی مثل حال قوم نو دعب یعنی حال حال قوم نو قوم عاد قوم سمود از حال اونها میترسن که مثل حال اونها برای شما نیاد اونا چی شدن یا غرق شدن یا سائقه اونها را از بین برد یا الله عز وجل برای اونها رجفه و زلزله آورد یا طوفان آورد خلاصه میترسم یکی از اون عذاب ها بر شما مسلط نشه والذین من بعدهم و کسانی که بعد از اونها بودن بعد از اینها قوم لوت بودند قوم شعیب بودند اونها همه حلاق شدند و من الله یرید و ظلمن للعباد اینم ادخال الهی هست اینم سخنرانی مرد, فرعون، مرد مومن نیست سآل می شه. این سوال خود به خود مطرح میشه که خداوند چقدر از اقوام را حلاک کرده قوم نو، قوم عاد قوم سمود کسانی که بعد از این آیا این ظلم نیست همه انسان ها را از بین برده خداوند میفرماید که ظلم به جای خود که خداوند اراده ظلم هم ندارد نیت ظلم هم ندارد ما الله این جوابش هست و من الله نیست خداوند یورید و اراده بکند ظلمن للعباد ظلم را برای بندگانش نه خداوند اراده ظلم برای بندگانش ندارد اینا خودشون بر خودشون ظلم کردند در آیات دیگر و ما ظلمناهم ولیکن ظلمو انفسهم ما بر اونها ظلم نکردیم خودشون ظلم کردن راه تمرد و سرکشی را انتخاب کرد. ويا قوم اني اخاف عليكم يوم التناد اذا همي همي سخن دوم اي قوم من من مترسم از بر شما از روز تناد تناد از ندا است يعني یعنی هم ديگر را صدا زدن هم دیگر را فریاد زدن يوم التناد چه روزی از روز قیامت روز قیامت را چرا یوم تناد میگویند؟ یوم فریاد میگویند؟ می دلایل مختلفی نوشتند واقعا اون روز روز فریاد زدن هست اولا هر یکی از انسان ها هم دیگر را صدا میزنه ای فلان، ای پدر، برادر، عزیز، خیش آون به من برست، به کمک من بشتاب هر چی که هم دیگر را فریاد میزنند این فریادها هیچ دردی را درمان نمی کند یک دلیلش اینه به این خاطر اون روز را یا متناد میگویند. بعضی دیگه میگویند که یا متناد به این خاطر که نداهای مختلفی از سوی پروردگار میشه. اولین ندا ندای نافق است یوم یوناد المناد من مکان قریب یوم یسمعون الصیحة بالحق ذالک یوم الخروج تو سوره قاف داریم منادی از سوی پروردگار ندا می کند که ای مردم بیایید اول زنده بشید بلند بشید بیایید به طرف میدان محشر پس اول ندا کردن از برای حشرست بعدن ندا کردن برای اینکه جمع بشن در میدانه. محشر برای حساب و کتاب این دو دلیل سوم اونجا هر یکی ایمه خودش را پیشوایان خودش را معبودان خودش را صدا می زند یوم ندعو کل اناسیم به امامیم خداون می خانمیم ما فرصدا زنیم هر یک را شما با پیشوایانتون تن بیاییت بین خاطر یوم اتناد میگویند گویند بخاطر إنك وجهر يكي هم ديجروا ندامي زننت ندامي كونت مثلاً ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً ونادى أصحاب الأعراف هاريكي أصحاب بهش ندامي كنا أصحاب الجهنم ندامي كونا أصحاب الأعراف ندامي كونا بئن خاطر إن روز يومه تناد اذ یا اینکه مراد نداهای دیگری است که از سوی خداوند میشه مثلا تمام اهل بهشت هم مورد خطاب قرار میگیرند تمام اهل جهنم هم مورد خطاب قرار میگیرند یا اهل الجنه خلودون ولا موت یا اهل النار خلود ولا موت ای به ها از این بعد همیشگی اینجا میمانید. موتی نیست جهنمی ها هكذا لذا نداه های مختلفی از اون روز را به این دلیل میگن یوم تناد یوم تولون مدبرین روزی که بر میگردید شما در حالی که پشت میدهید پشت میدهید به کدام سمت بر میگردید به چی پشت میدهید مفسرین گفتن مدبرین تولون الى جهنم مدبرین موقف حساب یعنی سوی جهنم میروید و پشت می دهید به موقعه حساب به میدان محچر می روید به طرف من جهنم مالکم من الله من عاصم نفی شفاعت نیست برای شما از خداوند یعنی از عذاب خداوند در اون روز من عاصم من هیچ کسی که شما را حفاظت بکند هیچ کسی که شما را حفظ بکند و نگه دارد از شما محافظت بکند حضور ندارد و من الله فما له من هات این باز هم ادخال الهی هست سوال میشه این مرد مؤمن چنین سخنانی که واقعا تکان دهنده است قدر بیم داد اونها این سخنان کارآمد نشد مؤثر نشد اونها را هدایت نکرد اونها را تکان نداد بازم الله می فرمید ادخال الهی ومن یضلیل الله فما له من هاد کسی که خدا گمراه کند برای او هیچ هدایت کنندی وجود ندارد ولقد جاکم یوسف من قبل بالبینات اضامه معزه هست موزه خودش را ادامه میده ای قوم من یوسف قبل زیم با بینات پیش شما آمد قبل از موسا در میان همین مصریها یوسف بود یوسف چه دلایلی داشت بسیاری از اهل تفسیر میگم مراد از بیینات همون دلایلی که شما در سوره یوسف میخانید ارباب و متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار این بزرگترین دلیل است ارباب متفرق اینجا و اونجا اینا بهترسی یا اون ذاتی که دارای این صفات والاس امی الله الواحد قحار یگانه مسلط لذا یوسف که آمد شما باز هم نپذیرفتید بسیاری از مردم قبط بی یوسف هم ایمان نیاوردند و بیشتر اینها نسل اونها بودند به بخدمت شما که چهار درجه ظلالت را که ارز کردم اینجا هر چهار درجه هستن شما پیدایشون بکنید فما زلتم فی شک مما جاکم به این درجه اول است همواره شما در شک بودید از آنچه که یوسف آورد درجه اول ظلالت ریب و شک حتی اذا هلک قلتم زمانی که یوسف علیه السلام وفات کرد حلکه ایماته تفسیر بیزاوی گفته بعضی گفته حلکه بالموت وقتی که یوسف فوت کرد قلتم لن یبعث الله من بعده رسوله هرگز خداوند بعد از یوسف دیگه پیغمبر نمی فرسته کذالک یضل الله من هو مصرف و مرتب اون درجه اول بود این درجه دوم است کذالک یضل الله این کاف کاف تعلیلیه هست به معنی لذالکه به همین خاطر هست که خداون گمره می کند یعنی بعد از اینکه شک و ریب داشته باشه انسان خدا گمراهش می کند هر اون انسانی که مصرف و مرتاب اون انسان متجاوز در شرک مرتاب در دین کسی که شکاک باشد و خیلی در شرک و عسیان مصرف و متجاوز باشد خداوند او را چی می کند؟ گمراه می کند بس وقتی که انسان در خود شک و ریب جائب دهد و را داد و تعصب بخرج دهد خدا چیش می کند؟ گمراهش می کند گمراهی درجه دومه درجه سوم سو چی بود؟ جدال بالباطل الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آیاتِ اللَّهِ آنانی که در آیات الهی جدال می کنند مثل مشرکین مکه که در با قرآن بحث می کردند با قرآن جدال می کردن بغیر سلطان اطاهم بدون دلیل عقلی که پیششون بیاید، دلیل عقلی و نقلی یعنی هیچ نو مدرکی ندارن دلیل عقلی دارن دلیل نقلی بی خود از روی تعصب دارند بحث میکنند از روی اناد دارند قرآن را رد میکنند یا دلائل بقیران کبر مقتن عند الله و عند الذين آمنوا این الذین یجادلون في آیات الله مبتدا هست کبر مقتن خبرش هست یعنی کسانی که اهل جدال هستند با آیات الهی جدال می کنند آیات الهی را میخوان بی اثر بکنند. مورد خشم خدا واقع میشود. کبر مقتن بسیار بزرگ و سنگین هست از نظر خشم نزد پروردگار و نزد مؤمنین. یعنی اینها مستحق خشم خدا هم هستند، مستحق خشم مؤمنین هم هستند. مؤمنین هم باید با اینها بجنگد اینها را از بین ببرند. کدالک این باز هم تعلیلی هست لذالک. این درجه چهارمه ظلالت هست ختم القلب الله می فرمد کذالک يطبع الله على كل قلب متكبر جبار به همین دلیل خدا مهر می زند بر هر قلب متکبر بر هر قلبی که اون قلب چی باشد در درون اون قلب تکبر باشد جبار. ببینید متکبر جبار، تکبر میگویند المعاند فی تعظیم امر الله در تعظیم امر خدا چی هست؟ معاند باشد اما جببار گاهی صفات خدا هست وگاهی صفات بندگان خدا وقتی که صفت بندگان خدا باشد بعضی گفتند به معنی ظالم هست بعضی گفتند که الجبار المتسلط على خلق الله کسی که بر خلق خدا مسلط هست به اصطلاح گردنشون سوار هست ظلمی کند اما در وقتی که صفات خدای عزّ و جل هست، اونجا جبار به معنای اون ذاتی که ضررها و زیان ها را جبران می کند و اون کسی که مشکلات انسان ها را حل می کند، لذا الله عزّ و جل اینجا می فرماید. که خداوند مهر میزند بر هر اون قلبی که در اون قلب اناد و تکبر هست و اون قلب قلب ظالم و تندخوب هست و قال فرعون وقتی که این مرد مومن سخنرانی دومش را هم تمام کرد فرعون دیگه هیچی ندارد تنگ آمد به جنگ آمد این علامت فرعون ها هست وقتی که از نظر استدلال کم میارن تهدید می کنند زندان می کنند به شلاق می کشند لذا اگر شما دقت بفرمایید این آیات را آیات را با شرایط امروز ما در دنیا خیلی از این فراعینه هست بسیاری از این ها هست که بر گرده مسلمانان مسلط هستند و همین شرایطی که صفاتی که اینجا شده دارند و وقتی که از نظر استدلال کم می آورند در مقابل دعوتگران دینی اون وقت به زور متوصل می شوند می بینیم که این دعوتگران به حق جایشون کجاست تو های اونها پس آیات را بخانید و شرایطتون را بپایید تطبیق بدید الله می فرماید فرعون چیکار کرد اونجا خان که فرعون تهدید کرد گفت موسی میکشم اینجا می خواهد مردم را گمراه بکند مردم را فریب بده مردم را احمق گیر آورد بود خصوص قوم خودش را و آنها هم ازش اطاعت کردند. ببینید چه دلایلی فرعون دارد؟ چه حماقت های بکار میبره؟ و گاها فرعونو یا همانو میلی سرپن فرعون گفت ای هامان برای من محلی آماده کن سرپ میگویند محلی و بنایی که بلند باشد. لالی ابلغ الاسباب شاید من به راها برسم کدوم راها؟ اسباب السماوات اون راهایی که راهای آسمان ها هستند فا اطلع اله اله موسی سرک بکشم خدای موسی و اله موسی ببینم آیا هست خب مگت توی فرعون اعتقاد داری که خدای موسی تو آسمان هست میگه نا و این نیل اظنه کاذب من او را و دروگو پندارم ولید برای من بنای درست کن خب الان اینجا چند تا از حماقت های فرعون که مفسرین گوش زد کردن یکی این که گفت برای من بنای بساز مگر این بنا و سکوی درست بکند یا برجی درست بکنه چند متر میتونه باشه خب میرفت سر کوه بهتر نبود کوه ها خیلی بلندتر هستند از این برج هایی که او میخواست بسازه دوم او الله عزوجل را متمکن فی سما فرض کرده بود که خداوند در آسمان های جایی هست سوم اون الله عز و جل را مجسم تصور کرده بود که خداوند مثل ما جسم دارد و دیده میشه این همه از, از حماقتها از بیعلمی و بیخردیش هست لذا الله میفرماید و کذالک زینا لفرعون سوء و عمله و صد عن این گونه برای فرعون آراسته شده بود عمل کرده بدش و به وسیله همین عمل بد و صد عن السبيل از راه حق و از راه راست اون باز داشته شد جلو شد و ما که دو فرعون الا فی تباب آیا این توتیه فرعون مکر فرعون نقشه فرعون اثری داشت خداون می فرمان و ما که دو فرعون نبود این توتیه فرعون الا فی تباب مگر در حلاکت و تباهی، تباب به معنای نابودی، تبت یدا ابیل هاب و تب از اون تب هست تباب، اون از این هست. و گفت: "اللّذي آمنَ يا قوم التبعون اهدكم سبيل الرشاد". این معزز سوم هست. سخنرانی سوم اینجا دیگه خودش را قبلا با فرض و امکان و اما سخن می گفت اما الان با قط و یقین صحبت می کند الان دیگه نشون میده که من ایمان دارم به موسی و من باور دارم هرچی و موسی می گوید و به فرآن و فرآنی ها گوشزد می کند که شما دلتون خوشه به این دنیا اما دار القرار دنیا نیست در قرار دار آخرت است باید به اون دل ببندید و برای اونجا آمادگی بکنید وقال «الذي آمن يا قوم اون کسی که ایمان آورد معزی سفون او گفت یا قوم اتبعونی ای قوم از من پی کنید از من تبعیت کنید نه از فرعون اهدکم سبیل الرشاد من شما را راه میکنم راه درست و راه مسلحات شما اون راهی که مسلحات دنیا و آخرت شما تو اون راه است من شما را راه میکنم ببینید نه فرعون چرا عرض میکنم نه فرعون چون این سخن رانی در مقابل اون سخن فرعون فرعون چی گفت و ما اهدیکم الا سبيل الرشاد من براح مصلحت راه خوب شما را راهنمایی را میکنم اینجا مرد مؤمن میگه نه منم من, میکن نا من راهنمایی میکنم فرعون نه لذا یا قوم تبیعون اهدکم سبیل الرشاد ای قوم من از من پیروی کنید من شما را راهنمایی می کنم راه درست و راه مصلحت و خوب یا قومه انما هذه الحیات دنیا متاع اینجا علت مرض را بیان کند گویا دست را گذاشته سر نبض وقتی که یک مریض پیش دکتر میره پیش طبیب میره اون طبیب ماهر و وارد دست را به سر نبز میگذارد از نبز تشخیص میده که مرض چیه اینجا این مرد فرعون این مرد مومن دستش را روی علت اصلی گذاشته شما که اینقدر گمراهید دو، اینقدر از راه فاصله دارید به خاطر اینکه دل بستید به دنیا اگر دل به آخرت میبستید شما گمراه نمیشده در تمام زمانها در زمانهای گذشته تمام کسانی که راه گمراهی را انتخاب کردند کسانی بودند که مطامع دنیا را ترجیح دادند احساس می‌کردند که اگر ما ایمان بیاوریم ما خیلی از منافع دنیایمون از دستمون میره حب دنیا حب مال حب جاه سبب شد که ایمان نیاورند به این خاطر این مرد مومن یه یک وقتی نگوید که بی ربط است این خیلی هم ربط داره این مرد مومن در واقع علت اصلی را ذکر می فرماید یا قوم انما هذه الحیات الدنيا ای قوم من جز نیست که این زندگی زندگی دنیا متاعن متاع متاعی ارزشی هست این تنوین التنوینو للتقلیل والتحقیر امام رزي هميشي مي فرمايت مطاع يعني مطاع قليل حقير مطاع بمعنى چه؟ بحرقرفتن اسكاله هاي دنیا يعني بحرقيرية بيارزش بحرقيرية عنده چار روز دلت خوشه ونم خیلی کم در مقابل انه متاع ياخرات بس انما هذه الحياة الدنيا متاع وانا الاخرات هي دار القرار ان من الدنيا است ان ترغيب للآخرت است نسبت بالدنيا بيميل باش بآخرت راغب باش وإن الآخرت هي دار القرار همان آخرت آن هست دار قرار ان داري كي انسان جا قرار مي من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها اینجا خداوند عز وجل قانون را فرمايت. قانون قانون مجازات اینه من عمل سیئتا کسی که عمل سیئی انجام بده عمل بدی انجام بده فلا یجزا الا مثلها پاداش داده نمیشه جزا داده نمیشه مگر مثل آن عمل یعنی هر چی که عمل کرده مثل همان قانون خدا همینه بیشتر از عمل کرد جزا نمیده. اما اما ومن عمل صالحا من ذکر هر کسی عمل صالحی انجام بده چه مرد باشد زن و هو مؤمنون ما شرط شرط قبولیت همینه ایمان مشرک نباشه ای وقتی تو ایمانش ارس کنم که آمخته شرک نباشد فا يدخلون الجنه این افراد وارد بهشت میشوند شوند یرزقون فيها بغیر حساب در اون بهشت بدون حد و اندازه رزق داده می شوند بغیر حساب مفسرین می گوین تفسیر ابو سعود بغیر تقدیر و موازنه بغیر از اینکه. که خداوند اون عجری که بهش میده با اون عملی که انجام داده اینا رو مقایسه بکن نخیر هیچ مقایسه ای نیست شما وقتی که مغازه میرید هر اندازه که پول میدید همون اندازه جنس میگیرید بیشتر از اون نیست اونجا نه اونجا به اندازه اعمالتون پاداش نمیگیرید به غیر حساب میگیرید عمل بسیار اندکه بسیار جزئی است اما انسان اونجا پاداشی که میگیرد سبحان الله بغیر تقدیر و موازنه بالعمل بغیر از اینکه با عمل مقایسه بشه بل اضعاف مضاعف بلکه چندین برابر چرا فضلا من الله عز و جل چون فضل پروردگار است تفسیر ابو سعودی ننوش اما من خدمت شما اینجا یک اشکالی را و شبهی را که بعضی از مفسرین مطرح کردن و شاید در ذهن شما هم آمد این رو میخواهم مطرح بکنو. اینه که شما در اولی این آیه خاندید من عمل سیئتا فلا یجزا الا مثلها کسی که عمل بدی انجام بده به اندازه همون عملش پاداش داده میشه الان بعضی ها سوال میکنند که اون ذکری که از جهنم ما میشه نویم به اندازه عمل نیست یه بدبختی شست سال مثلا کفر کرده مگر شست سال تو جهنم می سوزه بخیر آباد تو جهنم هست خب پس معز... م... برابری نیست مماثلت نیست خیلی بیشتر بلخصوص کفار خیلی بیشتر از عمل کرد خودشون از عمری که به اونها داده شده هزاران برابر بیشتر انها جزا میبینند پس چطور فرمودند من عمل سیعتن فلا یجزا إلا مثلها امام راضی رحمه الله این پاسخ داده و پاسخ قانه ای هست ایشون میفرماید که مراد از مثل اون چیزی که استحقاقش را دارد اون چیزی که لیاقتش را دارد ببینید شما گاهی یه جای پول خیلی بی ارزش هست یک گونی پول می دهید و یک کالای بسیار اندکی یا, یا بلاخره طعام مختصری شما می گیرید اما یک سکه طلا می گیرید به اندازه یک کامیون جنس دریافت می کنید لذا نگاه می کنیم که اون چیزی که انسان عمل کرده عملش چی بوده؟ عمل کفره یا عمل ایمانه هرچی که باشد اون چیزی که استحقاقش باشد حقش باشد به همون اندازه یعنی ارزش عملش باشد به همون اندازه جزا داده میشه بیشتر از اون؟ نه این عملش چی؟ عملش کفره خب عملش که کفر چه اندازه کفر کرده آیا این کسی که 60 سال کفر کرده اراده بازگشت داشته نخیر 60 سال کفر کرده یعنی تمام عمرش کفر کرده اگر غیر از این 60 سال 600 سال دیگه عمر می‌کرد 6000 سال دیگه عمر می‌کرد شش میلیون سال دیگه عمر میکرد اون چون عقیدهش کفر بود همون اندازه کفر بی کرد بس این کفرش گوی آباد هست به اندازه تمام زندگیش هست اونجا هم عذابش به اندازه تمام زندگیش هست خداوند اعلان فرموده که زندگی های اینجا محدوده زندگی اونجا غیر محدوده عبارت امام رازی را به خانم نکات بهتری تو این عبارت هست فانقله كيف اسحه ها هاذا کلام اگر کسی سوال کند که این کلام چطور درست است، ان کفر ساعتی، یوجب عقاب الابد. در حالی که کفر یک ساعت مجب میشه برای عذاب ابدی. مثلا کسی همون لحظه آخر زندگی خودش کفر میکنه نمیخواد دیگه برگرده میمیره دیگه برای همیشه تو جهنم است. قول ما جواب میدیم، ان کافر یعتقدی کفریه کون طاع کون و طاعه کافر کف میکنه، این کفر برای خودش یک طاعت و امدادی می دوند، این کفر خوب می داند. هیچ وقت از کفرش پشیمان، به خلاف گناهکار گناهکار گناه قناح میکند، وجدانش هم ناراحته و میخواد روزی برگردد. أما كافر يعتقد في كفره كونه طاعة وإيمانا إن را طاعة إيماني فلهذا السبب يكون الكافر على أزم أن يبقى مصرا على هذا الاعتقاد عبدا كافر عزم دارت مسمم است كي برئين اعتقاد الكفر بمانت مصر بمانت برئي أبد بمانت فلا جرم كان اقابه مؤبدا بس شك نکن كه همون كفر اين وقتی كه مؤبد است عذابه كه بيش داده میشه همچیه مؤبد است ابديه است همیشگیه است بخلاف الفاسق اما فاسق انطور نیست یك انسان گناهکار و معاصی انطور نیست فإنه يعتقد فيه كونه خيانة ومعصية هر گناهی می کند هر دزدی می کند هر سرغتی می کند او را یک خیانتی و یک معصیتی می پندارد عزم خودش تو دلش حتما تصمیم داره که برای همیشه دزدی نمی آخر توبه می کنم. برای همیشه این گناه را نمی آخر برمیگردم. خب این وقتی که اراده همیشگی ندارد پس عذابش هم همیشگی نیست بله بس لا یبقا مسررا عليه فلا جرم قلنا ان عقاب اولیل عقاب الفاسق منقطه بس شک نکن که عقاب گناہکار چی میشه منقطه میشه الان ای حال این مرد مومن در ادامه سخنرانی گفت که ای ای قوم من هر کسی عمل صالح انجام بده بدون حساب و کتاب خداوند بهش رزق میده بهش عطا میده بهش انعام میده و بعد در آخر قوم را توبیخ میکند سرزنش میکند و یا قوم مالی لی ادعوكم الى النجات ای قوم من چی شده مرا که من شما را فرامی خونم سوی نجات یعنی طریق نجات راه نجات و تدعونني الى النار ولی شما مرا سوی آتش راهی که شما میگوید راه آتش است راه آتش چیه؟ تدعونني لی بالله شما مرا دعوت میدید تا کفر بکنم به خداوند و اشرک ببینید مراد از کفر شرک این واو واو تفسیره واو واوتیه تفسیریه هست اونها اون اون مشرکان هم کاملا منکر خدا نبودند شریک با خدا می یعنی شریک شریک بسازم با خدامند ما لیس لی لي به علم اون معبودانی، اون بطهایی که نیست برای من نسبت به معبودیت اونها هیچ علمی من خبر ندارم که اینا معبودند از کجا معبودند پس نسبت به معبودیت اونها هیچ علمی ندارم چرا اینها را با, شما با خدا شریک بسازم در حالی که ببینید من شما را به سوی چه چیزی دعوت می‌دم، و آنها ادعا کنند، عزیز الغفار، این بیان ادعا کنند نجات است. چه فرمود من شما را به سوی نجات، نجات چیه؟ و آنها ادعا من شما را دعوت می‌دهم به سوی آن‌زاتی که عزیز الغفار، همسفت تریبی خدا زک شده، همسفت ترغیبی خدا. هم صفتی که باید بترسیم هم صفتی که امیدوار باشیم الایمان و بین الخوف و الرجا ایمان بین خوف امید هست هم باید ترسید هم امیدوار. از اون ذات من شما را دعوت میدم فرا به سوی اون ذاتی که عزیز هست غالب است، هر کاری میتونه بکنه به اشد مجازات میتونه گرفتاری من بکنه اما الغفار خیلی بخشاینده هست مبالغه هست خیلی آمرزنده هست و میبخشد بندگان خودش را لا جرم انما تدعوننی الی لا جرم من لا شک شکی توش نیست یا من قطعا یقینا قطعا و یقینا بدون شک انما تدعوننی الی همانا آن معبودانی که شما مرا می خاند بسوئی انها لیس لو في فی الدنیا ولا في الاخره نیس برای اون معبودان هیچنو دعوتی دعوت یعنی چه؟ یعنی استجابت دعوت اجابت دعای این معبودن حتی دعایشون اجابت نمی تفسیر جلاله نمیشتا استجابت دعوت فی الحاجات الدنیوی و الاخربی در کنار اینها در کنار عبادت اینها هیچ دعای پذیرفت نمیشه نه در حاجات دنیوی و نه در حاجات اخربی لیس له دعوت في الدنیا ولا فی الاخره یعنی هیچ دعای اجابت نمیشه در کنار اینها نه حاجت دنیا نه حاجت آخرت وأننا ردنا إلى الله وهمنا بازغشتما بسوي الله وأن المسرفين هم أصحاب النار وهمنا مشركين أهل جهنم هستن أهل آتش هستن هم أصحاب النار أنها أهل آتش هستن مصرفین را تفسیر قرطبی به نقل از قتاده رحمه الله ذکر کرده که فرمودند عن ان قتاده انهم المشركون فان الاشراک اسراف في الضلاله انسان که گمراه است دیگه گمراهه اما وقتی مشرک دیگه در گمراهی اسراف کرده از حد گذشته پس همان کسانی که اینقدر متجاوز ان الحد هستند که با خدا شریک می‌سازند اینها هستند صاحبان اصلی آتش هم اصحاب نار بعد از اینکه این سخنرانی خیرخواهانه ناصحانه زیبا بلیغ قانع کننده را به پایان رساند آخرین جمله اش به طریق اتمام حجت بیام فرمود، ای قوم شما نمی پذیرید، ولی دیری نخواهد رسید که شما سخن من را یاد میکنید کنید. فصت تذکر نمای لکم. ان قریب یاد میکنید کنید اونچه که من می گویم به شما. شما یاد میکنید که من خیرخواه بودم. من هدفم این بود که شما نجات بیابید. اما اونها نیت چی داشتن نیت اینجا که متوجه شدن این یک تاپرست است این پیروب موسا هست گفتن که موسا را بذار خودت را یک بلای میاریم سارت لذا وقتی که احساس خطر کرد چه از اقوال اونها احساس خطر کرد چه از سخنان اونها یا از عمل اونها احساس خطر کرد خودش رب خدا سپرد و افوض امری الى الله من امر خودم را معامله خودم را کار خودم را میسپارم به خدا ان الله بصير بالعباد همانا پروردگار بیناست نسبت به بی بندگان نسبت به بندگان خودش بیناست است چقدر زیبا هست. یہ بندهی خودش را به خدا بسپارید بالخصوص کسانی که احساس خطر میکنند از دشمن کسانی که در خطر هستند همیشه خودشون را بسپارند با همین کلماتی که پروردگار برای ما نقل فرموده از این مرد مومن با همین کلمات خودتون را بسپارید همیشه بخونید افوذ امری الى الله و افوذ امر الى الله ان الله بصير بالعباد من کارم را معاملیم را به خدا می سپارم خدا نسبت به بندگان کیکی از بندگان منم خوب میدانم اون وقت خدا حفاظتی تو میکنه. این این ورد و این ذکر مجرب هست خیلی از افراد این خوندن نتیجه گرفتند بنده نمونه زیاد دارم نتیجه گرفتند رضا الله شما هم هر شرایطی داشته باشید در هر خطری باشید این بخونید خدای ازدوجل حفاظت میگنید چون خداوند در ادامه میفرماید ما او را حفاظت کردیم ما نگذاشتیم که کوچکترین آسیبی به این مرد مومن برسد فرعون لشکری را دنبالش پرستاد ولی ناکام شد ناموفق شد لذا کسانی که احساس خطر می برای آنها مشکل هست برای آنها حکم سنگینی شاید صادر شده یا صادر بشه بخونند خودشون را به الله بسپارند و رجوع خالصانه به خدا داشته باشند خدای از و انها را حفاظت می کند از انها معافظت می کند انشاءاللہ هیچ آسیبی به آنها نمی رسد به شرط یقین و الله تعالی بر اون حفرج بیاره ان الله بصیر بالعباد ها و فوض امرم الی الله لا الیکم ولا الی اصنامکم تفسیر بحر المویت نوشته من خودم را خدا, خدا میسپارم نه به سوی شما و نبی سوی بتان شما همان خداوند نسبت به بندگانش بیناست فوقاه الله سیئات ما مکروا الله می فرماید خداوند او حفاظت کند از اون مکر سیعات اون مکری و اون توتیهی که اونها کرده بودن. توتیه بدی اونها داشتند از اون توتیه بدشون سیعات به معنی بد مکر به معنی توتیه از توتیه بدشون خداون اون را افاظت کرد توتیه بد چی بود فران حکم صادر کرد خودش را بکشید قبل از اینکه که موسا بشه اول خودش را بکشید بعد از اینکه که این مرد سخنرانی رانی را کرد و رفت حکم صادر شد اون مرد احساس کرد که الان مرا تعقیب میکنن، من دستگیر میکنن. او رفت از مصر خارج شد رفت به کوه و جنگل پناه برد و خودش را به خداون سپرد فرعون تعقیب کرد او را مفسرین نوشتند الان تعداد الله بهتر میداند بسیاری از مفسرین مثل تفسیر بحرالمهید تفسیر مدارک التنزیل اینا نوشتند که لشکر بزرگ حدوداً هزار نفر را فرعون به تعقیبش رسیدند بگردند هر جا شده پیداش بکنن دستگیرش بکنن اینا رفتن گشتن اینها اینقدر تو جنگل ها و تو کوها و تو دشت ها سرگردان شدند که خدای عزواجل خود اینها را از بین برد از سرگردانی از گرسنگی از تشنگی حلاق شدند بعضی ها حلاق شدند و مردند بعضی ها خودشون را رسندند به مثل برگشتند و به فرآن گفتن که نیافتیم بقیه دوستان کجا میگه همه کشته شدند همه مردند فرآن باور نکرد گفت که این توتیهی هست این ای هست این حتما رفته اون طرف بعضی گرویدن بعضی ها آمدن میگه اینها را هم از بین برد اعدامشون کرد بالاخره نابودشون کرد خداوند به این شکل اون مرد مومن را حفاظت فرمود، هنا تفسير بحر المحيط وتفسير مدارك نوشفن وحاق بآل فرعون سوء العذاب النتيجة حقبت فوقاه الله أما نتيجة باطل وحاق بآل فرعون فرود آمد برآل فرعون مع فرعون همرا فرعون سوء العذاب عذاب بد ببینید اینجا سه عذاب ذکر شده یکی سوء العذاب زیرش منویسید یعنی دنیاوی غرق سوء العذاب دنیاوی یعنی غرق فران به سوء العذاب گرفتار شد یعنی غرق شد النار يرضون عليها و وعشيه بعد از اینکه غرق شد آتش بر او ارزه میشه صبح و شام یعنی صبح و شام فرعون و فرعونی ها بر, آتش بر آتشی که در برزخ است در قبر هست بر اون آتش عرضه می شوند عذاب, عذاب داده می شوند. این عذاب عذاب قبر است این عذاب عذاب قبر است اینایت داشته باشید که عذاب دنیا سراحتا ذکر شده در قرآن عذاب جهنم و عذاب آخرت هم سراحتا ذکر شده اما عذاب قبر در قرآن خیلی اشاراتی نسبت به اون آمده در حدیث صراحتن آمده رسول الله صلی الله علیه وسلم درباره عذاب قبر صراحتن فرمود کسی پیرزنی آمد خدمت ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی از یهود بود گفت که او گفت من از عذاب قبر پناهمی بنام حضرت عایشه از رسول الله پرسید رسول الله مگر در قبر عذاب هست فرمود بله و بعد از اون فرمود که رسول الله هم میخاند ما هم میخاندیم همین دعا که از چند چیز پناه میبردن یکی از اونها عذاب قبر بود خیلی احادیث زیادی هست در عذاب قبر در حد تواتر در آیات زیادی هم به عذاب قبر اشاره شده بسیاری از افراد هستند که منکر عذاب قبر هستند خودشون را مسلمان هم میگویند و عذاب قبر را انکار میکنند این جمله گروهی که خودشون را اهل قرآن مینامند اهل قرآن کسانی هستند که احادیث را قبول ندارند و نسبت به احادیث و روایتها بی اعتماد هستند و میگویند که در قرآن ذکری از عذاب قبر نیست لذا ما عذاب قبر را قبول نداریم در حالی که در قرآن ذکر هست همین ذکرش هست النار یعرضون عليها و وعشیا آتش صبح و شام بر اونها عرضه میشه خب این عذاب عذاب جهنم که نیست چرا در ادامه چی میفرماید عذاب سوم و يوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب روزی که قیامت برپا میشه قیامت قائم میشه دستور داده دا میشه که داخل کنید آل فرعون را همراه با فرعون در سخترین عذاب خب این عذاب جهنم و عذاب که آتش بعد از اس قیامت است این که فرمود نار و علیها این قبل از قیامت است پس قبل از قیامت کجا است در قبر است و همه مفسرین ما نوشتند این آیه آیهی هست که عذاب قبر نسبت به همه آیات دیگر واضحتر تو این آیه بیان شده الله من نتسفيد در تفسير مدارك نوشته هذه الآية دليل على عذاب القبر هذه الآية دليل على عذاب القبر وبعد تفسير قرطبي نوشته والجمهور على أن هذا العرض في البرزخ جمهور معتقد متقدس انك فرمودي النار يعرضون عليها آتش بر اونها ارزه می شود در برزخ است اصل قبر همون است این حفره ای که من شما چاله ای می زنیم و جسد را می زنیم این هم قبر است این هم قبر است ولی این مجازاً قبر است حقیقتاً قبر اونجایی هست که روح میره اگر انسان انسان بدی باشد فشارش میده تو حدیث اینها آمده اگر انسان انسانی خوبی باشه خیلی برایش به اندازه 70 زیرا،, زیرا یعنی خیلی زیاد. 70 یک عددی هست که نای از کثرت. خیلی زیاد براش میشه باز میشه. دریچه ای به طرف بهشت براش گشوده میشه، پیش نشون داده میشه اون جای تو است. خب اینا همه در همون عالم برثق است. در اون عالم است. و احوال مختلفی آمده در شهدا شهده آمده که شهدا همین که آیه شریف هست این در ربه یرزقون پیش پروردگار رسق روزی میخورند در سنان ترمیزی تفصیلش آمده تفسیرش آمده که خداوند ارواح اون شهدا را در کالبود پرندگان سبزرنگی قرار میدهد اینها قندیل های دارند در زیر عرش پروردگار و همش میروند تو باغات بهشت رزق میخورند روزی میخورند عیش میکنند کیف میکنند تفریح میکنند یورزقون به این معنا هست و اونهایی که عذاب داده میشوند مثل فرعونیان اینجا خاندیم ارواحشان ارز کنم که عذاب داده می شون اجسامشون هم عذاب داده می شون ارز میکنم اما ارواحشون چطور؟ حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنهم می فرماید که ارواح آل فرعون در اجواف و کالبدهای پرندگان سیاه رنگ و بدشکلی انتور در شهید میاد پرندگان سیاه رنگ و زیبا و خوشگل آل فرعون را عبدالله ابن مسعود عبدالله ابن مسعود این چیز را که میگه از عقل خودش لابد نمیگه نمیتونه چین چیزی را اجتحاد بکند قطعا از رسول الله شنیده میگوید که در ار ارواح آل فرعون در کالبد پرندگان سیاه رنگی قرار میگیرد و هر روز بر آتش عرضه میشود آتشی که در برزخ است اونجا هر روز کباب میشم یعنی به ازاب گرفتار میشه این در تفسیر معالم هست در تفسیر قرطبی هست در تفسیر روح المعانی هست ارواح آل فرعون فی اجواف طیور سود یعرزون على النار ارواح آل فرعون در کالبود پرندگان سیاهرنگی بر آتش عذ می شود و این سور صورت هایی که گفتیم اونجا میگیم صورت های پرندگان سبز رنگ اینجا می پرندگان سیاه رنگ در واقع معلوم میشه که انسان عملش هر طوری باشه اون حال که به انسان داده میشه بر اساس اعمال است اگر اعمال بد باشه اون بد شکل میشه اگر اعمال نیک باشه اون زیبا هست و هذه طیر صور تخلق منهم من صور اعمالیم بازم روح المانی این پرنده که بد شکل است چون اینها از اعمالشون چی میشه گرفته میشه خب پس این که ما توضیح دادیم پس این عذاب فقط مال روح شد مال جسم چی جسم هم به عذاب گرفتار میشه اما کیفیتش ببین تا جایی که ما حدیث سحی داشته باشیم اقوال صحابه و اقوال سلافیمون را داشته باشیم تا اون جا بیشتر از اون توقف میکنیم اجازه نداریم در مسائل اجتهاد بکنیم لذا جسم هم عذاب داده میشه وقتی که گفته میشه عذاب قبر هست و عذاب قبر حقه و آن حضرت صلی اللہ به سبب به قبور اشاره کردن که اینها عذاب داده میشوند دوتا قبر بودند یا اینکه خدای عزوجل یک رابطه‌ای بین جسم و روح ایجاد می کند تا اگر اونجا عذاب داده میشه اینجا هم حس بکند اگر اونجا لذتی هست اینجا هم احساس بکند یا اینکه الله قادر است بدون اینکه روح برگردد این جسم را هم چیکار بکند عذاب بده یا این جسم را لذت بده لذا اینجا چون که ما روایت خاصی نداریم معتقدیم که عذاب هست یا لذت برای جسمم هست اگر صالح باشد اما روح همونطوری که در این روایت های مختلف آمده در عالم برزخ گرفتار میشه و روح آل فرعون گرفتار هست چنانچه الله تعالی می النار یعرضون علیها غدوا و عشية آتش أرزميش برانها الصبح و الشام و يوم تقوم الصعه و روزي كي قيامت بر باميش أدخلو أيو قالو له قفتميش داخل كنيد آل فرعون رحم ربا فرعون أشد العذاب سخترين عذاب آل فرعون سخترين عذاب داخل معلوم میشه بسیاری از کسانی که به عذاب گرفتار میشن سرکرده ها هستن سرکرده های کفر و شرک و و بسیاری کسانی که دنبال روی انها بودند، مغلدان انها بودن تابعان انها بودن پیروان انها بودند همه گرفتار میشن حال اینجا خداوند اززوجل برای عبرت ماها محاجه و جر و بحث بین تابعین و مطبوعید را می فرماید که اینها با هم درگیر می شوند با هم دیگر محاجه می, می کنند می فرماید و اذی یتحاجون فی النار زمانی که با هم دیگر بحث می کنن. جر و بحث می در آتش یتحاجون محاجه می کنند یعنی جنجال می کنن. درگیر می شوند فيقول الضعفاء للذين استكبروا إن تفسير محاجحة ضعفاء يعني تابعين فيروان فيقول الضعفاء للذين استكبروا ميقوان زيفان فيروان تابعان براي مستكبران براي متبعين براي رؤسا وسردارانشان إنا كنا لكم تبعا یک مطالبه از اونها در اما قبل از اون مطالبه دلیل به چه دلیل ما از شما میخوایم از کسی دیگه نمی چون ما در دنیا تابع شما بودیم اینا کننا لکم تبعا همانا ما تابع شما بودیم ما پیروب شما بودیم هرچی شما گفتین ما عمل کردیم فهل انتم مغنون عنا نصیبم من النار آیا شما دف میکنید از ما بخشی از آتش را میتونید بخشی از آتش را دور کنید از ما دف کنید از ما قال الذين استكبروا جواب متبوعین جواب که از کنم به عنوان رؤسای کفر و شرک بودند قال الذين استكبروا انا كل فِيهَا همانا ما همه در این آتش هستیم مگر ما بیرون آتشیم ما هم تو آتشیم ان الله قد حكم بین العباد همانا الله فیصلے فرموده بین بندگان فیصلے خدا هست ما هم چاره ای نداریم شما هم صبر کنید وقتی که اینها ناامید میشوند از مطبوعین اون وقت رو به طرف خزانه میکنن به طرف داروغه های جهنم می کنند اونها رو شما دعا کنید یعنی شما سفارش شما بکنید و قال الذین فی النار می کسانی که در آتش هستند این کسان کیند مفسرین نوشتند تابع و متبو قال الذین فی النار من الزعفاء والمستکبرین هم زعفاء نمی تحمل کنند هم اون رس رؤسا ایش نمیتونن بکنن تفسیر روح المانی نوشته لما ضاقت به الحیل وعيت بهم العلل همه ها تمام میشه همه تدابیر و همه کارهایی که میخوان برای نجات بکنن همه به میرسه خسته میشن نمیتونن کاری بکنن هر دروغی هر بهانه‌ای هر عذری پذیرفته نشد حال چیکار میکنن حال رویه سخن بسوی خزنه و قال الذين في النار لخزنه میگوین کسانی که در آتش هستن به خزنه جهنم میگن لخزنه جهنم او دعوا ربكم شما رب رب صدا بزنید شما از رب بخواهید چه بخواهید میدونن که نجات نیست فقط مرخصی میخوان یک روز یخفف حنا یوما من العذاب تخفیف بدهد از ما یک روز از عذاب یک روز رهایی یک روز تخفیف فقط یک نفسی بکشیم راحت بشیم قالو اولا لم تكن تاتيكم سوالی مطرح میکنن که این سوال بیشتر زجرشون میده از نظر روحی دوباره یادآور میشه برای اونها ما تو دنیا ب... رسول نیامد به شما نگفتند برای این روز یادآوری نکردند الان بیادشون میاد که آمدند بیشتر شکنجه روحی میبینم عجب اشتباهی کردیم ما چرا نپذیرفتیم قالو اولم تکو تعتیکم رسولکم بالبینات آیا نبود که بی آیت پیش شما رسولتان با بینات با دلائل رسول با دلائل نی آمدند با مدرک نیامدند قالو بلا شرا آمدند وقتی که میگویند بله آمدند پس فرشتگان میگویند داروغه ها میگویند که وقتی که آمدن قالو فدعو شما خودتون خدا را صدا بزنید خودتون دعا کنید ما کاری نداریم ما هیچ ربطی با شما نداریم خلاصه از فرشتگان هم ناامید میشوند از فرشتگان که ناومید میشوند خودشون دست به دعا بر میدارند آیا وقتی که خودشون دست به دعا بردارند این دعا تأثیری دارد اینجا این سوال مطرح میشه که دعا تأثیری دارد خداوند جواب میده پاسخ میده و ما دعاء الکافرین الا فی ضلال یعنی دعایی که کافر انجام میده دعایی که کافر میکند این دعا نیست مگر بیهوده دلال یعنی بیکار بیهوده بیفایده، هیچ تأثیری نخواهد داشت یعنی چه فریاد بزند چه فریاد نزند چه دعا بکند چه دعا نکند هیچ سودی براش ندارد. انَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدا و در آیات گذشته ما که الله عز و جل موسیٰ علیه و السلام را در مقابل فرعون یاری فرمودند نصرت فرمودند و فرعون و لشکر کفر شکست خورد خار و زبون شد در این آیات می میخونیم که این نصرت و این یاری اختصاص به موسی و همراهانش نداره فقط خدای تعالی موسا را نصرت بکند و بقیه را نصرت نکند نه اِنَّا لَنَانْصُرُ رُسُولَنَا اِن رَبْت ما البته یاری می کنیم رسولمان را اهل ایمان کسانی که مؤمن واقعی باشند خدا اونها انها را هم یاری می فرماید کجا یاری می فرماید در هر دو دنیا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد هم در زندگی دنیا یاریشون میکنیم نصرتشون میکنیم و یوم یقوم الاشهاد روزی که گواهان قائم می شوند بر می یعنی روز قیامت هم در این دنیا و هم در قیامت در قیامت چطور یاریشون میکنیم بعضی ها میگوین این از قبیل اللفتها تبنن و ما انباردن هست این یک استلاعی هست معنای این استلاع اینه که گاهی دوتا معمول برای دوتا فعل هست ولی یک فعلی ذکر میشه و یک فعلی دیگر ذکر نمیشه خود خودش شما اون فعلی دیگر را میفهمید اسیاق تشخیص میدهید مثلا به زبان عربی گفته میشه که اون اون اللفتها تبن و ما انباردن او را اللف دادم او را خوراندم که و آب خونک خب آب خنک چیزی نیست که به عنوان معقول باشه به عنوان الف باشه بلکه در زبان عربی برای او شرب و سقایه استفاده میشه لذا خود به خود هر کسی که با زبان عربی آشنا باشد می دونی که الف توها تبن و ما ان بارده تو سقیتهمان باردان هست آب خنک او را نشاند او را ارس کنم که سقایه کردم پس اینجا هم بعضی گفتند که به همین صورت هست در قیامت نصرت کردن و یاری کردن یعنی چه ای و نجزیهم پس اصل عبارت این طور میشه انا لننصر رسولنا والذین آمنوا في الحیات الدنیا و نجزیهم یوم یقوم الاشاد در این زندگی دنیا ما رسول خودمون را یاری میکنیم و نه تنها رسول را بلکه کسانی که ایمان آوردند و در روز قیامت آنها را یاری می انهارا پاداش نیک میدهیم جزای خیر میدهیم و نجزیهم یوم یقومل الاشهاد خب حال خداوند تعالی در دنیا چگونه یاری می فرماید علامه ابن جریر در تفسیر خودش نوشته در دنیا یاری کردن اما بالغلبت یا انها را غلبه می دهد او الانتقام یا از انها انتقام می گیرد از دشمنانشون به نجات المؤمنین که مؤمنین را نجات می چنانچه انتقام گرفت از فرعون مؤمنین را نجات داد و فرعون را چکار کرد غرق کرد او انتقام بعد وفاتهم یا انتقام میگیرد بعد از وفاتشون یعنی انبیا از این دنیا روند بعد از وفاتشون از دشمنانشون انتقام میگیرد چنانچه سیدنا عیسی علی الصلاۃ والسلام بعد خدا وند از اینکه به آسمان ها رفتند خداوند از یهود انتقام گرفت که توضیح میدم پس این صورت یاری رساندن هست اما در دنیا نصرت الهی بر دنو هست در آخرت مشخصه در آخرت بهشت و نعمت های بهشت و روح و ریحان و راحت اونجا اما در دنیا چطور خداوند یاری می فرماید یاری کردن در دنیا بر دنو هست یکی معنوی و یکی مادی یاری کردن معنوی اینه که خدای تعالی اون دین را غلبه میده اون دین را از نظر حجت برتری میده از نظر برهان در صدر هست در رأس هست مثلا امروز ببینید دین اسلام با وجودی که شب روز دشمنان توت دارند شب روز تبلیغات برای دین اسلام هست یا نیست دین اسلام را یک دین خشن معرفی می کنند. دینی که می که در اون خونخاری هست و فلان هست بر علیه قرآن کریم شب روز شبهات و توت و مکر و کانالهای متعددی بر اره قرآن فعال هستند ولی با وجود این همه تبلیغات اولا از نظر حجت و از نظر برهان آنها کم دارند به همین خاطر خیلی ها هستند حتی از یهود و نصارا که اقرار میکنند رسول الله صلی الله علیه و الیهم پیامبر هست اما میگن پیامبر ما نیست پیامبر مسلمانان است به همین خاطر بیشتر معروف کردم پیامبر اسلام یعنی پیغمبر مال چیه مال اهل اسلام مال ما نیست به عنوان پیغمبر بعضی قبول دارن. از نظر معنوی نصرت اینه که با وجود اینکه این همه توته هست گاه گاهی میشنوید خیلی از علما خیلی از دانشمندان خیلی از راهب ها خیلی از احبار ایمان میآورند نمیشنوید همیشه خیلی وقت هست که ایمان می با وجودی که اونها چقدر تبلیغات میکنند چقدر دشمنی دارند ولی باز هم باز هم گرویده قرآن میشند هزاران مردم گاهی اخبارشون به ما میرسد گاهی نمیرسد هزاران نفر باوجود که سعی میشود که آحاد از قرآن فاصله بگیرند همون طوری که مشرکین در صدر گفتند و قال کفر لا تسمعوا لهذا القران فيه امروز هم چنان بر علیه قرآن تبلیغات چران قرآن را بدنام کردند و میگویند قرآن کتابی هست که به خشونت و به جنگ و به خونریزی وادار میکند این کارها را میکنند تا پیروانشون از قرآن فاصله بگیرند اما بیبی نیم هزاران نفر از مردمشون از افرادشون هستن که قرآن را مطالعه میکنن از قرآن متاثر میشن چه با ایمان آورند. پس این غلبه غلبه چی هست معنوی هست اما غلبه مادی غلبه مادی که خداوند رسول را یاری میفرماید دو تا مثال عرض میکنم اول مثال سیدنا عیسی علیه الصلاه و السلام زمانی که سیدنا عیسی حضور داشتند در زمین تشریف داشتند پیروان عیسی در اقلیت بودند و نتوانستند حتی از عیسی علیه صلی اللہ دفاع بکند یهود حجوم آورد یهود در اکثریت بودند یهود حجوم آورد چنان حجوم آوردند که ایسا علیہ السلام را دستگیر کردند و به گمان خودشون بدار کشیدند اعدام کردند گرچه خداوند و ما قتلوه و ما صلبوه ولیکن شبه لهم رفعه الله ولی بعد از اینکه به گمان مسیحیان ایسا مظلومانه اعدام شد اما ببینید خدا چطور یاری کرد. که بعد از اینکه ایسا علیه السلام رفت شد خداوند تعالی روز بروز به برکت جد و جهد حواری شما انشاءالله می خانید که حواری سه گروه شدند یه گروه جهاد کردند یه گروه تبلیغ کردند یه گروه رفتند تو جنگل ها و تو غارها به طاعت و بندگی مشغول شدند اون زمان دین حق همین ها بودند اسلام هنوز نے بود۔ لذا خداوند روز به روز یهود را ارسه را بر یهود تنگتر کرد یهود جمع شدند شکست خوردند تا اینکه آخر اکثریت با مسیحیان شد. بیت المقدس از یهود گرفته شد به دست مسیحیان افتاد. مسلمانان از دست مسیحیان گرفتند در زمان سید عمر فاروق رضی الله تعالی. یهودی نبود. یهود روز بروز جمعیتشون کمتر و کمتر تا به امروز یهود از نظر جمعیت کمترین جمعیت را از میان ادیان دارد ببینید پس ایسا لسلات و السلام را و مسیحیان را خداوند چطور؟ یاری کرد اینهایی که نتونستن حتی از پیغمبر خودشون دفاع بکنند اما خداوند یاریشون کرد پس بالغلبت او الانتقام به نجات المؤمنین او الانتقام بعده وفاتهم این شد مثال دومی که میخوام ارز بکنم که خدای تعالی نصرت و یاری میفرمان مسلمانان را رسول الله صلی الله علیه و سلم در ابتدا با اصحاب و یاران چه وضعیتی داشتند همیش زیر شکنجه بودن صحابه همیش مشکلات بود تحریم و تبعید و تمام ازیت و آزار حتی جایی نبود پناهگاهی نبود که برند مشوره کردند یک گروهی رفتن به طرف حبشه بعدن انصار مدینه گفتن یا رسول الله اینجا تشریف بیارید خلاصه همین گروه اندک که جایی نداشتن مدت زیادی طول نکشید خدای عزواجل چقدر غلب داد اول همین سرداران کفر و شرک که بدترین احوال را بر اونها می آوردن خدای تعالی همه را در جنگ بدر کشت از بین برد کشته شدن با و با خاری و یا ازیر شدند و بعدن مکه مکرمه فتح شد طائب فتح شد غنین فتح شد یمن فتح شد مصر و شام و یمن و بلاد دیگر تا ایران و روح همه دنیا فتح شد در مدت بسیار کوتاری تمام خلاف زمان رسول الله که فتوحات آغاز شد در مدینه چند سال بود؟ ده سال بودان حضرت صلی اللہ علیہ بعد از اون وفات کردند و بعد زمان خلافت راشده خلفای راشدین تمامش سی سال هم نبود حتی در زمان سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ با توجب یه سری مشکلات داخلی اون زمان فتوحاتی هم نبود بیست سال بیست پنج سال در این مدت کوتاه تمام دنیا را تمام دنیا به زنو افتاد قدرت های شرق و غرب ایران و رومی اون زمان تمام بلاد فت گردید پس آیا این نصرت هست این یاری هست یا نیست این یاری مادی هست پس همونطور که قرآن فرموده این وعد وعده را اگر ما بررسی بکنیم محقق هست اما همیشه فتح نیست این را هم بدونید هر روز در هر معرکه در هر میدان این نیست اگر اینطور باشه تا اهل حق بلند بشند و اهل باطل شکست بخورند اون وقت گویا این یک نوع کرامت و موجزهی است که خدا نشان میده و خود خود یک علامت ظاهر و بیانی میشه که اینها حق هستند اونا باطل هستند تا رو میشه اونا شکست میخورن ولو اینکه امکاناتشون بیشتر بشه، اون وقت دنیا از وضعیت اینکه دار الامتحان هست چی میشه خارج میشه دیگه تمام میترسند که ما تا مسیر کفر را بگیریم شکست میخوریم فورا همه مجبورن میعیند و چی میشون مسلمان میشون اون وقت دار امتحان نمید به همین خاطر درست در بدر موفقیت اما بعد از بعد خدا حکمت کارهای خود چرا بهتر میدوند بعد از بعد احدی هم خواهد بود شهید هم خواهند داد تا اینکه چی؟ تم بلاخره خدای عزو جل طور که رسول الله فرمود که الحرب و سجالون در واقع این جنگ یه ای دلوی هست که نوبتی هست یه روزی مال این گروه یه ای روزی مال اون گروه لذا الله تعالی گاه گاهی نه همیشه نه بیشتر اما کمتر گاه گاهی میبینیم که برای مسلمانان هم امتحان میارد از مایشت گاهی میبینیم تر میدان پیروز میدان کفار هم میشند همیشه غلب با مؤمنین اگر باشد خود به خود به این نتیجه میرسند که اینها بر حق هستند از ترس هم که شده نه روبرو به و نه راه کفر را بر میگوزینند بلکه از ترس هم شده مسلمان میشوند اون وقت پس این اسلام اختیاری نخواهد بود این اسلام اجباری این اسلام در شرایط رعب و وحشت خواهد بود این مطلوب خدای عزوجل نیست خداوند ایمان و اسلامی میخواد که در اونچی باشد اختیار باشد دنابراین این را راست کردم که نصرتی و یاری دونو هست یکی معنوی یکی مادی امروز هم مسلمانان اگر واقعا شاید در دل شما این شبه بیاد که مسلمانان امروز از نظر میدانی بیشتر در بیشتر میادین شکست می خورند یا شکست خوردند جنگ های را با اسرائیل نگاه کنید اشغال کشورها را نگاه کنید کشور عراق کشور سوریه کشور افغانستان کشمیر پاکستان همه جا مسلمانان ولی وقتی که مسلمانان به معنای واقعی جهاد را جهاد را آغاز میکنن و جهاد را ادامه می دهند و با سختی ها و شدائد تحمل میکنن کنند نصرتشون میده. دو بار نمونه اش را در افغانستان دیدیم یه بار شوروی که بزرگترین ابرقدرت شرق بود خدا تعالی خار و زبونش کرد شکست خورد اما بعدا امتحان مجدد بر ملت افغانستان آمد چون با هم اختلاف کرد. و الا اگر با هم اختلاف نمی بار دوم لشکر کشی کفر بر افغانستان نمیشد. بار دوم دو وقتی که کشورهای اروپا و ناتو و امریکا و تمام کشور کسی و کشور بودند اینها مورد حجوم قرار دادند دوباره مسلمانان جهاد کردند اللہ تعالی، چقدر طور زیاد طول نکشید بیست سالی هم طول نکشید دوباره خدای طالب تمام این قدرت را شکست داد و ناگذیر شدن تمام شرایط را بپذیرند بگوین فقط به ما حمله نکنین ما بیرون میشیم تمام امکانات و تصدیحات خودشون را گذاشتند و رفتند مگر غلب کدومه این, این ملت چی داشت چه قدرتی داشت از نظر مادی چقدر سرمایه داشت اب امروز مشکل داره مشکل اقتصادی دارم پس ببینید وعده الله عزوجل حق است اما شرطش اینه وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنين شما مؤمن و واقعی اگر باشید شما موفق میشید شما پیروز میشید لذا الله میفرماید اننا الانصر روسلنا همانا ما حتما یاری میکنیم رسولمان را و الذين امنوا و ایمان آوردن فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا در زندگی دنیا و یوم یقوم اون روز قیامت روز گواهان هست. انبیا گواهی می‌دهند. ملائکه گواهی می‌دهند. افراد مختلفی هستند که اونجا گواهی میدانند زیرا به روز قیامت روز اش</thead> میگویند. یوم یکومل اشهاد مبدل منهو هست. بدلش اون روز که یکومل اشهاد چه روزیه؟ یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم. روزی که نف نمیدهد به ظالمان یعنی مشرکان به مشرکان نف نمیدهد معذرتهم عذر خواهیشان یا بحانهایشان. بحانه هایشان میآورند خدا یا چنین بود چنان بود نه هیچ نفعی ای. این بحانه ها ندارد و لهم اللعنت و لهم سوء الدار برای انها لعنت خواهد بود یعنی دوری از رحمت پروردگار و لهم سوء الدار برای آنها دار سوء هست دار بد هست یعنی عذاب خدا هست و سختی ها و شدائد و مشکلات هست و لقد آتینا موسا اینجا دلیل نقلی تفصیلی از موسا علی صلی اللہ بر اثبات مدعا بر اثبات مدعا شاید در دل شما بیاد که ما قبلا دلیل نقلی از موسی خاندیم اما اونجا دلیل نقلی بر چی بود؟ بر اولم یسیرو فی الارد فیانظرو کیف کان عاقبتو الذین من قبل کانو من قبلهم قبل از داستان موسی خداون فرمود در زمین سیر بکنید و ببینید انجام کسانی که قبل از شما بودند انجام اونها چی شد؟ اونها بیشی بلای گرفتار شدند و بعدا خداوند دلیل عقلی دلیل نقلی اجمالی از همه انبیا ذکر فرمود که همه انبیا آمدند پیروانشون وقتی که نافرمانی کردند فخذهم الله بزنوبهم بعد دلیل نقلی از موسی ذکر کرد که موسی هم آمد تفصیلی فرعون قبول نکرد فرعونیان قبول نکردند داستانش رخان را که چگونه خداون فرعون را گرفتار کرد. پس اون دلیل نقلی در رابطه با همون جریان چی بود؟ معاخزه در رابطه با گرفتار کردن زلمه اما اینجا دلیل نقلی بر اثبات مدعا هست مدعای سوره چی بود؟ فدعاللہ مخلصین له الدین فقط خداوند عز و جل را فریاد بزنید در عبادات او را یگانه بدانید مخلصین له الدین مخلصین له الدعا و مخلصین له العباده لذا خداوند می فرماید همانا ما هم هدایت دادیم و وارث قرار دادیم او بری اسرائیل را وارث چی؟ کتاب تورات بهشون دادیم خب حال چگونه دلیل نقلی هست؟ ببینید القرآن و یفسر بعضه بعضا در سوره مبارکه بنی اسرائیل هست که خلاصه مضمون تورات چی بود و آتینا موسی الکتاب وجعل الله هدا لبنی اسرائیل همون ترکی جا فرمود موسی الهدى و آتینا موسی الکتاب وجعل الله هدا لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا هدایت قرار دادیم مزمون و خلاصه مزمونش این بود که اللہ تتخیزو من دونی وکیلا بغیر از من پروردگار هیچ کسی را وکیل و کارساد خود خودتون قرار ندهید پس در تورات در کتاب موسی که هدایت بود همین مب... م... مسئله توحید ذکر شده بود هدن و ذکر لئول الباب. در حالی که هدایت بود و پند بود اما پند و اندرز و هدایت برای همه نه برای عقلمندان برای اولوالالباب کسانی که واقعا عقل و درایت داشتند درک و اندیشه داشتند و توانستند از تورات استفاده بهینه ببرند استفاده خوب ببرند پس معلوم میشه که مخاطبین دو قسم بودن يقولوه أولو الألباب كي متبع ومصدق بودن أولو الألباب كي متبع ومصدق وقولوه دوفم غير أولو الألباب كي منكر و كافر بودن مثل فرعون وفرعونيان يا كساني كس بني إسرائيل هم راهين فاقرة در بيش گرفتا مثل قارون فصبر فصبر اینجا تسلی برای پیامبر است، اما ربطش با گذاشته اینه که همون طور که در بنی اسرائیل الباب متبع و مصدق بودند و غیر اولوالباب منکر و مخالف در امت شما هم همچنی اقل مندانی هستند که متبع و مصدق قرآن مثل ابو و عمر و عثمان و علی و صحابه رسول الله و غیر اقل مندانی که منکر و مخالف مثل أبو جهل و أبو لهاب و و وغيرهم، بس فصبر لي براء رسول الله، فصبر إن وعد الله حق، أي بيان بر من صبركن شكيبا باش هما نواديه الله حقس وعده الله تيه الآن خلني إن لنا نصرة والذين آمنوا في الحياة الدنيا، بس وعده خدا باينش وغلبه. خدا این وعده حق است و استغفر اما الله عز برای اینکه این وعده پروردگار محقق بشه چند چیز بیان می فرماید یکی استغفار ببینید استغفار استغفار برای گناهان آیا مگر پیامبران گناه دارند؟ ما که معتقدیم اهل سنت والجماعت پیامبر معصوم هستند از گناه پاکند از گناه به دور هستند بسیاری معتقدند اینجا خطاب رسول الله صلی الله علیه و وسلم را هست مراد امته خود پیامبر از گناه پاک هست قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر پیامبر اصلا گناه ندارد اما خیلی جهات خطاب پیغمبر را هست و مراد امت مثلا در اول سوره احزاب شما می یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ای پیغمبر از خدا بترس کافرین و منافقین را اطاعت نکن خب این خطاب رسول الله را هست ولی مراد من تو هستین اینجا هم وستغفر لذنبکا برای ماها هست دوم دو اینه که پیغمبر را هم خطاب هست اما بسیاری جاها استغفار برای گناهان سبب رفع درجات میشه کسی که گناهی ندارد مثل پیانبر ماهای که از گناه و تقصیر هستی ما اگر استغفار می خانیم امید هست که استغفار خواندن ما باعث چی بشه باعث از بین رفتن گناهانمون بشه اما برای پیغمبر باعث چی بشه رفعه درجات بشه رسول الله صلی الله علیه و وسلم به کثرت استغفار می خواندن با وجود که گناه نداشتند اینی لا استغفر فی کل یوم 100 مره 100 یعنی خیلی زیاد عدد صد مراد نیست مئت یک عددی هست که برای کسرت بکار برده میشه یعنی من زیاد روزان استغفار میخوانم پس این نیست که هر کسی استغفار میخوانده اون گناه کرده بنابراین برای من و شما استغفار الله سبب کفاره سیاد میشه اما برای معصومین استغفار سبب چی میشه رفعه درجات میشه و بعضی گفتند که مراد از زنب لغزشات است زلات است درست انبیا از گناه پاک اند معصومان اما زلاتی داشتن زلات و لغزشات یعنی کاری که خلاف اولا باشد کارهای خلاف اولا گاهی صادر می شود خداوند تعالی تذکر هم میدادند پس اینها در واقع الحقیقه گناه نیستند اما با توجه به مقام شامخ و بلند انبیاء انها برای خودشون گناه میپنداشتند بس ان برای اون مسائلی و احکامی که شما اونها را گناه میپندارید گرچه گناه نیستند جنانچه اللہ معلوسین جنیسا وستغفر لذنبکا یعنی اقبل علا امر دین بر امر دین پیش بیا انجام بده و تلاف ما ما يفرت يا يفرت تلافی ما ربما یفرت یا یفرت تلافی بکن اون چیزهای در که بسا اوقات شاید اونا زیاد رویه تفرید کتایی سب بشن مما یعدب بالنسبت ایلیک زنبا و ایلم یکنهو از اون چیزهایی که شاید نسبت به شما گناه حساب بشه گرچه حقیقتاً گناهی نباشه ولی چون خلاف اولا پیامبر جایگاهش خیلی رفی از پیامبر برای خودش اونها را چی می داند؟ گناه می داند و آخرین توجیهی که می خواهم بکنم اینه که از قبیل حسنات و الابرار سیئات و مقربین است توضیحش اینه که خیلی چیزها هستند از نظر نیکان یعنی مسلمانان عادی اونها حسنه هستند از اعمال خوب هستند اما از نظر مقربین اونها گناه هستند اونها گناه هستند به عنوان مثال چیزی که همه علماء ذکر می کنن. من و شما مسلمان عادی هستیم من و شما اگر بتونیم نماز اشاره با جماعت بخانیم این توفیق حاصل بشه نماز اشاره با جماعت بخانیم بعد بریم استراحت بکنیم صبح هم بلند بشیم قبل نماز نماز فجر هم با جماعت بخانیم این از نظر ما جز حسنات است توفیقیه خوشحالیم خورسندیم این توفیق حاصل مشد اما یکی از بندگان خاص مقرب اگر این طور باشه زندگیش او زارزار زار گریه میکنه چرا برای نماز شب بلند نشده او این را برای خودش چی میدونه؟ سیعه میدونه من و تو حسنه میدونیم او برای خودش این را از سیعات میدونه که تمام شب خوابید هیچ بلند نشد نیم شب آه و نالی نکرد بس ببینید ما که خوابیدیم گناهکار نشدیم او هم گناهکار نشد اما اونچو جایگاهش رفیح هست او این را برای خودش چی میداند؟ گناهی میداند پس انبیا علیهم صلوات و تسریمات گاهی کاری را اگر انجام میداند این کارشون ولو اینکه که فی،, فی نفس الامر گناه نیست اما نسبت به مقام شامخ و بلند اونا برای خودشون گناه میبینداردن پس اون اونی که شما گناه میپنداری برای اون استغفار بخوان خب اولین چیز فاسبر صبر تحمل دوم دو استغفار سوم سب و سبح بحمد ربک بالعشی والابکار تسبیح بگو تو ان رب حمد رب صبح و شام ای علی الدوام عشی شام هست و ابکار صبح لذا یعنی همیشه على دوام صبح و شام خدا را یاد کن تسبیح و تحمید خدا بیان کن معلوم میشه که این مسائل مسائلی هستند که نصرت را زودتر میکنند ذکر پروردگار به خصوص تسبیح و تحمید همیشه در مشکلات همیشه انسان با بخواند، اما در مشکلات اینها سبب میشوند که نصرت و ایاری زدتر بیاید. باس اینها را الله عزّ و به پیامبرش توصیه فرمودند و تسلی دادند. ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاعهم در آیات گذاشته ما دلیل نقلی از تورات موسیٰ علی و السلام خاندیم و بعدا تسلی برای رسول الله بود اما در ادامه چون مبحث مبحث توحید بود الله می فرماید کسانی که در مقابل توحید قیام می و جدال می کنند آیات ما چرا جدال می هیچ دلیل و مدرکی ندارند غیر سلطان اطاهم یعنی بدون دلیل عقلی و نقلی که پیششون بیاید سلطان دلیل عقلی و نقلی که اطاهم پیششون بیاید چرا این کار را میکنن ببینید خدای از و در این آیه سبب جدال را بیان میفرمد این فی صدوری هم سبب جدال است اصلش اینه بیشتر ملاهای که بر مسیر باطل هستن ملاهایی که حق را کتمان می دین فروش هستن اونها با انبیا و با اهل حق همیشه در گیر هدف حدف انها چیه الله تعالی می فرماید هدف انها اینه که یک کبری یک بزرگی یک پیشوائی و رهبریتی که اونها برای خودشون قائل هستن می خواهند که اون پیشوایی را اون مرجعیت را اون را از دست ندهند یا به اون برسند اما خدا می فرمد ما هم بالغی اونها به با اون نمی رسند این پیشگویی پروردگار ببین مثلا یهودی ها یهود با وجود که میدونستان رسول الله صلی الله علیه و سلم به حق است بر مسیر حق است اما باز هم مخالفت کردند مبارزه کردند هدفشون این بود که اون مرجعیتشون باقی بماند مردم کماکان اونها را رهبران خودشون بدانند الله میفرماید پس هدف این آقا چیه همون کبرش هست همون بزرگیه که برای خودش قائل هست رهبریتی که برای خودش قائل هست مرجعیتی که برای خودش قائل است او باقی بماند و یا به او برسد اما الله فرما به او نمیرسد زیرا الله میفرماید ان الذين یجادلون فی آیات الله حال ان آیه زجر است سرزنش است برای اینکه سرزنش است ها قوم راو انهم اینها در واقع قومی بودند که معتقد بودند اتبع النبی صلی اللہ علیه و سلم اگر از رسول الله پیروی رفی بکنند قل ارتفاعهم اون جایگاه بلندی اونها چی میشه؟ پایین میشه و نقصت احوالهم احوالشون خراب میشه و انهم یرتفعون اذا لم یکونو تبعا زمانی که تابع نواشان مقام و پست پیدا می‌کنند اگر تابع بشند غلام خادم فاعلم الله عز و جل خداوند در این آیه بما اعلام می‌فرماد که انهم لا یبلغون الارتفاع الذي املوه بالكذب این جایگاه بلندی که با دروغ اونها برای خودشون در نظر گرفتند و انتظارش را دارند به اون جایگاه هرگز نمی رسند مثلا در زمان رسول الله خیلی عالم بود از یهودی ها بقیه که پیروی نکردند اونها خار و زبون شدند جلا شدند در بدر شدند ذلیل شدند اما یکی از علمای بزرگ عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی او او تبعیت کرد او ایمان آورد او پذیرفت تسلیم شد تا به امروز به نیکی ازش یاد میکنین تا به امروز رزوان خدا را بر او میفرستیم پس اون چیزی که اونها انتظار داشتند نمیشه لذا الله میفرماید این فی صدورهم نیست در سینه های اونها الا کبرون مگر تصور بزرگی مگر اون کبری که اونها خیل اون را دارند ما هم به بالغی نیستن آنها برسند به اون کبرشان یعنی به اون جایگاه بلندشون نمی رسن. پس شما ای پیامبر ای مسلمان شما چی کار کن؟ فستعید بالله پس از شر کفار به خدا پناه ببر بعضی گفتند چون اینجا بحث بحث بر بود خداوند به پیغمبرش دستور داد چون این آیات آیات مکی هستن هنوز جهاد نازل نشده گاهی انسان عصبانی می شد لذا اگر عصبانیت آمد اگر وسوسه آمد فستعید به الله پناه ببرد اینه هو السمیع البصیل همانا پروردگار هر چیز را شنواست و هر احوال را بیناست لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس تا اینجا مبحث توحید بود ادامه دارد این مبحث توحید اما در کنار مبحث توحید خداوند ازا و جل بحث قیامت را میاورد گرچه این دلائلی که انجا ذکر شدند هم دلائل توحید هستند و هم دلائل قیامت هستند خداوند دوتا دلیل برای اثبات قیامت انجازک می کند اونایی که منطق خوندن بیادشون هست این دلیل دوتا یکی دلیل انی هست یکی دلیل لمی هست توضیح مختصر به این دوتا اصلاح بدم دلیل انی به اون دلیل گفتی میشه که شیع را با علت اصلیش اثبات نمی کنند با علائمش اثبات میکنند. یه چیزی را با چی اثبات می کنی؟ با علامتش، با علت اصلی اثبات نمی کنی مثلا اینجا خداوند قیامت را اثبات فرموده با خلق آسمانها و زمین مگر قیامت به این خاطر برپا میشه چون خداوند آسمان و زمین را خلق کرده نه خیر خلق آسمان و زمین علت قیامت نیست البته علامت هست چطور علامت هست خداوند اززوجل در قرآن کریم از زمین و آسمان استدلال میگیرد که زمین و آسمان را خداوند خلق کرد این قدر مخلوق بزرگی هستند اینها مخلوقات بزرگی هستند پس قدرت خدا اثبات شد وقتی که قدرت خدا اثبات شد میتونه آسمانی را خلق بکند پس انسان را دوباره به طریق اولا میتونه خلق بکنه شما میخونید تو صورت نازعات خلق شما سختر از خلق آسمان برای خدا که با یک کن هر دو خلق میشه هم انسان هم آسمان ولی از نظر ما آسمان خیلی مشکلی لذا وقتی که آسمانی را با این عظمت با این سقف بلند رفع سمکاها فسواها و اغتش لیلها و اخرج دوحاها شبی برایش درست کرد روزی برایش درست کرد خدا این نظام پیچی را وقتی که می تواند درست بکند پس انسان را به طریقی اولا بس ببینید پیدایش آسمان، پیدایش زمین دلیل قیامت نیست، اما میتونه علائمی برای چی باشد برای قیامت باشه. پس این دلیل انی هست که محتوای دلیل در واقع سبب اصلی نیست، اما علامت هست. الله میفرماید لخلق السماوات والارض البته آفرینش آسمان ها و زمین اکبر من خلق الناس از خلق مردم بزرگتر است یعنی بظاهر سنگیتر است سنگیتر است از نظر ما اما برای الله نه ولیکن اکثر الناس لا يعلمون اما اکثر مردم نمی دونند به این فکر نمی کنند که خداوند وقتی که آسمان و زمین را با این وسعت و با این عظمت پیدا کرده برای او پیدایش انسان کاری ندارد پس این شد دلیل اینی دلیل لمی ارز کردم اینه که شیع را اثبات میکنیم با علت اصلیش حال دومین من دلیل وما یستوی الامع والبصیر این دلیل لمی هست برای اثبات قیامت چطور دلیلی لیمی هست؟ این نیاز به توضیح دارد دقیق بفرماید خداوند می فرماید نابینا و بینا برابر نیستند وما یستوی الاعمى والبصیر و همچنین والذین آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتُ وَلَى الْمُسِی کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند و همچنین اون اونی که بد است مُسی یعنی المشرک تفسیر امباسی نوشته یکی مؤمن است یکی مشرک است اینا با هم برابر نیستن خب اینا برابر نیستن یا نیچه این چطور دلیل قیامت شد ببینید توضیحش را دقت بفرمایید خداوند بندگان خودش را در دنیا متفاوت آفریده پیدا کرده اما بندگان را راهای متفاوتی را اختیار کردن یکی راہ کفر را یکی راہ ایمان را یکی راہ شرک را یکی راہ توحید را یکی نیک هست یکی بد هست یکی ظالم هست یکی عادل هست یکی غاصب هست یکی مستحق هست یکی صالح هست یکی فاسد هست انسان همین طور هست یعنی یا نیسان میبینیم دیگا ہمین یکی ظالمه یکی مظلومه یکی عادله یکی فاسده مثلا خب اینا هر دو بمیرند و تمام بشه داستان آیا این عدالت است؟ نباید یه جای باشد که اینها اونجا مشخص بشه این خوب عمل کرده این بد عمل کرده نباید یه جای باشد که کسی که تمام زندگیش با ورع و با تقوا و با پرهیزگاری و با خدا ترسی گزارانده هم حق سجده را بجا آورده حق خدا را بجا آورده هم حق بندگان خدا را بجا آورده بهترین معامله را داشته بهترین اخلاق را داشته بهترین برخورد را داشته یکی دیگه برعکس بزرگترین فساد را داشته هر دو مردن بعد از شیست سال اینم 60 سال عمر کرد اونم 60 سال عمر کرد. هر دو بمیرند و هیچ حساب و کتابی نباشد آیا این عدالت هست؟ عدالت نیست نباید یک دادگاهی باشد یه میدانی باشد یه محلی باشد که مشخص بشه او خوب عمل کرده خوب دریافت بکند جزای خوب را دریافت کند این بد عمل کرده جزای بد را دریافت این به علت اصلی قیامته پس علت اصلی قیامت چیه اینه که انسان ها با هم برابر نیستن کور و بینا برابر نیست کور یعنی کافر بینا یعنی مسلمان مشرک و موحد برابر نیست پس چطور برابر نیستن وقتی که انطور که کفار معتقد قیامتی اگر نباشد اینا برابر انت. الان ببینی از یک کافری که قیامت را قبول ندارد از اون بپرس که آدم خوب و آدم بد برابر هستند اون میگه نه برابر نیستند خب چطور برابر نیستند از نظر تو که برابرند، چون چون خوب, خوب عمل میکنه این بد عمل میکند کجا اون پاداش خوبی را باید بگیرد کجا این پاداش و کیفر بدی را باید دریافت بکند باید چی باشد قیامت باشد باید روز جزا باشد روز حساب و کتاب پاسخ دادن باشد پس این دلیل لمی هست یعنی علت اصلی قیامت اینه لذا الله اللهمی فرماید وما یستوی الاعماء والبصیر برابر نیست نا بینا و بینا والذین آمنون و اون کسی که ایمان اون که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند ول المسی و نه اونی که بد هست تفسیر اباسی نوشته المسی یعنی مشرک چون در مقابل موامر مشرکه قلیلا ما تتذکرون اندکست آنچه که شما پند میگیرید یعنی شما متوجه نیستید شما حالی نیست چرا پند میگیرید لذا از این هر دو دلیل اولی اینیب بود دومی لیمی به چه نتیجه رسیدیم این ساعت لآتیت لا ریب فیها همان قیامت حتما می آید لام لام تاکید است قیامت حتما می آید لا ریب فیها هیچ شکی تو قیامت نیست ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون اما اکثر مردم ایمان ندارند اینجا منو به دلیل عدم تدبر در دلائل چون در دلائل تدبر نمی کنند ایمان نمی آورند. و الا اگر تدبر بکنه یک انسانی که تعصب را بذار کنار فکر بکنه که آخه این دنیا با این وسعت این همه انسان ها میلیاردها انسان برای چی آفریده شدند برای اینکه یکی بیاد خوب بکنه یکی بیاد بد بکنه هیچ نتیجه نگیرد نخیر باید نتیجه را بگیریم نتیجه را کجا میگیریم در قیامت میگیریم پس خود به خود به قیامت ایمان میاره وقتی که انسان به قیامت ایمان بیاورد حتما این انسان هدایت میشه چرا؟ چون حتما فکر میکنه که من در قیامت به خدا چی پاسخی بدم خدا از این میپرسی که راه درست را بردی؟ راه درست کدومه اون وقت انسان خود خود انابت تو وجودش بیاد دنبال راه درست میشه وقتی که کسی دنبال راه درست بشه راه درست را میابد خدا بهش عقل داده دلائل هم خدا بیان فرموده وقال ربكم ربکم ادعونی این اعاده مدعا هست بار دوم اگر یادتون باشه به ذهن شریف باشه عرض کردم سه بار مدعا در این سوره بیان شد ول فدع الله مخلصین له الدین مدعا چی بود توحید فقط خداره فرياد غير خداره فرياد خدا را فریاد بزنید غیر خدا را فریاد نزنید اینجا خداوند می و وقال ربکم ادعونی استجب لكم. رب شما فرموده فقط مرا بخانید من اجابت میکنم برای شما این الذین عن عبادتي همانا انهایی که استقبار می تکبر می از عبادت من سید خلون جهنم داخلین ان قریب اونها در جهنم داخل می شوند با زلت داخلین یعنی ذلیلین با زلت خاری به جهنم می روند ببینید اینجا اگر به این آیت تدبر بفرمایید نکته مهمی حاصلتون میشه ما در درس های گذشته هم در مقدمه و هم در آیات قرآن مجید ادعا کردیم گفتیم که دعا و عبادت یه چیز است وقتی که شما کسی را فریاد میزنید گویا او را عبادت میکنید خیلی از افراد استن این قبول ندارند می گویند برای ما هیچ اشکال ندارد یا فلان یا فلان یا فلان ادرکنی یا فلان انصرنی یا فلان خوز بیادی خیلی ها هستند میگن یا رسول الله خوز بیادی یا ارز کنم بقیه اولیاء خدا را یا انبیاء را فریاد میزنند میگویند می گویند که این عبادت نیست این واسطه گرفتن و وسیله گرفتن از او را فریاد زدند در حالی که ما میگیم دعا عبادت است. حدیث پیش کردیم. ادعا هو العباده، الدعا مخ العباده. خب حدیث را اگر کسی قبول ندارد، آیه را که قبول دارد؟ آیه چی گفته؟ و قال ربكم ادعوني استجب لكم. رب دستور داده که از من بخواهید من اجابت میکنم بعد فرمود کسانی که تکبر میکنه از چی از دعای من یا از عبادت من ان الذين يستكبرون عن دعائي باید باشه نه ولی بجای دعا چی فرمود عن عبادتی این بیانگر این هست که ادعا او هو العباده اونجا در جانب اثبات فرمود ادعوني در جانب نفی فرمود عن عبادتی پس دعا و عبادت یک چیز هستند اگر انسان بخواهد که ادامه را همون کلمات بگه باید باشه ان استكبرون عن, عن دعای اما خداون نفرمود ان استكبرون عن دعای فرمود ان الذين استكبرون عن عبادتی تا اینکه من و شما بفهمیم دعا و عبادت یک چیز است پس اونهایی که استکبار دارند از عبادت من و غیر من را صدا میزنند خلون جهنم داخلین اونها انقریب در جهنم با ذلت داخل میشند چرا غیر خدا را از غیر خدا کمک خواستند یعنی غیر خدا را عبادت کردند پس از این سریح در چی چیزی میتونه باشه کسی این را قبول نمی کند که مگر پر استعص باشد خب بس این اعاده مدعا شد برای بار دوم اما اینجا نکته دیگری را میخوام عرض بکنم خداوند فرمود و قال ربكم ادعونی استجب لكم شما از من بخواهید من اجابت میکنم خب شما این سوال را شاید مطرح کنید در ذهن شریف بی بسیاری دیگه مطرح کردن خیلی دعاها ها ما دعا میکنیم اجابت نمی شود خدای فلان را شفا بده میبینیم فوت میکند خدای فلان حاجت من را براورده بکن میبینیم که حاجت براورده نمیشه بعضی ها براورده میشه بعضی ها نمیشه چطور خداوند فرموده ادعونی استجب لکم ادعونی استجب لکم معنیش اینه که هر کسی خدا را بخواهد حتما اجابت میکند در حالی که بس اوقات میبینیم دعایمون اجابت نمیشه اینه دوتا جواب ارز میکنم اولا القرآن یفصر بعضه بعضا قرآن خودش خودش را تفسیر میکند الله عز وجل می فرماید در جای دیگر با توجج به اون آیه دیگر اینجا ما یک کلمه را مقدر میکنیم چی را مقدر میکنیم وقال قال ربكم ادعوني استجب لكم ان شئته استجب لكم ان شئتو. رب فرموده از من بخواهید من اجابت میکنم اگر خواستم خوب توجه بفرمایید خب ان تو این را از کجا آوردی از آیه دیگه الله تعالی می فرماید من کان یرید العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد هر کسی که در همین دنیا بخواهد به صورت نقد بخواهد یرید العاجله دنیا اسباب مادی عجلنا له فيها ما به صورت نقد پیش میدیم اما ما نشا اونچه که ما بخواهیم من نورید برای کسی که ما اراده بکنیم پس با توجب این آیه خداوند مطلقاً هر کسی بخواهد نمیده. خدا خداوند مشیط خودش را نگاه می کند. و در سور مبارکه انعامین در سوره بني اسرائیل بود در سوره مبارکه انعام خدا می فرماید و خدا را صدا بزنید و یکشف ما تدعون الیه انشاء اون که شما دعا میکنه خدا دور میکنه از شما اگر بخواهد اگر پس به این خاطر اونجا چون انشاء هست ما اینجا انشئتورتی میکنیم مقدر میکنیم حاصل این شد که لازم نیست هر کسی که دعا میکنه حتما دعایش پذیروفت بشه اما مؤمن شک نکند که دعایش قبول میشه دعایش پذیرفته میشه اما آثار دعا در دنیا ظاهر بشه لازم نیست بس چطور پذیرفته میشه آثار دعا ظاهر میشه ببینید علماء نوشتن در پرتوب روایت و احادیث که دعایی که تو مؤمن مومن میکنی شما ای موحید میکنی این دعا اجابتش بییکی از اس سورت است یک وقتی که دعا میکنی یه چیزی را از خدا میخایم و مطلوبت حاصل میشه. صورت اولی اینه که خدایا بیمارم را شفا بده خدا شفاش. خدایا فلان حاجت من را برآورده بکن خدا برآورده میکنه. خدایا فلان نعمت را به من بده خدا بهت میده. هر چی بخوای یک صورت اجابت دعا این هست. دومین صورت اجابت دعا شاید شرایط طوری هست، فیصله خداوند طوری هست که مطلوب حاصلت نمیشه اما به برکت این دعا یک مصیبت از تو دور میشه. اینم نوع دومه اجابت دعا هست. شما دعا کردی فلان چیز را خواستی اما چیز دیگه که برایت مشکلی که برایت مقدر بوده به برکت این دعا اون مشکل چی شده دف شده. لذا ناامید نباش، همیشه دعا کن. ثواب اجر دعا یعنی خیلی از دعاها هستند که انسان اینجا دعا میکند و نتیجه را در دنیا نمیگیرد اجرش برای انسان ذخیره میشه اجرش برای انسان ذخیره میشه در قیامت گاهی اینقدر برای بعضی از افراد اینقدر اجر و پاداش میرسه طنجوب میکنه من این همه این همه عمل که نکردم بهش گفته میشه اینها نتیجه اون دعاهایی هست که در دنیا از خدا خواستی اونجا مصلحت بود که به تو نرسه در عوض اونها خداوند برات عجر ذخیره کرد اونجا انسان تمنا میکنه کاش هیچ دعای اونجا قبول نمیشود همیش عوضشون را اینجا من میگرفتم پس دعا حتما اجابت میشه اما به یکی از این سه صورت الله می فرماید و قال ربكم ادعوني استجب لكم رب فرموده فقط مرا بخانید من اجابت میکنم ان الذين يستكبرون عن عبادتي کسانی که از عبادت یعنی از دعا کردن مرا استکبار میکنند ببینید اگر ما دعا نکنیم اینم نوعی کوتاهی هست گناه است در روایت داریم غالبا در مسند امام احمد هست من لم يدع الله عز وجل غاضب عليه هر کسی که از خدا نخواد خدا بر او ناراضی میشه یعنی باید مؤمن همیشه از خدا بخواهد ما انسان ها طوری هستیم که کسی از ما یه چیزی بخواد شاید بدیم اما بار دوم بار سوم ناراحت بشیم. پروردگار چنان زادی است هر چی بیشتر بخوای بیشتر راضی میشه، بیشتر خوش میشه. همین خاطر این ده حدیث رسول الله مللم يدعو الله عزّ و جل غاضب عليه. پس کسانی که استکبار میکنند از عبادت من یعنی از دعا کردن من البته صورت استکبار اینجا با توجه به موضوع و سیاق این سوره عرض کردم اینه که تکبر میکنند خدا استنکاف میکنند خدا را, می را فریاد نمیزنند غیر خدا را فریاد میزنند سید خلون جهنم اونا ان قریب در جهنم با ذلت داخل میشوند الله الذي جعل لكم الليل خبتا ما مدعای سوره را خاندیم دلائل نقلی هم برایش آمد بالقصود دلائل نقلی هم از انبیاء سابقین بصورت اجمال و هم از سیدنا موسیٰ علیه السلام و کتاب التورات اما حال دلائل عقلی را می ابتدا عرض کردم که دوتا دلیل عقلی تو این سوره هست الله تعالی دلیل عقلی به می فرماید. یعنی انسان نظری با تعمق و تدبر بی به کائنات الهی خداوند چه نظام منظمی را آفریده من جمله اون نظام یکی از اونها شب هست یکی از اونها روز هست ما اگر چشمه را ببندیم و در این شب و روزی که خدا پیدا فرموده ما فکر بکنیم واقعا چه منافعی هست چه فوایدی هست هزاران فایده برای لحظه تصور بکنید اگر این خورشید اصلا نبود همه شب همه تاریکی چنان تاریکی که حتی شبه را نمی دیدی اون وقت زندگی ممکن بود امکانش نبود. اگر اصلا شب نبود همه روز بود وقت هیچ کسی آرامش نداشت لذا الله تعالی چه نعمت های که این نعمت ها را ما شبان روز استفاده می‌کنی ولی بهشون فکر نمیکنیم الله بار بار یادآوری می‌کند که اینها شما فکر بکنیم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا في الله هست که قرارداد برای شما لکم این لام لام انتفاس یعنی برای نفع شما قرارداد برای نفع شما شب را لتسکنوا تا در آن سکونت کنید و نهار را مبصرا و روز را مبصرا مبصر یعنی وسیله بصیرت و بینائی تا وسیله روشنی که همه جا روشن است همه چیز آشکار است خوب میتونی کار بکنی تفریح بکنی کسب بکنی معاشت را حاصل بکنی ولی این چه فضل پروردگار هست؟ ان الله لذو فضل على الناس اما الله داري فضل اس بر مردم مصالحشون رو خوب در نظر دارد ولیکن اکثر الناس لا يشكرون اما اکثر مردم شاکر نیستن چقدر انسان ناسپاس چرا چون بجای اینکه نعمت های پروردگار را استفاده بکنند و خدا را تنها عبادت بر برعکس به جای شکر چی میکنند شرک میکنند به جای شکر شرک میکنند دیگران را شریک خدا قرار میده این اینها هستند اینا نمک نشناسن ذالکوم الله ربکم خالق كل شيء در ابتدای سوره بنده عرض کردم در این صورت دلایل اقلی میاد بعد از هر دلیل اقلی یک نتیجه و یک ثمره هم ذکر میشه این نتیجه دلیل است این ثمره دلیل اقلی است ای انسان ذالکم الله این ذاتی که روز را با این زیبایی شب را برای سکون آرامش شما با این نظم خاص به وجود آورده این الله هست الله، اون اللهی که رب بکم دهنده شما هست تربیت کرنده شما هست شما را از ابتدا تا انتها تدریجن به کمال رسانده خالق و کلشه اون ذاتی هست که آفریننده هر چیز است، پس به چه نتیجه می رسیم آیا این قدرت را کسی دیگه دارد؟ ندارد پس نتیجه لا اله الا هو هیچ معبودی لایق پرستش مگر او یعنی شما چرا پس دیگران را پرستش میکنید فانا توفكون به کدام سمت و سوی شما به انحراف کشیده میشوید توفكون افک میگویند برگردانده شدن به انحراف کشیده شدن ببینید کسانی به انحراف می روند منعش این تو فکون یعنی در رابطه با نعمت شب و روز و اینکه که خدا خالق همه چیز هست اینو که میدونید اما چرا به وقت دعا و سجده و عبادت به سوی دیگران برگردانده می شوید شب خدا را استفاده می کنی روز خدا را استفاده می کنی ولی سجده میکنی برای ود و سوا و یغوس و یهود برای لات و اززا لذا الله می فرماید چرا به وقت سجده و عبادت غیر خدا را عبادت میکنی کنی یعنی کیف تعبدون غیره من الاسلام اللتی لا يخلقون شیعن و هم يخلقون ابن کسید گفته فانا تو فکون ای به کدام سمت سو شما برگردانده می و نه تنها اینها برگردانده شدند منحرف شدند به انحراف کشیده شدند، کسانی که قبل از اینها بودند وقتی که آیات الهی را انکار کردند، اونها هم به انحراف کشیده شدند. دلیل گمراهی اهل شرک چیه؟ دلیل جمراهیشون انکار آیات خداست. هر کسی که آیات الهی را انکار می کند او به انحراف کشیده می شه او به سوی شرک برده می شه اللہ می فرمان کذالک یعفق الذین کانو بی آیات اللہ یجحدون همچنین برگرداندش می شوند به انحراف کشیده می شوند کسانی که کانو بی آیات نسبت به آیات خدا انکار می کردند اونا هم یعنی تخصیص قریشیه نیست تخصیص مشرکین مکی نیست هر کسانی که در گذشته هر کسانی که در گذشته هم آیات الهی را انکار می‌کردند دعوت انبیاء را منکر بودند همه انها به انحراف کشیده شدند معنیش اینه که کل من جهاد بی آیات الله تفسیر مدارک نوشته بسیار ارزشمند نوشته کل من جهاد بی آیات الله هر کسی که نسبت به آیات خدا منکر باشد و لم در درباره آیات خدا تأمل نکند و لم يتلو دنبال حق نباشد یعنی تعصب داشته باشد افک کما افکو او هم به انحراف کشیده میشه همان گونی که اینها به انحراف کشیده شدن اونم منحرف میشه اونم گمراه میشه بس ببینید تنها کسانی راه هدایت را میابند که یک منکر آیات خدا نباشند دو طالب حق باشند یعنی منیب باشند متعصب نباشند پس کذالک یعفق الَّذین الذين كانوا آیات الله یجحدو این دلیل اول عقلی بود و سمره و نتیجه را هم شما خاندید دلیل دووم عقلی رب خال الله الذي ان دلیل دووم حس اینم آفاقی اما تو این دلیل اق آفاقی افاقا عالم السفلی ذکر شده هم عالم علوی الله الذي جعل لكم الارض قرارا الله عزتی هست کی قرار داد برای شما زمین را قراری این یعنی محل قرار ما هست محل استقرار ما هست محل رہائش ما هست اینجا سکونت داریم اینجا زندگی میکنیم روی زمین شما تصور بکنید اگر زمین نبود ما چی کار می کردیم حتما زمین اگر نبود آب بود دیگه چون وکان عرشو علالما آیا میتونستیم روی آب زندگی کنیم لذا یعنی که زمین همین که استقرار دارد به این نعمت فکر کردید چه نعمت عظمایی هست تکان نمی خورد اگر تکان بخورد چه میشه برای ثانیه بعضی وقتا زمین تکان میخورد هزاران انسان تلف میشه هزاران سخت ما زیر و رو میشه بس انسان خوب استفاده میکن از نعمت خدا اما هیچ فکر نمی کند این ها را خداوان یاد آوری می فرماید اللہ اللذی جعل لكم الارض قرارا و السما بنا این عالم علوی است. آسمان را برا شما بنا بنا یعنی سقف خيمه. معمولا کسی که ازدواج می کند قدیم مردم این ساختمان نداشتن ها نداشتند تو روزدہ بودند وقتی که کسی ازدواج میکرد چهار تا خیمه مثلا اونجا بود پنج تا خیمه بود این نوع روز یک خیمه دیگری برایش بنا میشون میگفتم بنا لهو بیتن یعنی خیمه برایش نصب شد بس آسمان خیمه هستقفی هست وصورکم فأحسن صورکم و الله به شما صورت داد بسیار زیبا فرمو صورت شما را خداوند تعالی انسان را صورت بسیار زیبایی دارد ببینید مراد از صورت این که ما انسان ها با هم دیگه متفاوت هستیم یکی نمی دونم پوستش سفیده یکی سیاه هست یکی سرد پوسته یکی زرد پوسته یکی بینیش بزرگه یکی کوچکه یکی چشماش چنانه یکی معاش فلانه این مراد نیست که بگیم بعضی انسان ها زیبا هستن بعضی انسان ها زشتن نه همه انسان ها زیبا هستند من حیث المجموع اونی که خدا سیاه آفریده اون زیبایی خودش را تو همون میداند و اونی که خدا سفید آفریده اون زیباییش هر یک خوشحال است به شکلی که خدا داده اما مراد اینجا چیه خوب دقت بفرمایید نسبت به بقیه مخلوقات انسان را خدای عزوجل چنان زیبا آفریده که انسان از همه اعضا و جواره خودش خوب استفاده میکنه. کنه اولا انسان سر بلنده بقیه همه سر نگونند. بعضی ها به سر راه می روند بعضی از چهار دست و راه می روند خودشون را بلند کنند بعضی ها به شکم می خزند اما انسان نه و بعد انسان را خداونده عزواجل طوری آفریده که انسان غذاش را خوراکش را به وسیله دست از دست کار می استفاده میکنه تمیز می کند پاک می کند بهترین و خوشزائقه ترین غذا را می اما بقیه این کارها را نمی بکنه همه را ببینید چه پرندگان باشند چه حیوانات باشند نه از دست خودشون میتونه استفاده بکنن نه از عضو دیگه استفاده میکنند مستقیما دهان را میبرند خب این یک کمالی است که خدا به انسان عطا فرموده و بعضی هستند که اصلا انسان دست را به سر میگذارد دست را به پشت میگذارد دست را به جلو میبرد چپ و میبرد اما بقیه نمیتونن دستشون را تکام بدن از دستشون استفاده بکنن بعضی را خدا توری آفریده که پشتشون را حتی نمیتونن نگاه بکنن گردنشون کلن بسته لذا و بعض به انسان خدای تعالی زیبایی داده لباس داده بقیه از روزی که پیدا میشن تا روزی که میمیرند همیشه یک حالت هستند اما انسان این متنافه هست. انسان فرق میکنه روز بر روز زیباتر میشه هفته به هفته تزین میکنه. لذا اینا همه جزه زیبایی های انسان. و صبر کن فاکسنا سورکم بی این معنی هست تعالی به شما این دلیل انفوسی هست اون اول آفاقی بود این انفوسی هست به بسرما صورت داده فا احسن اسور و رزقکم من الطیبات از پاکی زها شما را رزق داد بقیه حیوانات همیشه ارز میکنم گوسفند پنج هزار سال پیش چی میخورد الاف میخورد هنوزم الاف میخورد شطور اگر چند هزار سال پیش خارش شطور میخورد هنوزم هم همونه میخورد پرنده همم چینین چرنده همم غذاش هیچ فرقی ولی انسان نه الله تعالی طیبات بهش داده پاکیزه داده روز بروز و رزقش بهتر میشه پاکیزه تر میشه متنوعه تر میشه رنگ به رنگ تر میشه خوشمزه تر میشه این نهمتی که خدا به انسان داده قابل مقایسه با هیچ چی نیست به هر یکی که شما دقت بفرمایید بی اندیشید بس نکات بهتری و جدیدتری گیرتون میاد و رزقكم من الطيبات ذالکم الله ربکم ان نتیجه دلیل طور که اون دلیل اول نتیجه داشت سماری داشت این هم دلیل ذالکم اللہ ربکم این اللہ هست این همین نعمت رب شما عطا فرموده اینسان ها که کے پرورش دہندی شما پس بچه نتیجه می رسیم اونجا. بین نتیجه رسیدیم که لا الہا اینجا می رسیم فتبارک الله رب العالمین برکات دهنده است الله، اون اللہی کی رب عالمیان یعنی برکات را فقط اومی دے کسی دیگه برکت دهنده نیست هو الحی هو الحی ببینید یک نکتی را در ابتدای این دلیل خدمت شما ارض میخواستم می بکنم از ذهن رفت اون اینه که مستحق عبادت اون کسی میتونه باشه که چند چیز داشته باشه یک احسانات گذشته در گذشته هم بر ما احسان داشته دو احسانات موجوده سه اختیار و موت و حیات چار کارساز و مشکل گوشان یعنی در گزشته هم ما احسان کرده باشه در حال حاضر هم ما احسان میکنه موت و حیات ما هم به دست او هست مشکلات و حل مشکلات ما هم به دست او هست این ذات بغیر از پروردگار کسی دیگه نمیتونه باشه بس اینجا خداوند اززوجل احسانات گذشته را ذکر فرمود و احسانات حال راه الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناءا إن إحسانات فعليها وصوركم فأحسن صوركم در قزشته ودر حال ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين إن دونوا إحسان شد حال مي خاليم اختيار موت وحياتهم بدست او حال البته بعدن مي هو الحی, هو الحی لا اله الا هو اون ذات ذاتی هست که زنده هست جاویدان هست اینجا حی را به معنی جاویدان می کنیم چونکه به معنی مطلقاً زنده تفسیرش درست نیست منو و شما هم زنده هستیم خیلی مخلوقات دیگه هم زنده هست فریشتگان هم زنده هستند اما زندگی خدا فرق میکنه هو الحي الذي لا يموت آیه ما نشما لا فرشتگان لا نه کل من علیها فان بس به این معنا هو الحي به معنای چی کردیم زنده جاودان هست لا اله الا هو پس بین نتایج رمی رسم نتیجه دوم نیز هیچ معبود لایق الوهیت و عبادت بجزء او فدعوا فدعوه مخلصین له الدين برای بار سوم عرض کنم که مدعا ذکر شد اعاده مدعا بار سه بس فقط او رب بخانید ای انسان ها مخلصین خالص قرار بدهید له الدین ای له الدعا دعا را فقط خالص برای او قرارد لغیر از او کسیرا شما پریاد نسانی غیر او کسیرا نخاید و نخانید الحمدللہ رب العالمين این سمره و نتایج تمام دلائل هست از این دلائل ثابت شد که تمام محامد و تعریفات و زیبائی ها ببینید من نکته اینجا ارز بکنم برای تمام قرآن هر جا که الحمدللہ کافی هست عموم مفسران و علماء لغت الفلام را الفلامی استغراقی میگیرن میگه تمام تعریفات بعد از سری قیل و میاد خب خیلی تعریفات هستند که لایق بشعنه لایق پروردگار نیستند مثلا کسی شما را تعریف میکنه ماشاءالله چقدر قامت خوبی داری چه چشمانی خوبی داری چه موهای خوبی داری خب اینها برای خدا لایقند خیلی تعریفات هستند که در دنیا تعریف به حساب میشد بعد میگویند که نه تعریفات فلان یا بعضی تعریفات هستند میگه این مجازی حقیقتاً به سوی پروردگار برمی گردد اما شیخ بزرگوار ما شیخ حسین علی رحمه الله می فرماید الحمدلله الافلام استغراقی یعنی تمام تعریفات مراد نیست الافلام الافلام عهد خارجی هست تعریفات خاص مراد هستند ایشون چون می‌فرماید الحمدلله بزرگترین ادعای توحید است هر حمد مراد نیست اون تعریفاتی که اختصاص به پروردگار دارند خیلی از تعریفات هستند که مال خداوند هم هستند مال مخلوقات هم هستند ولی خب در نسبت به خداوند حقیقی نسبت به مخلوقات مجازی ما خداوند عزوجل جواد هست سخی هست خیلی بازمندگانش هم جود و سخا دارند ندارند؟ باز اینجا ما میگیم اون حقیقی این مجازی این توجیه را می کریم یا مثلا خداوند رعوف رحیم هست نسبت به رسول اللهم در قرآن آمده بالمؤمنین رعوف رحیم، باز میگه اون حقیقی این مجازی شیخ رحمه الله می‌فرماید، مراد از اینجا تعریفاتی هست که اون تعریفات مختص پروردگار هستند. برای غیر پروردگار اون تعریفات صدق نمی‌کند. به نمی صورت حقیقی صدق می‌کند و به صورت غیر حقیقی. مراد از این تعریف اون تعریفاتی هست که الوهیت را ثابت می‌کند. بیشتر دلیل، به خاطر اینکه لله لام لام اختصاصی هست یا نیست، پس باید تعریفات اینجا مد نظر باشد، کون اون تعریفات خاص پروردگار باشد. مثل چی؟ مثل خالقیت، رازقیت، نافع و ضار، عالم الغیب، مشکل کش، حاجت روا. حاضر و ناظر این صفاتی که اختصاص به پروردگار دارن نه در ملائک پیدا میشدن نه در انبیاء نه در اولیاء و اصفیاء اون تعریفات خاص مرادن ببینید در گذشته ما خاندیم از های پروردگار از این قدرتها ثابت شد که الحمدلله پس صفات الوهیت و حمد و محامدی که از اون مهامد الان این تعریفات در قرآن آمده برای خدا اثبات شده برای از غیر خدا چیه نفی شده مثلا حتی از رسول الله قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيبه لستكثرت من الغيب یا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو این تعریفاتی هستن که مال خدا از غیر خدا حتی از انبیا نفی شدند پس این تعریفات مد نظر است هر تعریف و مراد نیست به دلیل لله هی. لام لام اختصاص پس تمام تعریفاتی که مختص پروردگار هستند تعریفاتی که الوهیت را ثابت می کند فقط و فقط برای الله اون اللهی که رب العالمین رب جهانیان است خب تا اینجا بخش اول سوره تمام شد در این بخش اول سوره اگر فراموش نفر مودید سبار مدعا شد اول فدعو الله مخلصین له الدین دوم دو مقال ربكم ادعونی استجب لكم سوم آخر فدعوه مخلصین له الدین و چندین دلائل برایش خاندید دلیل واحد خاندید یک دلیل واحد یک دلیل نقلی خاندید دوتا دلیل عقلی خاندید قل انی تو از اینجا تا آخر سوره این بخش دوم سوره هست همین مزامین تکرار می شود این اولین دلیل دلیل وحی است همون طور که در ابتدا تنزیل الكتاب دلیل وحی خاندید اینم دلیل وحی است قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله ای پیامبر اعلام بفرما من باز داشته شدم نهیتو ای من جانب الله من باز داشته شدم از جانب پروردگار نهی شدم اینکه پرستش بکنم آنهایی را که تدعون من دون الله شما می خانید آنها را بغیر از الله اینهایی که شما می من خداوند من کرده که اونها را صدا بزنم اونها را فریاد قدمت شما عرض کردم مشرکین مشرکین مکه در مقدمه ما خاندیم فقط لا توزار صدا نمی زدند مشرکین مکه صدها معبود داشتند. در همین معبودانی که اونها داشتند، اولیاء و شهدا هم بودن مثل حبل که فرزند شهید حضرت آدم حابیل است در همین معبودانشان ابراهیم و اسماعیل هم بود که خواندیم، وقتی که مکه شد بطهای اونها را که مردم درست کرده بودن از جوف خانه کعبه بیرون کردند. در همین معبودان اونها فرشتگان هم بودن جنات هم بودن ارواح غیبی هم بودن همه صورت های همه کسانی که به نوع قائل به تقدس اونها بودن اونها را عبادت بیکردن پیغمبر دستور داده شده که من شما اعلام بکن من من شدم از این که عبادت بکنم اونهای را که شما می خانید بغیر از الله پس ببینید تدعون و تعبدون یک چیز است بجای اول عبادت میارد بعد تدعون ای انی نهیتو ان اعبداللذین تعبدون من دون الله اما اعبداللذین چون همین دعا عبادتی هست عبادت کن من های که شما فایاد می غیر از خدا لما جا انی البینات من ربی وقتی که بینات و دلائل از طرفه رب وان یعنی من دلیل دارم مدرک دارم بدون مدرک صحبت نمی کنم پس شما وقتی که فریاد نمی زنید صدا نمی زنید حاجت نمی خایید چیکار میکنید و تو ان اسلما لرب العالمین من امر شدم اینکه تسلیم بشم برای رب العالمین اختصاص هست تسلیم من هر کار را برای رب العالمین قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين همین تسلیم همینه همه عبادت های مالی جانی زبانی برای رب العالمین هو الذي خلقكم ان اعاده الدليل توحيد هست دلیل توحید عقلی هم خدمت شما عرض کردم که کسی میتواند معبود من قرار بگیرد که در گذشته هم بر من احسان داشته باشد در حال هم بر من احسان داشته باشد احسانات حال را الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بنا هو الذي خلقكم ان احسانات سابقه هست هو الذي خلقكم من تراب الله آن هست که شما را آفرید از خاک آفرید ثم من نطفه سپس از نطفه ببینید بعضی میگویند خاک ماده بعید است ثم من نطفت نطفه ماده قریب است این توجیه هم درست است توجیه دیگر این که این نطفه هم اول خاک بوده هم درست است چرا نطفه از چی درست میشه از غذای که انسان حاصل می کند غذا از چی درست میشه از خاک درست میشه. همه مأکولات ما همه سبزیجات و همه از زراعت ها از خاک هستی استند بس باز هم به خاک می رسد اما مرحله سوم ثم من علاقت سپس از لخته خون ثم من يخرجكم طفلا بعد از این که اون لخته خون ببادن در تفصیلش در آیت دیگه است مضغه مخلقه و غیر مخلقه تکه گوشت میشه بعد از اون که اون تکه گوشت تمام میشه شما را به عنوان طفل از شکم مادر بیرون میکنند اینجا فعل مقدره ای ثم ای ربیكم تدریجا شما را تربیت میکنن نشف و نما میده تاکه شما برسید به سن قوت. یعنی جوان بشید قوی بشید بعد از جوان شدن و قوی شدن ثم لتکونو شیوخن ای ثم یبقی کن بعضی از شما را می گزارد زنده می کند حیات میده، ادامه حیات تاکی لتکونو شیوخن تا پیر بشید این مراحل هست اما قبل از این مراحل بعضی ها جهان را بدرود میگن و منکن من یتوفا من قبل بعضی از شما، انهایی هستن که جانش گرفته میشه، اتفاقی اخو شی وافیان، جان گرفتن چیزی را به صورت کمال گرفتن، جانش گرفته میشه قبل از این ولی تبلوغ اجلم مسمى این همه مراحل هست تا که شما برسید به مدت معین مثلا مدت معین یک آغازچهل ساله، یکی دیگه پنجاه ساله، یکی دیگه صد و بیست ساله. یکی دیگر سی ساله هر یکی به هم مدتی که بالشتان شده به اون برسد ولعلاکم تعقلون این همه مراحل تا اینکه شما دریابید دلایل توحید را تعقلون دلایل توحید جلالین گفته یعنی خداوند احوال مختلفی بر شما آورده و اینها را بیان فرموده تا که شما درک کنید متوجه بیسید پس ببینید احسانات سابقه هم خواندیم احسانات موجوده هم خواندیم حال میخانه موت و حیات هم بدسته پروردگار هست هو الذی یحیی و یمیت الله آن هست که زنده می کند و میمیراند موت و حیات هم بدست او هست بدست غیر پروردگار نیست فاذا قضى امرا به حدی به صورتی که هر امری را فیصله بفرماید امر حیات کسی را احیاء کسی را یا اماتت کسی را موت کسی را یا بیماری کسی را یا صحت و سلامت کسی را یا توانگر شدن کسی را یا ورشکستگی کسیر، را هرچی اراده بفرماید فانما یقول لَهُ کن، فیکون با کلمه کن گرچه این کلمه لازم نیست تلفظ بشه اراده الله اما اون اراده برای ما تعبیر میشه با کلمه کن وقتی که اراده بفرماید اراده کن بفرماید فیکون خود به خود به وجود می آید و می شود خب پس ببینید در بخش دوم دو اولین دلیل عقلی را که بر اثبات توحید هست ما خاندیم اما این دلایل که خانده می شوند و این دلایل که بیان می شود باید کسانی که مد در مقابل هستند کسانی که مخاطبین قرآن هستند در مقابل این دلایل تدبر بکنند بیندیشند تسلیم بشند اما متاسفانه گروه هستند که این گروه همیشه بوده در گذشته هم بوده فیلم هم هستند گروه که مجادلین به عنوان مجادلی یاد می کسانی که جدال بالباطل می کنند کسانی که آیات حق را توجیح می کنند تعویل می کنند یا انکار می کنند تا اینکه بر شرک و خرافات خودشون ادامه بدهند آیات یعنی اگر کسی واقعا آینه که تعصب را کنار بگذارد از این واضحتر و روشنتر. اما بسیاری هستند که واقعا جدال بلد هی توجی میارن نمیتونن برای این آیات جواب میدن چیزهایی دیگه میارن شبهاتی که انسان خندش میگیره از شبهات و سوالاتی بعضی که مطرح میکنه لذا الله تعالی ونهار می میفرم هر که باشند هر جا باشند در هر لباس و هر جایگاهی جا باشند گاهی همین آیات توحید که ذکر میشه بیان میشه ما خارج از قرآن و خارج از حدود قرآن نمیریم بعضی ها متاسفانه همین ها بد نمیتاوند همین را رو نمی کنند و در مقابل این آیات افسانه هایی همونطور که مشرکین انجام می دادد در صدر افسانه داستان یا مثلا یه چیزی خارق العاده یه معجزه که معجزه انشاءالله بحثش همین امروز شاید بیاید معجزه از معجزه کسی نمی استدلال بگیرد که پیغمبر مشکل کشه است معجزه در دست پیغمبر نیست موجزه به دست پیغمبر ظاهر میشه اختیارش و کلیدش به دست الله است چه بس اپیغمبران موجزات خودشون را دیدن پا به فرار گذاشتند در دستشون نبود یا موسیٰ لا تخف اینکا من الامینین چرا میترسی موجزه فقط به دست پیغمبر ظاهر میشه خود پیغمبر هیچ اختیار تو موجزه ندارد لذا بعضی ها هی تا ولات اسرائیل می آورند و سعی می کنند که این آیات را محمل آیات را به سمت سوی دیگه ببرند تا اینکه هر خرافاتی دارند، هر شرکی دارند، هر اشکالاتی دارند تو اقایدشون تو افکارشون، اونها را توجیه کنند. لذا این از نظر قرآن هست جدال بالباطل. خداوند مجادلین را تذکر می فرماید قبلا هم گفتیم جدال بالباطل یکی از درجات زلالت است که به سبب جدال بالباطل کسانی که با اهل حق جدال می کنند به وسیله دلائل باطل اینها هیچ وقت هدایت نمی شود بلکه مهر جباریت بر قلبشان می خورد الله می فرماید الم ترى الى الذين يجادلون في ايات الله اي دیدی انهایی را که یجادلون فی آیات الله بناحق در آیات الله جدال میکنند بناحق جدال میکنند که انا یسرفون به کدام سمت و سو برگردانده می شوند صرف می شوند. روخشون برگردانده میشه خداوند عز و معرفی میکنند مجادلین کی هستند خوب دقت بفرمایید الذين كذبوا بالكتاب کسانی که کتاب را تکذیب میکنند قرآن را تکذیب میکنند و بما ارسلنا به رسلنا و اون چه اون مضمونی اون موضوعی که ارسلنا به رسولنا ما رسول من ربا اون موضوع فرستادیم اون موضوع را تقزیم می اون موضوعی که رسول فرستاده شدن چیه همین آیه ربی خاند اون موضوع مشخص میشه. و ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فعبدون ما ارسلنا به رسولنا چیه است توحید فی فل العبادت هست یا نیست خداوند رسول را فرستاد تا به مردم بفهمانند فقط یک خدا را عبادت کنند غیر خدا دیگران را عبادت نکنند پس کسانی که کتاب خدا را تکذیب می کنند و بما ارسلنا یعنی اون توحیدی که ارسلنا به رسولنا رسولمون را با اون توحید فرستادیم القران یفسر بعضه بعضا ما ارسلنا به رسولنا را از این آیه که در سوره انبیاء هست مشخص می و وما ارسلنا من قبل من رسول الا نوحیل. لذا این انسان ها را خداوند برایشون وعید بیان می فرماید می‌کنه شون چه می فرماید فسوف یعلمون انها ان قریب می‌دونند خدا تهدیدشون می‌کنه. كيف يدونون خدايا إذن الأغلال في أعناقهم والسلاسل زماني كي توقها در گردن شانخان بود والسلاسل وزنجيرها إنما اس قبيري أن لفتها تبنن ومان باردن إذن والسلاسل في أرجلهم گردن شون توق وزنجيرها كجا؟ دستوپا يصحبون في الحميم يصحبون انها كش دادمي شوند في الحميم در اون آب جوش و آب داغ یعنی تو جهنم ببینید اینها چرا زنجیر و زولانه میشوند مگر قرار از بکنن، فرار بکنند کجا فرار میکنند هر کس میدوند که اونجا جای فرار نیست قدرت فرار ندارن چرا پس زنجیرشو میکنند به خاطر ذلت و خفتشون به خاطر که خداوند میخواد اونها رو رسوا بکند زلیل بکند دست پایشون بسته میشه پس این به منظور ذلت هست ثم فی ناریوس جرون سپس در آتش جهنم سوزانده میشوند اونجا سوزانده میشوند بعدن خداوند از اونها میپرسد ببینید سیاق و سباق را ببینید که همه این عذاب ها برای چی هست برای اینکه این افراد بجای اینکه فقط خدا را عبادت کنند غیر خدا را عبادت کردند بجای اینکه فقط از خدا کمک بطلبن از غیر خدا کمک خواستند ثم, ثم قیل لهم سپس گفته میشه به آنان اینما کنتم تشركون من دون الله کجا هستن انهایی که شما شریک قرار میدادید بجز الله یعنی بجز اللہ شما اونها را شریک خدا قرار دادید اینها چ... کجا هستند چرا نصرتی نصرتتون نمیکنند؟ چرا بیاریتون نمیایند مشرکین چه جواب میده؟ قالوا ضلوا عنا پروردگار اونها ناپدید شدن از ما ما تو دنیا فکر میکردم در هر مشکل در هر مصیبت اینها مرا یاری میکنند ما اونا فریاد می زدیم ما از اونها استمداد می اختلا اما ضلو و گم شدند ناپدید شدند بل لم نکن ندعو من قبل شیئا بلکه ما قبل از این ما هیچ چیزی رسیدان زدیم یعنی چی؟ آیا ابتدان اقرار است بعد انکار؟ بازی همین توجیر را کرده آیا را دو تا تفسیر میکنم آیا را بفهمید بعضی میگویند اینقدر اینها حیران و سرگردان که ضد و نقیز حرف میزنن. ببینید یک می میبرن پیش قاضی وقتی که حال بشه دستپاته بشه در همون یک بازجویش زد و نقیز حرف میزنه اول اقرار میکنه بعدا انکار میکنه. بعضی همینو گفتند که اینها اول اقرار میکنن کنن ضلوا ضلو عنا یعنی ضلوا عن نصرتنا از امداد ما اونها ناپدید شدن گم شدن نمی دونیم کجا رفتن بعدا می بینند که ما اقرار کردیم به نوعی به شرک ما اینجا بالاخره قبول کردیم که ما غیر خدا را صدا زدیم بعدا فورا چی کار میکنند اصلاح میکنند میگن نه، بل لم نکن من قبل شیعه ما قبل زین هیچ چیز را صدا نزدیم نه ما کسی از کسی کمک نخواستیم ما فقط از خدا کمک خواستیم فقط خدا را فریاد زدیم پس این تفسیر اول است اللہ ما آلوسین میشته انه تعالی یحیرهم فی في ایم خداوند مشرکان را در روز قیامت در امرشون حیران و سرگردان می‌فرماید حتا یفزعون للکذب حتی که مجبور میشوند دروغ بگویند ما علمهم لا ينفعهم در حالی که می‌دونن که دروغ فایده برایشون نداره در همین دنیا خیلی مجرمین هستن که دوربین ثبتشون کرده جرمشون را دوربین فیلمبرداری کرده همه چیز مشخصه ولی باوجود اون اونجا چ میره انکار میکنه در حالی که میدونه که همه چیز مشخصه پس بعضی این تفسیر را کردند این نه در حالی که میدونن دروغ در مظری الله اعده ای نداره ولی چنان پریشانن که اولا اقرار میکنن بعدا انکار میکن این یک تفسییر تفسیر دوم اینه که نه این آیه است. اول و آخرش به هم زد و نقیس نیست بلکه تفسیر آیه اینه که اونها اول اقرار میکنند دوم هم اقرار میکنند چطور اول میگن قالو ضلوا عنا پروردگارا این معبودان از امداد ما اونایی که ما صدا میزدیم اینها از کمک ما ناپدید شدن گم شدند بل لم نکن ندعو من قبل شیا بلکه ما در دنیا چیز ارزشی را صدا نزدیم، ارزشمند معتد به چیزی که درد ما بخورت ما چیزهای را صدا زدیم، کسانی را فریاد زدیم که بی ارزش بود صدا زدن آنها. بی من اینم بقراره. یعنی لم نکن ندعو من قبل شیا، هیچیا معتد به. شئی معتد به شئی که ارزش صدا زدن را داشته باشد نزدی متاسفانه به همین خاطر الان اونها مارا رها کردند اونها نیستند که مارا کمک کنند. چنانچه اللهم مذهری همین نوشته نوشته بل تبین لن اليوم این اول آلوسی نوشته آلوسی هر دو تفسیر را ورده بل تبین لن اليوم بار برای ما امروز آشکار شد که اینا لم نكن نعبد في الدنيا شیئا يعتد به ما در دنیا چیزی که ارزش صدا زدن و ارزش عبادت کردن را داشته باشد نزدیم تفسیر مزلی نوشته ای لم ندعو من قبل شیئا ينفعنا او يدفع عنا المكروه ما در دنیا چنان ذاتی را چنان هستی را که برای ما نفی داشته باشد و از ما مشکلی را دور کند چنینی را صدا نزدیم یعنی yani خدا را صدا نزدیم ما غیر خدا را صدا زدیم لذا به این خاطر اینها گم شدن ناپدید شده به درد ما نمی‌خورند کذلک یضل الله الكافرین گونه خداوند گمراه می‌فرمد کافرین را این گمراهی بعضی گفتن کذالک این کاف تعلیلی است ای این گمراهی بدالی لی چی از بدالی جدال بالباطل با حق مبارزه کردن گمراهی را در پیدارد. ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغير الحق و بما کنتم تمرحون انسارگردانی به سبب چیه؟ به سبب این از که شما بودید در زمین بنا حق تکبر میکردید تفرحون فرح gameState معنای لغویش خوشحالی هست اما حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما میفرمایند کل فرح فی القران بمعنى البطر هر فرحی در قرآن به معنای غرور و تکبر است فرح به معنی چی غرور تکبر اما این دو تا هستند یکی فرح یکی مرح فرح اون غرور و تکبری را میگویند که در دل باشد آشکار نیست تو دلش انسان خیلی خودش را کسی میبندارد کسی میداند و مراح اون غرور و تکبری را میگویند که انسان با اعزا و جواره نشان میده با دستپا نشان میده با چشمان خودش نشان میده با برخودش نشان میده با راه رفتن نشان میده وقتی که راه میره سینه را چنان جلو میگیرد گردن را چنان بالا میگیرد و انسان ها را چنان حقیر نگاه میکند که گوی کدوم تیسمارخان است لذا این را میگن چی؟ مرح پس میفرماید که ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق این سبب این است که شما در دل تکبر می کردید بناحق و بما کنتم تمرحون و به سبب اینکه شما با اعضا و جواره همون چی می کردید یعنی غرور را نشان می دادید اما بعضی گفتند که مرح به معنای انفاق در محرمات و سرور بالمعاصی مثلا کسی خرج می کند و مراسم شرکی می گیرد مراسم گناه مراسم معصیت مراسم نمیدونم دونم دوهل و و موسیقی و رقص و فلان این مراه است سرمایهی و نعمتی که خدا بهش داده با این معصیت می کند این را بعضی گفتم مراه است که تفاوت اندکی دارد لذا الله می فرماید چون شما در زمین هم ظاهرا و باطنن تکبر می کردید خدا را هم عبادت نکردید غیر خدا را عبادت کردید و هم تکبر داشتید لذا الان پاداش شما چیه؟ ادخلو ابواب جهنم خالدین فیها اقیل لهم بی آنان گفت میشه داخل شوید از درهای جهنم خالدین فیها همیشه در آن جهنم مندگار باشید فبئس والمتکبرین بسیار بدست است جایگاه متکبران این تکبر و آثار تکبر دلیل تکبری که اینها را به اینجا کشان دو رساند فاصبر ان وعد الله حق برای بار دوم عرض کردم دوبار تو این صورت تسلی برای رسول اللہ است یه بار قبلا خواندیم این بار دوم است الله می فرمای فست به ای پیامبری من ای حبیب من تو شکیبا باش تو صبر کن تحمل داشته باش ان وعد الله حق کدوم وعده همین که امروز اول درس خواندیم انا لن نصر رسولنا والذین آمنوا في الحیاۃ الدنیا و یوم یقوم الشد این وعده الهی ای حق است اونجا هم عرض کردم گاهی خداوند عزوجل پیامبران خودش را در حیاتشون نصرت میکند گاهی بعد از وفاتشون نصرت میکنه یعنی پیامبر میرود پشت سر نهضتش را خدا زنده میکند و اون خطش را خط مشیش را الله تعالی در همه خانها میبرد گشت رسول الله صلی الله علیه وسلم اسلام در حیاتشون نصرت شدند در زمان رسول الله مکه فتح شد طائف فتح شد و انفط شد تمام دشمنان خار و زبون شدند لذا الله میفرمايت فاصبر ان وعد الله حق سابركن همانا وعده الله حقاً وعده النصرات فإما نرينك بعض الذين نعدهم فإما اگر ما بتو نشان بدهيم الدنيا الدنياوية يعني حتماً وعده مياه اما يادر در حيات شما يا بعد زوفات شما فإما نرينك اگر ما نشان بدهيم بشما بعض الذين هم بعضی از آنچه که ما وعده کردیم با اونها وعده یک پروردگار معاخزشون بود چون در بدر الله هم اونها را قتل کرد هم اسیر کرد او نکه یا شما را بگیریم جان شما را بگیریم فإلینا یعنی اگر در دنیا نباشد در آخرت مؤاخذهشون می‌کنه به سوی ما برگردانده میشوند فقط به سوی ما برگردانده میشوند لذا نیازی نیست که شما از کنم که عجله داشته باشی شما صبور باش شما تحمل بکن خدای عزوجل همیشان را به جزای اعمالشان میرساند و لقد ارسلنا رسلا من قبلك اینجا خداوند یک دلیل نقلی اجمالی زک میفرماید یعنی ای پیامبری من خلاصه دلیل اینه که قبل از شما رسول هم بودند با اون رسول رسول هم همین برخوردها شد بسیاری از دشمنان رسول را ما در حیاتشون معاخذ کردیم بسیاری بعد از اینکه رسول رفتند ما معاخذ کردیم اما این رسول فقط این رسول نیستن که در قرآن تعریفشون و ذکرشون آمده من هم من قصص نعليک و من هم من لم نقصص عليك. بعضی هستن که ما تعریفشون را برای شما کردیم بعضی ها تعریفشون و قصهشون بیان نکردیم در سوره نساء هم داری منهم من قصص عليك من قبل و من من لم نقصص ببینید بیشتر در قرآن مجید داستان اون انبیاءی ذکر شده که عرب ها کمو بیشی با اونها عاشنایی داشتن یا بنی اسرائیل اون انبیاءی که اطراف حجاز بودن در ممالک عرب بودن در ممالک یمن بودن یا در مصر بودن یا در شام بودن یا در عراق بودن مثلا سیدنا ابراهیم در عراق بود حضرت اسحاق و فرزندان اسحاق یعقوب و غیر و همه اینها در شام بودند موسی و حارون در مصر بودن بعضی از انبیاء در یمن بودن مثل مثلا ذکر سبا آمد ذکر سیدنا سلیمان آمد همین انبیاءی که اطراف بلاد عرب بودند خداوند عزواجل اینها را برای پیغمبر تعریف کرده خیلی از انبیاء هستند که الله بهتر میدانه اونها در چه زمانی بودند در چه بلادی بودند آخر این زمین تاریخش خیلی است خیلی قدیمی است، و این زمین هم خیلی وسیع است. فقط انسان ها در همین مناطقی که چار پنج منطقی که از کردم عراق و شام و اردن اینها فقط نبودند. آفریقایی هست، اروپایی هست، آمریکایی هست، چینی هست، هندوستانی هست که شبه قاره تو این بلاد هزاران و میلیارد ها انسان زنده بودن، زندگی کردند و رفتند. خدا میدونه کجا کجا خداوند پیغمبر فرستاده. قطعاً پیغمبران تو اینها بوده ولی ذکرشون تو قرآن نیست. لذا یه وقتی ما فکر نکنیم فقط انبیا در همین مناطق بودن در بلاد دور دیگه نبودند نه در همه بلاد انبیا بودند. عددشون را، تعدادشون را، مناطقشون را الله عز وجل بهتر می‌داند. لذا الله می فرماید ولقد ارسلنا رسلا من قبلك قبل الشماء من هم انا ما فرستاديم رسلي قبلت شما منهم من قصصنا عليك بعض ازونها ما تعريف کردیم بعد شما بنویسی اجمالا يا تفصيلا بعضيها انبيا فقط اسمش انت قران عمده حتى مفسران نمیدونند بصورت احتمالي یا عذر روایت بنی اسرائیل گرفتن که این پیغمبر کجا بوده بعضی پیغمبران فقط اسمشون آمده بعضی میگن قبل از نوح بودند بعض میگن نه بعد از نوح بودن مثلا ادریس علیه السلام ایلیاس علیه السلام بعضی میگن جز پیغمبران بنی اسرائیل بوده بعضی میگن نه بنی اسرائیل نبوده زلکفل هر یکی یک توجیحی درباره زلکفل داره لذا یاسع حضرت یاسع فقط اسمش آمده یک جامده جا یا دو جامده. جا لذا بازی را خداون فقط نام برده اما بعضی مثل موسی علیه السلام به تفصیل آمده کجا بود به کجا رفت هجرت کرد چی کرد لذا منهم من قصصنا علیکم و منهم ما من لم نقصص علیکم اما یک چ... یه امر مشترک در میان همه انبیا این هست که وما کان للرسول ان یاتی بآیه الا اذن الله برای هیچ رسولی نیست اینکه که آیه بیاورد آیه تکوینی مراد است یا تشریعی مگر به ازن الله ببینید اگر به این آیه دقت بفرماید بسیاری از مسائل اعتقادی منحل میشه همین الان یک بحثی را مطرح کردم که بسیاری از موجزات انبیا برداشت سو بی کنند خیلی از اهل خرافات بریلویه ذکر می کنند موجزاتی را مثلا موجزاتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم با ایما و اشارشون درخت چی کرد؟ از جایش حرکت کرد معلوم میشه رسول الله مالک اشجار و احجار بودند یا با اشاره رسول الله شک قمر شد. این در اختیار پیغمبر نبود، در اختیار الله بود. معلوم میشه که رسول الله صلی الله علیه وسلم مالک شمس و قمر بود. در حالی که مالک شمس و قمر الله است. شمس و قمر شما داهاجا میخانید. الله فرماید فقط منم هواللذی حسرت، هواللذی سخر شمس و القمر مسخر کننده و متصرف شمس و قمر فقط الله است اگر یه معجزه ای هست معجزه به دست پیغمبر ظاهر میشه اختیار معجزه به دست خدا هست مثلا حضرت ایسا یکی از معجزاتش چی بود رو زندگی میکرد خود ایسا میگه و احی الموت به اذن الله مرده را زنده میکنم اما به اذن الله اگر خدا اجازه نده نمیشه منش اینه اینجا الان شما خندید. هو الَّذِ يُحِي و یومیت، اون ذاتی که زنده میکنه و میمیراند فقط خداست نیست منش اینه لذا در این جمعه میخانیم که معجزه به دست پیغمبر نیست معجزه به دست الله است خیلی از انبیا بودند مردم به اونها گفتند شما معجزه نشان بدهید اون انبیا نتونستن معجزه نشم چون خداوند فرمود که اگر معجزه میخواهند که من بیاد من به دست شما ظاهر بکنم بعد از معجزه ایمان نیاورند برایشون عذاب میاد مثل قوم مثاله شتر را ایمان نیاوردن عذاب آمد خیلی چیزها از رسول الله خواستند شما در سوره فرقان هم میخانید در سوره بنی اسرائیل هم میخانید آیا اینها عملی شدند پیغمبر تونس نشون بده نقیر الله تعالی اجازه ندادند او یکونو لکا بیتون من زخرف او ترقا في السما ولن نؤمن لرقی او تفجر لنا الانعار الى آخری مختلف معجزات مختلفی خواستند خداوند می و ما کان لرسول برای هیچ رسولی نیست یعنی این اختیار را ندارد ان یعطیه بی آیت این آیه ای را بیاورد یعنی محجزه ای را آیه تکوینی محجزه میشه الا بی الله مگر بی الله خدا اجازه بده میشه پس کلید به دست که به دست خداست بعضی ها می میگویند که ببینید پیراهن یوسف شفا داد پیراهن یوسف شفا نداد الله شفا داد اما خداوند عز و جل این معجزه را به دست یوسف داد اونجا که در چاه بود و یعقوب زار زار گریه میکرد کرد و غمش تازه بود اونجا خدا نخواست اگر به دست یوسف بود از همین جا می از همین جا انجام میداد. بعدن یوسف عزیز مصر شد بعد از اینکه که از زندان آمد خب خبر داشت که پدرش چه حال زالی داره هنوز اجازه نداره یوسف اعلام بکنه حتی به پدر که من انجام بیا برادران میرند و میایند. میگن میگم ما پدر پیری داریم که چشمانش را از دست داده و بیضت عیناه چشمانش سفید شده از گریه کرده یوسف دلش پر از غم است اما هنوز اجازه نداره که اعلام بکنه بازم خدا دستور میده برازار دیگر را هم نگه دار پس یوسف اختیاری نداره هر کاری میشه با اجازه پروردگاره تا اینکه خداوند وقتی که میخواهد این داستان به پایان برسد این معجزه را خدا نشان میده پس وقتی که ماجزه را خدا این آیت میفرماید شفادهنده خداست یوسف نیست چرا شما نمی فهمید آیات را آیات خداوندی عزوجل می فرمه هیچ رسولی نمیتواند تواند آیه بیاورد موجزه نشان بده الا بیزن الله اگر به اجازه خدا بدون اجازه خدا امکان نداره پس ما معتقدیم هر جا خدا هر چی اجازه داده ما انجام بدیم ببینید تو قرآن آیه هست که ما از خاک و از درخت و از پیراهن و از این و اون شفا بگیریم قرآن برای ما ملاک هست اون یک مورد هست غیر از اون مورد در تمام زندگی نمیتونید پیدا بکنید اونم از کنم که معجزه نمیتونیم از معجزات دلیل بگیریم که پیغمبران قدرت خدایی دارن نه قدرت به دست اللہ هست این آیت داشتی باشید وما کان لی رسولین اینجا رسول سراحت شده برای هیچ رسولی نیست ان یأتیه بی آیت اینکه آیه بیاورند چه آیه تکوینی عرض کردم چه آیه تشریعی آیه تشریعی چیه؟ آیه که دال بر حلال و حرام باشد طا پیامبران نمیتوانند یک کک میرا از طرف خودشون حلال بکنند یا حرام بکنند مثال عرض کردم حضرت خوله زنی هست مسکینه می آید خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم یا رسول همسرم زهار کرده رسول الله بهش میگه که برای من هنوز دستوری نداده نشده که حکم تو چی هست. او نامید میشه گریه میکند قد سمع الله قول التي تجادل کن في زوجه ها و تشتكي إلى الله شکایتش را پیش خدا میبرد. رسول الله نتونست برای راهی نشان بده. الله برای راه را فراهم کرد. لذا الله تعالی دستور داد که از این به بعد برای زهر کفاره است پس پیغمبر آیه تشریعی هم نمیتونه بیاره آیه تکوینی هم نمیتونه بیاره پس ولایت مطلقه فقط و فقط برای الله است یعنی اختیار مطلق در همه مسائل چه شرعی چه مسائل و امور کونیه مسائل تکوینی آیات را بفهمیم و ما کان لرسول ان یعطیه به آیت آیتن عام هست نکره هست نکره بر عموم دلالت میکنه هیچ نوع ای مفسران همه نوشتن تکوینی و تشریعی الا با اذن الله مگر به اجازه خدا خدا که اجازه بده همه دستورات که رسول الله به ما داده به اجازه خدا به ما فرموده نماز بخونید انگونه حج روزه زکات فلان دستور فلان امر این همه باذن الله هستند فاذا جاء امر الله زمانی که امر خداوند بیاید دستور خدا صادر بشه قضيه بالحق چه در دنیا چه در آخرت به حق فایصله میشه یعنی عملا فیصله میشه و خسر هنالك الكافرون مبتلون اونجا اهل باطل دروغگویان خساره ظاهر میشه خساره که از قبل اونها در خساره واقع شدن وقتی که راه انحراف را پیش گرفتند اما و خسره به معنای تبیین خسرانهم هست خسرانشون اون وقتی میشه ظاهر میشه آشکار میشه و خسره هنالک المبتن وقتی خدا فیصله بکند با اهل باطل اهل دروغ خسرانشون مشخص میشه الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأخلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تُنكرون صدق الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. در آيات مزشفة برائ إثبات مضاع. دلائله عقلی در بخش اول دو دوتا دلیله اقلی خانده شد اینجا اعاده دلیل هست اعاده دلیل عقلی بر اثبات توحید خداوند عز وجل بخشی و برخی دیگر از مخلوقات را ذکر می و نام می الله الذي جعل لكم الانعام الله عز وجل ان ذاتی هست که برای شما پایان را قرار داد لکم لام برای انتفاع هست یعنی برای نفع شما برای فائده شما چکار کنید پایان را؟ لترکبو منها من من تبعیزیه هست یعنی بعضی از انها را سوار میشید مثل شطور مثل اسب اولاغ و منها تأکلون بعضی از اونها را میخورید گوشتشون را میخورید گوسفند گاف شتر و علاوه از سواری و علاوه از خوردن گوشتشان ولکن فی هم منافع منافع دیگری برای شما در آن چارپایان هست منافعی مثل از شیرشون استفاده میکنید، از پشمشون از مویشان استفاده های مختلف که الله تعالی مقدر کرده برای شما و نیز ولتبلغو علیها حاجتاً في صدوركم این غایه لترکبو هست خداوند چارپایان را برای شما قرار دار تصوار بشید سوار میشین چکار کنیم ولی تبلغو علیها تا که بر آنها شما برسید وقتی که سوار شدید حاجتا به اون نیازی نیازی چی دینی چه دنیاوی بعضی نیازهای دینی براورده میشه مثلاً شطور سوار میشدن میرفتن حج بیت الله و بعضی نیازهای دنیاوی سفرهای تجارتی اون نیازی که در سینه‌تون هست و علیها و علی الفلک تهملون نه تنها این چارپایان که مرکب و سواری شما هستند بلکه بر آن انعام و علی الفلک و بر ها هم تهملون شما حمل میشید یعنی بر همه اینها سوار میشید اینها نعمتهای خود اینار رو کی درست کرده پروردگار درست کرده کشتی یکی از آیات بزرگ هست که در آیات مختلفی ازش نام برده شده و علاوه از این آیاتی که شما می خانید پروردگار می فرمد و یوریکم آیاتی آیات دیگر را خداوند هم به شما نشان میداد آیات دیگر غیر از سواری سواریها و معکولات مراکب و معکولات دیگر آیات زیادی هستند در این عالم در این دنیا که شما همیشه مشاهده میکنید و اگر مراد از آیات دیگر در باب مرکب باشند سواری هستند سواری های دیگری که خداوند به شما نشان میده در آینده چون در آیه دیگر هست که ویس نعو مالا تعلمون دیگر خداوند چیزایی که شما نمیدونید درست میکند درست میکند در گذشته بشر نمی دونست امروز ما بعضی از اونها را می بینیم می می دونی مثل قطار هست مثل ماشینا هستند مثل هواپیما هست ابزار جدیدی که درست شده و در آینده خدا می چه وسایل دیگری که ماها هم نمی دونیم ویریکم آیاتی لذا از همه این آیات به این نتیجه می رسیم که آیات الهی زیاد هست اینها دال بر قدرت پروردگار حقیقی هست فا فای آیات الله تنکرون کدام آیات الهی را شما انکار میکنید که انها ليست من عند الله انکار به این معنی که بگویید از جانب خدا نیست از جانب غیر خدا است کدام ای است کدام قدرت است همه شما اقرار دارید که همه اینها را خداوند داده هم مسلمان و هم غیر موحدین مشرکین هم میدونن دونن که نارا خدا درست کرده پس کدوم آیات را می قبول نکنید انکار کنید لذا از این آیات الهی انسان باید به وحدانیت پروردگار بررسد بعد از اینکه به وحدانیت و یگانگی پروردگار رسید که قدرت مال او هست مطلقا مال او هست باید به یک تا هم بررسد فقط او را پرستش بکنند اما اگر غیر از این باشد اون وقت انتظار منتظر باشد که برایش عذاب بیاید اینجا خداوند ذکر می‌فرماید عذاب را انهایی که غیر از این مسیر مسیر دیگری را غیر از مسیر توحید مسیر انحرافی دیگری را بردن خداون می فرماید احوال انها را ببینید اقوام گزشته افلم یسیرو فی الارض آیا سیر نمی کنند انها در زمین فینظرو ببینند کیف کان عاقبت الذين من قبلهم چگونه شد عاقبت و انجام کسانی که قبل از اینها بودند بنویسید به سبب کفر و شرک به سبب کفر و شرک به چه انجامی گرفتار شدند به چه انجامی مبتلا شدند ببینید اونها از نظر امکانات از نظر جمعیت از نظر قدرت از نظر مال هیچ کم بودی نداشتند کانو اکثر بیشتر از اینها از نظر چی جمعیت از نظر جمعیت آنها بیشتر بودن همین داستان فرعون را شما خواندید در همین سوره خواندید جمعیت بالای داش ملک بسیار بزرگی در اون زمان مصری مصر باستان یکی از بلاد مترقی بود کانو اکثر هم انها جمعیتشون بیشتر از اینها بود و اشد قوه و از نظر قدرت هم اونها قویتر بودند اینا همه دفع شبهات است شاید کسی فکر بکنه خب در گذشته اونها به دلیل قلت هلاک شدند نه خدا میفرما بیشتر بودند شاید قدرتی نداشتن زوری نداشتن الله نه و اشد قوه شاید مال نداشتن که اسلحه های خوب بخرند و از خود دفاع بکنند میفرما نه و اثارا فی الارض از نظر آثار در زمین هم بیشتر بودند آثار در زمین قبلا خند مثل قلعه های محکم مثل باغ های بزرگ مثل زراعت ها کشت زرها آثار مالی بیشتر داشتند سرمایه‌دارتر بودند اما این چیزها انسان را نجات نمیده. فما اغنا از ما کانو یکسیبون این نفی شفات قهریم است. یعنی دف نکرد از آنان، دور نکرد از آنان، آن چیکانها کس می کردند. چه چیزی اونها کسب می کردند؟ اعمال شرکیه بی نسید. اعمال شرکیه که اونها انجام می دادند، غیر خدا را فریاد می زدند. این فریاد و ندای غیر خدای اونها مشکلی را از اونها دور نکرد عذابی را از اونها دفع نکرد مصیبت را از اونها بر نداشت ببینید عزیزان اینجا در این آیات ما میخوایم که اقوام دیگر از نظر امکانات از نظر جمعیت از نظر قدرت از نظر سرمایه و مال بیشتر بودم معلوم میشه که مدار موفقیت اینها نیستند دنیای مترقی و پیشرفته امروز هر اندازه ترقی بکند هر اندازه از نظر سرمایه تمام سرمایه های دنیا را داشته باشد از نظر تکنولوژی حرف اول را بزند از نظر سلاح و مهمات چنان سلاح و مهماتی داشته باشید که با یک دکمه دنیای را ویرام بکند باز هم اینها به فوز و فلاح و موفقیت نمی رسند تا زمانی که ایمان به خدا داشته نباشند و معرفت و شناخت پروردگر داشته نباشند از این آیه معلوم میشه که که های که دارای قدرت هستند گرچه این قدرتها در مقابل قدرت پروردگر قدرت پوشالی هست بیارزشی هست اینایی که دارای قدرت هستند هر چه داشته باشند تا زمانی که ایمان و معرفت رب نباشد اینها نجات نمی یابند اینها موفق نمی شوند خداوند در نشان میده، بیان می فرماید که گذشته ها خیلی داشتند در اون زمان مدرن بودند در اون زمان حرف اول می زدند مثل فرعون چنان قدرت گرفتی بود که دعوی ربوبیت هم می کرد انا ربکم الاعلامی گفت نمرود ادعای خدایی می کرد ولی چون که ایمان نبود بدبخت و حلاق شد. بس مدار نجات ایمان و توحید هست فلما جاعت هم رسول هم بالبینات زمانی که پیش آنان رسولشان آمدند با معجزات آمدند با دلائل و براهین آمدن بینت قبلن نرس کردم هر دو معنا دارد هم موجزات هم دلائل فرحو بما عندهم من العلم آنان تکبر کردن فرح قبل از زنگ تفریخان دیم فرح بمانه چی از نظر ابن عباس رضی الله عنه تکبر كل فرح في القرآن بمعنه بطر وقتی که دلائل را انبیا آوردن معجزات را آوردن اینها اعتناع نکردن اینها توجه نکردن همون علمی که پیش خودشون بود همون دانشی که پیش خودشون بود به اون مغرور بودند فرحو به معنده من العلم مگه اینها چه علمی داشتند؟ الله علامه آلوسی میفرمه منظور از علم همون اطلاعات ناقص انها مراد است مثلا در باره توحید خدا انها میگفتن اجعل الالهت اله واحده همه خدایان جن به یک خدا بسنده بکنی این الان در باره توحید علم بود. منظور از علم همون شبهات کجروی ها دربار معاد چی می گفتند؟ که من یحیل عظام و هی رمیم کی میتونه زنده بکنه بعد از اینکه انسان و استخانش خاکستر بشه پودر بشه پوسیده بشه دوباره چطور زنده میشه یعنی علم اونها همین عقل ناقصشون بود پس بماعند و من العلم این نیست که علم کتاب داشتند این نسکنها علم دانش داشتن بلکه ایک سری قیاسات باطل ایک سری شبهات بیجا اللہ ما آلوسی نوشته بما عندهم من العلم ای عقائدهم الزائغة وشبههم الداحضة فیما يتعلق بالمبدئ والمعاد. عقائد کاج شبهات از کنم که بشبهه افتاده اون شبهات و اون عقایدی که مربوط به توحید و قیامت بود اینها را خداوند میفرماید بما عنده من العلم اینها وقتی که در مقابل انبیا با این شبهات خودشون آمدند مغرور بودند که ما اینقدر بلدی میدونیم فرحو بما عندهم من العلم وقتی که غرور و تکبر از خود نشون دادند نتیجه چی شد وحاق بهم ما کانو به یستحزون فرود آمد بر آنان آن کو را مسخره می کردند مسخره را می کردند عذاب را عذاب خدا فرود آمد دیگه وقتی که عذاب آمد ایمان آوردند وقتی که به عذاب گرفتار شدند چیکار کردند ایمان آوردند الله می فلما فلمع رأو زمانی که انها دیدن عذاب ما را بس معنی جنگ حاصل اینجا برات عذاب هست. قالوا آمنا بالله وحده اقرار کردند به وحدانیت پروردگار ایمان آوردیم به خدا بتنهایی فقط خدا و کفرنا بما كنا به مشرکین و کفر کردیم یعنی پشت دادیم انکار کردیم آن معبودانی که کن به مشرکین ما آن معبودان را با خداون شریک می ساختیم متوجه شدن وقتی که گرفتار عذاب شدن متوجه شدن که معبودان هیچ کاری نمیتونن برای ما بکنن لذا معبودان را انکار کردند. گفتن که ما به خدای واحد ایمان آوردیم اما دیر شده شاید در ذهن کسی بیاد که خوب الان ایمان آوردند این ایمان را می ایمان بس، ایمانی که انسان گرفتار بشه گرفتار عذاب بشه وقتی که ایمان بیاره وقتی که توبه بکنه حتی اذا حضره الموت قال انی توبت الان الان توبه بکنه اما تا چی زمانی توبه قبول هست؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید توبت و امتی معلم یو غرغر امتی من اگر تا زمانی که غرغره و خیرخیره نرسیده تا اون زمان اگر توبه بکنه توبهش قبوله اما وقتی به اونجا رسید یعنی آخرین لحظات دیگه توبه قبول نمیشه اینها وقتی که به عذاب گرفتار شدند انفجارات عذاب آغاز شد ساعقه و رجف و زلزله شروع شد الان ایمان آوردند الان که گرفتار شدند این دیگه ایمان ایمان بأس است ایمان بأس قبول نیست لذا الله می فرمد فلم یکو ینفعهم ایمانهم لما رأو بأسنا ایمانشان برای انها سودمند نشد نافع نشد وقتی که عذاب ما را دیدند علما نوشتند که ایمان و توبه بر دو قسم است غیر از اون که انسان قبلا توبه میکند اون مرادم نیست توبه وقتی که انسان گرفتار میشه و توبه میکنه مشکل براش پیش میاد و توبه میکنه آیا وقتی انسان گرفتار مشکل شد توبه بکنه توبهش قبول نیست؟ مثلا کسی امروز به زندان افتاد چرا توبهش قبول میشه میفرمایند توبه و ایمان بر دو قسم است یکی ایمان بس یکی ایمان یعص ایمان بس و توبه بس اینه که انسان وقتی که درگیر میشه با عذاب درگیر میشه با مرگ درگیر میشه با جان دادن این وقت ایمان میاره یا توبه میکنه از گناهانش این قبول نیست مثل فرعون وقتی که درگیر شد غرق شد گفت آمنت بالذی آمن, آمن بیه موسی من به هم خدای کی ایمان آوردم موسی من هم ایمان آوردم دیگه جبرئیل زد تو دهنش گفت دیر شده این ایمان، این توبه که به وقت بس باشد قبول نیست اما به وقت یاس اگر باشد یعص یعنی نامیدی انسان گاهی از زندگی نامید میشه و توبه میکنه این توبه امید هست که قبول بشه مثلا عذاب میاد هنوز عذاب شروع نشده انسان احساس میکنه عذاب داره میاد احتمال داره این عذابی که آمده دوباره دست بشه شروع نشده عذاب ارز کردم اون انفجارات عذاب آغاز نشده قبل از اون انسان توبه میکنن توبهش قبول میشه علما استدلال گرفتن از توبه قوم یونوس وقتی که آثار عذاب را دیدن وقتی که اون عبری که سیاه بود و عذاب را با خودش همراه داشت او وقتی که دیدند هنوز شروع نشده بود متوجه شدند که یونس درست میگفت دویدن پیش این آقل و پیش اون دانشمنگ چیکار بکنیم پیش رئیس و پادشاه خودشون گفتند که باید توبه بکنیم بیم خونه یونس رفتن یونس نبود گفتن یونس نیست خب توبه چیکار بکنیم گفتن بیاییم همه جمع بشیم در همین میدان میدان شهر همه جمع شدن حیوانات رو هم بیاره همه گریه کردن خدایا ما اشتباه کردیم ما را عذاب نده ببین قبل از بس قبل از اینکه که عذاب آغاز بشه این را میگن یعص ناومید شدن خداوند قبول کرد پس ایمان یعص قبول میشه ولی ایمان بس وقتی انسان گرفتار شد قبول نمیشه دو تا مثال ارث کردم یکی مثال فرعون را یکی مثال قوم یونسر مثلا قوم عاد مثل همین عذاب برایشون عذابی آمد ابر سیاهی آمد چند وقت بارا نیامده بود بجای این کتابه بکنند در سوره احقاف میخانیم فلما راوه و عارضن وقتی که عبر را دیدن که بروادی های اونها عارض شده قالو هازا عارض و ممتر و این عبری هست که میخواد به ما باران بده یعنی اینقدر عقلشو نکشید که عذاب خداست گفت این آمده که به ما باران بده همه رفتن زیر اون چون خیلی گرم شده بود همه رفتن زیر اون جمع شدند لذا خدای عزا و جل اونها را به عذاب گرفتار کرد پس همونی که آغاز شد توفان و آغاز شد حلاکت اونها بنابراین اگر کسی آثار ببیند علامت را ببیند و توبه بکند قبل از اینکه که درگیر بشه امیدی هست که توبهش قبول بشه اما بعد از اینکه که درگیر شد و داره جان میده الان توبه بکند توبهش بر اساس این آیه و بر اساس اون حدیثی که خدمت شما خواندم قبول نمیشه بنابرای همین ما میگیم بعضی از مردم وقتی که گرفتار مشکلات میشوند و هنوز موت و آثار موت نیامده پیشا پیش توبه میکنه امید از توبهشون وزیرفته میشه مثلا کسی هست مرد می کند فسق و فجور می کند سرکشی می کند مریض میشه مریض میشه دکترها میگن قلبت مشکل داره یا سرطان داری خب این دیگه میدونه که از این به بعد میمیرم توبه میکنه توبه میکنه خب این سرطانی امکان داره تا ده سال دیگه زنده بمونه تا بیست سال دیگه زنده بمونه امکان داره فردا بمیره معلوم نیست ولی قبل از اینکه درگیر مرگ بشه این توبه میکنه توبهش انشاءالله پذیر افته میشه یا کسی به زندان میفته بعضی حکم اعدامش را صادر میکنه حکم اعدامش صادر شده ولی امکان داره که همین حکم فردا لغف بشه توبه میکنه تو همون زندان بعضی حکم اعدامش را صادر میشه یک سال بعد اعدام میشند دو ماه بعد اعدام میشن شاید اعدام لغف بشه لذا اون توبه میکنه این توبه توبه یعص است نامید شده این امیدوار این پذیرفته بشه اما وقتی که تناب را به حلقش دادند و الان دارجان میده الان توبه میکنه این دیگه توبه خیر خیره هست این پذیرفته نمیشه پس فرق یعص و بعص را بدونید اینجا که پذیرفته نشد توبه چی بود؟ بعص بود ایمان بعص بود الله عز وجل مي فرمي فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا بأسنا بآنان نف نداد فايدة نداشت إيمان شان وقت كديدان عزاب مارا سنة الله التي قد خلت في عباده اي سنة سنة الله انت رويش الهي از قبل بوده در بندگانش گذاشته که ایمان یعص ایمان بس قبول نمیشه و خسره هنالک الکافرون اینجا خساره کافران آشکار شد ببین کافر زمانی در خساره واقع میشه که کفر را انتخاب میکند بس از اول اینها خسار در خساره واقع شدن ولی اینجا مشخص شد تبین خسرانهم بدلیل اینکه مشخص شد که با کفر مردند بس و خسره هنالک الکافرون تفسیر جلاله نیشته و تبین خسرانه هم خسران ظاهر شد که الان به وقت روئیت عذاب ایمان آوردن دیگه فائده اداره خب این بود سوره مبارکه غافر یا سوره مؤمن که در این سوره خداوند چندین بار فرمودن فدع الله مخلصین له الدین و برای اثبات این مدعا خداوند هم دلائل اقلی ذکر فرمودن، هم دلائل نقلی ذکر فرمودن، هم دلیل وحی ذکر فرمودن، هم تخویف دنیوی، هم تخویف اخروی، بی بیم از عذاب دنیا، بیم از عذاب آخرت، همه و همه حول همین یک محور، که فدع الله مخلصین له الدین، ادعونی استجب لکن،